آغاز فرماید، الله عزوجل میفرماید یا ایها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ای مؤمنین شما عقودی که دارید به اون عقود وفا بکنید ببینید عقود جمع عقدست. عقد است عقد یعنی اون چیزی که انسان می‌بندد بعضی گفتن که مراد از این عقد اهدهای هست که شما مسلمانان دارید اهد و عهودی مواسیقی پیمانهای خب کدوم پیمان مراد است؟ چند قول است اینجا؟ با توجه اینکه این مطلق است اگر همه اقوال را بگیریم هم دور نرفتیم یکی اهد و پیمانهای که قبل از اسلام هستند با هم دیگه داشتید به اونها وفا کنید دو وقتی که با هم دیگه داد و ستد به و شرا میکنیم گویا با هم دیگه عهد میبندیم که شما این گندم را به من بده من این پول را میدم من متعهد پول میشم شما متعهد گندم میشید شما هم عمل کنید من هم عمل میکنم سه عهد و پیمان هایی که به وقت نکاح بسته میشه یک طرف دختر میده یک طرف دیگه مهریه نفقه حقوق دیگر اون اهود هستند اون اهدها مراد هستند و بعضی میگن بیشتر اینجا وعدها و پیمانهای فیما, بعد هست، فیما بین هستند ما با هم دیگه وعده میکنیم پیمانی میبندیم مثلا عقد سلم یکی از زمین اهود هست و بعضی میگن که اینا مخصوص اهل کتاب هستند يعني پیمان هاي که در کتاب ها شون است چون می الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم منهم 12 نقيبا اون پیمان ها مراد هستند ولی بهتر این است که همه این اقوال هست بهتر اینه که مراد از عهد عام باشد ببینید چه عهدی که شما بستید مثلا با خدا عهد میبندید با بندگان خدا عهد میبندید با بنده خدا عهد میبندی که شما فلان کار را انجام بده این مبلغ را به شما میدم فلان تاریخ این چک را پاس میکنند یا با خدا عهد میبندی نظر میکنی خدای اگر این کار بشه ده تا شطر میکشم این همه عهد استند یا تمام فرائز و واجبات و حدود الهی که ما باید انها رعایت بکنیم این تمام عهد هستند احکام اسلامی را پایبند باشیم در هر زمین این ها عهد هستند اصلا لا اله الا الله که گفتیم و خواندیم با خدای من عهد بستیم که خدایا هر چی که از ایمانیات و اقائد و احکام و اوامر و نواهی شما بفرمایید و دستور بدید ما اطاعت می کنیم اینا همه احد هستند پس مراد این از که به این احدهاد چی باشید فائم باشید الله این ازما می الله میفرماید می که یا ایوها الذين آمنوا اوفو بالعقود ای مومنین شما وفا کنید با تمام عهود و مواثیق و پیمانهای که داری چبا خدا داری چھبا بندگان خدا دارید خب این دستور است اما بعد از این الله تعالی محرمات را بیان می‌فرماید و محللات را احلت لكم بهیمۃ الانعام حلال قرار داده شده برای شما چار پایان الا ما یقتل علیکم مگر آنچه که تلاوت میشه؟ آنچه که تلاوت میشه دو آیه سفوم حرمت علیکم المیتت والدم الدم و لحم و الغنزیر و جاس انها تمام بحیمت الانعام های هستن که ناچین حرام هستند. پس انها را همه حلال هستن غیر زین های که حرام اعلام میشن یلا ما یتلاع لكم غیر محیل السید یعنی حلال ندانید سید حرام را سیدی که در حالت احرام هستید غیر محیل السید و آن توم حرم حلال هست اما غیر حلال کننده سید و حلال داننده سید باشد در حالی که شما در اهرام در احرام حرام هست حلال نیست ان الله يحكم ما يريد این جواب حاکمان است خدا هر چی که اراده میکند دستور هم میده شما موظفید دستور خدا را اجرا کنید عملی کنید یا ایها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله بعد زين الله تعالی منظورات الله را بیان میفرما هر چی که برای خدا نظری که برای خدا باشد اما من جمله النزورات الله یا ایوها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ای مؤمنین شما حلال ندانید یعنی احترام بگذارید حرمت قائل باشید حلال ندانید شعائر الله را قبلا شعائر الله خاندین شعائر جمع شعیره هست شعیره بمانه علامت شعیره بمانه چیه علامت هر آن چیزی یا زمانی یا مکانی یا شی هر آن زمان یا مکان یا شی که او علامت دینی باشد اون جزش عائر الله است. مثلا مکان صفا هست مروه هست عرفات هست منا هست مزدلفه هست بیت الله هست اصلا حرم امن الهی هست اینا همه چی هستند جز شعائر الله هستند حرمت اینها را بدانید مسجد از شعائر الله هست ازان از شعائر الله هست به خدمت شما که زمان مثلا ماه رمضان ماه حج روز جمعه اینا همه از شعائر الله هستند پس یا مثلا شع باشد کوه صفا کوه مروه خود کعبه شریفه اینها ها از شعائر الله هستند حرمت اینها ها واجب یا مثلا بعضی میگویند که در اینجا مراد از شعائر شعائر حج هستند چون بعضی بعداً را بعدا تسریم میکند مثلا حج یکی شما میبرید از اینجا میرید به حج یک شطر با خودت از همین جا نشانی میکنی یه قلاده به گردنش میدی علامت اینه که این برای عرض کنم که قربانی حج برده میشه الا اون شطور از شعائر اللهس همون قلاده را هم الله تعالی میفرماید که بیش بی حرمتی اون از شعائر اللهس او علامت بنابر این بعضی میگن اینجا مراد شعائر الله اون شعائر حج فقط مراد هستن بعضی میگن نه مطلقاً شعائر مراد حسن بالاخره لا تحلو حلال ندانید یعنی به حرمتی نشود ولا الشهر الحرام والنماه حرام ماه حرامه مسعائر الله هست ولا الهدیه البته درباره ماه حرام که هنوز حرمت باقی است بحث کردم ولا الهدیا، ولا القلائد، و نه حدی قربانی که بسوی بیت اللہ برد میشه، و نه قلادهایی که بگردانه هدایا هستند، ولا آمین البيت الحرام، و نه قصد کنندگان و اراده کنندگان بيت الحرام، مراد از آمین کیابودند؟ منظور بعضی میگویند که کسانی که احرام بستند و سمت بیت الله میروند حالان بعضی میگن مراد اینجا خب کی جلو اینها را میگیره بعض میگن مراد اون مشرکینی که در هدیبیه مانع رسول الله و صحابه شده حالا که مکه به دست شما افتاده اونها میخانبیان جلوشون را نگیرید بعض میگن نه مشرک دیگه اینما المشرکون نجسون فلا اقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مراد و مومنینی هستند که اون زمان با مشرکین بودند حالا شما مانشون نشوید یا واضحتر بگم در این زمان هر کسی که احرام بسته میره به مسجد الحرام شما در فرودگاه جلوش را نگیرید ممنوعش نکنید این میتونه باشه نه در زمان ما این از شعائر الله این لباسی که پیش پوشیده حیفظ در این لباس جلو اشرا شما بگیرید وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانَا در حالی که همینها فضل الله را و رضاي الله را میتلبند منظور اینها مومن استند موحید استند پس اینها را حلال ندانید بینها تعرض نکنید خوب یکی از این موارد چی بود؟ سید بود در حالت احرام اما اي موقت واذا حللتم فصطادوا هرغا شما حلال شدید يعني از احرام فارق شدید فصطادوا شکار بکنید این أمر, امر وجوب نیست امر اباحه است یعنی مباح شما سياق ولا يجرمنكم شنآن قوم عن المسجد الحرام ان تعتدو اللہ می فرماید تحریک نکند شما را برانگیخته نکند بغض با قومی چرا؟ چونکه انصدوکم عن المسجد الحرام اینکه باز داشتن شما را از مسجد حرام این باعث نشود که انتا تدو اینکه تعدی بکنید یعنی هرچی به تو ظلم کرده تو ظلم نکن تو عادل باش تو مسلمانی تو بنده راستین خدا هستی تو مثل نیستی و تعدی می شما با انصاف باشید و تعاونو علی البر و التقوى ولا تعاونو علی الاثم و هم دیگر را نصرت کنید یاری برسانید بر بر بر نیکی و تقوى خدا ترس یعنی در انجام فرائز و م... آ... عبادات هم دیگر را کنک کنید و بر انجام گناه و معصیت هم دیگر را مساعدت نکنید ولا تعاوانو علی ا اسم وال عدوان و هم دیگر نکنید بر گناه و بر تععدی کسی میخواد گناهی بکنه هیچ وقت شما مساعدتش نکنید شما همراهی نکنید به همین خاطر در حدیث آمده خوب دقت بفرمایید در حدیث شریف آمده که هر کسی که. شراب شراب چون حرام هست تمام کسانی که در امر شراب کمک می کنند ده نفرند تقریبا چون کسی که درست می کنه چون کسی که هم مالی می کنه حملش می کنه تا مغازه تا می بره چون کسی که می فروشه چون کسی که می خره اینها ها بر اینها لعنت آمده ربا وقتی که حرام هست و لعنت آمده تمام کسانی که در امر ربا مساعدت میکنند معاونت میکنن، چه اونجا منشی قرار میگیرند کاتب قرار میگیرند و چه کسانی که مساعدت و کمک میکنند همه اینها مورد لعن هستند همه اینها در جنگ با خدا تهدید هستند خیلی مردم میپرسند که ما وام نمیگیریم وام سود هست و وام های امروزه همه ربوی هست سودی هست اما یه شرکتی داریم، یه امتیازی داریم که به این شرکت ما وام میده. ما خودمون وام نمیگیریم. رفیقی داریم، دوستی دارم، او میگه بده، من وام میگیرم. دفترچه مثلا ازدواج تراب بده، من میخوام وام بگیرم. یا امتیاز اون شرکت ما میخوام برای خودم وام بگیرم. گناه برگردن من. نه. شما که مساعدت بکنید هم در گناه شرکتی. شما که امتیاز را در اختیارش بذارید دفترچه را در اختیارش بگذارید. این تعاون علل اسمی هست تعاون بر گناه هست بر عدوان هست الله عزوجل از گناه هم باز داشته از مساعدت کسی دیگر و یاری رساندن به کسی دیگر در امر گناه هم باز داشته و قل الله این نسخه عمل است. از خدا به ان این شديد العقاب إنه سخي تقوى سكر ما بدان إمكي إن الله شديد العقاب هاس هتمن تقوى در وجود و در زندقية ما مئاية حُرِّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ بعد دبادلز إنك الله فرمود إلا ما يطلع عليكم محرمات ربرا يشمع التلاوات ميكونيم حالا محرمات رب الله بيان ميفرمان محرمات جي هستن حُرِّمَت عَلَيْكُم الْمَيْتَةَ حرام قرار داده شده بر شما میتحیوانی که خودش بمیرد بدون زکاة بدون زبح و دم مراد از دم دم مصفوح هست آیه دیگه اون را توضیح میده و دم اون خونه که جاری هست اون خون هم حرام است و لحم الخنزیر و همچنین گوشت خنزیر هم حرام است گوشت خنزیر تمام خنزیر حرام است ولی چون ما معمولا گوشتش رو میخورم مقصود گوشته که اسم گوشت برده شده و ما او لغیر الله به هر آن چیزی که نام زد بشه صدا زده شود برای غیر الله آن چیز هر چیزی که به نام غیر الله اون نامگذاری بشه هر چیز چه گوسفندی باشه چه نخودو کشمش باشه چه آش و پلو باشد هر چی باشد ما عام هست اوه اللہ این بحث بار بار ذکر کردیم هم در مقدمه هم در سوره بقره اوه اللہ هر چی که نام گذاری بشه نام زد بشه برای غیر الله آن این هم حرام هست این, این هم نظر لغیر الله هستند و المنخانقتو و همچنین اون حیوانی که خفه میشه و و همچین اون حیوانی که ضربه میخورد چوبان میزنه چوب را تو سرش او میوفته میمیره والمتردیت و اون حیوانی و اون چار پائی که از سر بالا از بالا میفته پائین از سر پای میفته و میمیره و النطیحة می می او می و اون حیوانی می که شاخ میخورد حیوانی دیگه با شاخ میزارد او میوفته و میمیره و همچنین وما اکل السبعو اون حیوانی که در رنده او را میخورد گرگ می خورد گوزفند را گرگ می خورد اما بخشیش را گذاشته نصفش را گذاشته شما رس، رسیدید گرگ فرار کرد حالا یه دستش را خورده یه پایش را خورده هنوز بقیه گوشت مانده ولی خب مرده حیوان این حلال نیست حرام است ما ذکیتم. مگر اونی که شما چی بکنید زبحش بکنید این الا ما زکیتون به چی مربوط است به ما اکل السبوع و نطیحه المتردیه الموقوزه المنخنقه تا اینجا. یعنی اگه خفه شده بود با اون رسمانی که شما به گردنش بستید خفه شده بود اما شما راه هنوز هنوز و پا می زد زبحش کردید یا ضربه خورده بود داس دستوپا میزن میمرد شما ذبح کردید یا از کو افتاده شما ذبح کردید یا گرگ خورده شما چی کردید رفت هنوز زنده بود شما ذبح کردید میشه که یک بخشیرش را بخوره هنوز زنده باشه یا شاخ خورده بالاخره الا ما شما ذبحش بکنید حلال میشه حالا این استثناء همه علماء میگه از کجاست از والمنخانقه است. وقتی کسی فکر نکنه که وما اوه اللہ الله باشه اگر از وما اوه اللہ الله باشه پس چرا و لحم الخنزیر هم نباشه لحم الخنزیر اللہ ما زکیتم خنزیر کذبش کردی حلال باشه این معنی نیست این مشخصه حلا ما اوه اللہ الله چرا این نیست چون نامزد شده و نجس شده خاطر غیر الله و اون ما اوهلل غیر الله ارز کردم تنها اون گوزفند نیست ما عام هست هر آن چیزی که نامزد بشه امکان داره ارز کنم شربت و شرینی باشه و زبر نمیشه بنابراین والاستثناء همه علماء نوشتن والاستثناء یرجعو الى المنخنقه و ما بعدها تفسیر مدارک وما اوهل للغير الا اس كجا استثناء شيء الا ما زكيت من استثناء كجاس ازل منخنقه است قال علي علن بمي عباره الله ما ندلوا در بحر المحيد قال علي وابن عباس والحسن وقتادة وابراهيم وطاووس وعباد عباد بن عمير والزحاق وابن الزبير وابن زيد والجمهور هو راجعن الى المذکورات ای من قوله والمنخنقا از این بعد الا ما زکیتوم هست لذا انها اگر توانست زعب بکنید حلال میشه وما زبحه على النصب آن چیزی که بر نمادهای شرکی زبح میشه نصب هر نمادی را میگن که اونجا غیر خدا عبادت میشه مثلا یه جای سلیبی هست، یه جای درختی هست، یه ای جای یک نماد دیگری از غیر الله هست و مردم اونجا میرن غیر خدا را بعضی مردم گوسفندان خودشون را اونجا میبرند اونجا که میبرند زبح میکنند هم چی هست؟ حرام هست حالا فرق ما اوهلل غیر الله و ما زبه فرض میکنیم ما اوهلل الله چی باشد؟ گوسفند باشد با و ما حالا نسب لنصب چیه؟ ما او حلال هر جذب بکنند حرام است همین جرت تو چون نامگزاری شد برای غیر خدا گفت که مثلا برای تقرب پیر صاحبین را میکشم اون همین که نامگزاری نجس میشه این موضوع به حالا نصوب شاید برای خدا میکشه بسم الله الله اکبر میگه ولی از اینجا میبره همون جا می اینم هم حرام میشه چون که برای خدا که میکشه بازم تقرب اون فرد که اون غیر الله چی هست مد نظر است و انتستقسمو بالازلام و دیگه از محرمات اینه که طلب قسمت بکنید با تیرها ببینید در مزارات اون, اون زمان در بودکده ها و بودخانه ها تیرهای هم بود که به وسیله این تیرها طلب قسمت می کردن یا طلب تقسیم هر دو معنا. به چه معنا هست دو تا تفسیر گفتن هر دو تا درست، هر دو بود یکی این که یک کاری می خواستن انجام بدم می گفتن معلوم نیست که این کار در قسمت ما هست یا نیست در تقدیر ما هست یا نیست مثلا می خواهم فلان جا ازدواج بکنم یا به فلان سفر تجاری برم حالا می رفتند مشوره می گرفتند از کی؟ از همون نماده های غیر الله اونجا تیر بود اون کسی که اونجا مجاور بود تیر را مندخت یعنی قرار را مندخت نوشته بود افعل این کار را بکن لا تفعل این کار را انجام نده یا مثلا قدیم ها به وسیله پرندگان هم طلب قسمت میکردند. کبوتر را به پرواز در می آورده اگر قسمت راست رفت این کار را انجام بده اگر چپ رفت این کار را انجام نده یک خطی مسیر براش تایی می کردن پس این بود که خیر و شر را معتقد بودن اینها می دونن. یعنی به اونها به اون مزارات به صاحب مزار به اون الهی که این نماد و مالی او بود آلم و می دانستن می اگر خیر باشه این به من مشوره میده که این کار را بکنم یکی این است یعنی انجام کارا دوم اینه که تقسیم تقسیم یعنی چه گاهی با هم دیگه شراکتاً یک گاوی، یک گوسفندی یک شطوری ده نفر شریک می شدند بعداً ده تا سهم می کردند یه سهمی مثلاً بزرگ بود 20 کیلو بود یه سهمی دیگه کوچک بود دو کیلو بود یه سهمی متوسط بود حالا به وسیله اون تیرها قران دازی می کردند وسیله اون تیرها قردازی میکردن سا که زیاد می شد سامعیکی کم میشد طلب تقسیم به این معنی هست. حالا هر دو تا حرام هستند. اولی شرک دومی اگر بدون عقید شرکی باشه قمار است. پول برابر میدید ولی به یکی 20 کیلووم میرسه به کی دو کیلووم میرسه. یا اینکه دومی اگر هم بنابر همین اعتقاد باشه هم شرک هم قماره که این شون تقسیم را خوب میکنه بلاقره هرچی که سامه هر, هر یک ما باشه اون بهتر میدونه یعنی با علم که با علم تقسیم میکنه این اعتقاد را درباره اون آلیه باطل داشتن این ها لذا اللہ میفرمه همچنین حرام است این که شما طلب قسمت یا تقسیم بکنی با تیرها ذالکم فسق فسق یعنی حرام کامل اینها حرام کامل هستند این محرمات را که بیان کردم همه اینها حرام هستند لذا الله تعالی می فرماید که اليومایئسالذین کفروا من دینکم بعد از اینکه محرمات را بیان فرمودند الله می فرم امروز معیوس هستند کسانی که کفر کردن از دین شما چون دین شما شریعتش کامل شد، مستقل. حالا مراد چی هست؟ امروزی بعضی میگن قیلا یوم نزلت الآیه. اما روایت سهیه نآیه هم در همون روز نازل شد که مروایش شیخان عن عمر عصر یوم الجمعة عرفت حجت الوداع. این عصر روز الجمعة بود و عرفت حجت الوداع بود. الله می فرماید امروز مایوس هستن که کوفت کرده از دین شما پس نترسید از این مشرکین از این به بعد فقط از من الله بترسید الیوم اکملت لکم دینکم امروز ابتنان رب العالمین است من امروز دین را برای شما تکمیل کردم و اتممت علیکم نعمتی و نعمتکم را بر شما تمام کردم و رضیت لکم الاسلام دینا و راضی شدم برای شما اسلام را یعنی پسندیدم برای شما اسلام را چون مطابق فطرت است به عنوان دین اسلام را پسندیدم ببینیم مراد از تکمیل دین چیه مراد از تکمیل دین دیگه تکمیل دین هست مراد اشاره به امامت و به خلافت چیزی اینجا فحوای کلم را ببینید سیاق و سباق را ببینید این سوره مبارکه مائده هست در این سوره بیشتر حلال و حرام بیان میشه ما قبل سوره آیه را ببینید ما قبل ما بعدش را ببینید همیش بحث محرمات خداوند عزوجل وعده داده بود که محرمات را کامل بیان می کنم حالا وقتی که کامل بیان شدند الله تعالی این رمی فرمید که دین کامل شد چون دین همینه که ما دین یعنی شریعت به حلال و حرام ما چی بکنی عمل بکنی اینجا اشاره به چیزی دیگر نیست اگر اشاره به چیزی دیگر بود در لفافه بیان نمی شد بلکه الله عزوجل سریح بیان می فرمود بعضی میگن که خلافت سیدنا علی که بعدا در غدیر خم اعلام شد و چرا اینجا بیان نشد؟ اکثر مسلمانان اینجا بودند اونجا که رفتم بعدا متفرق شدند. اهل مکه همینجا مندند اهل بلاد دیگر اطراف مکه مال طائف، مال حنین جاهای دیگر اینها رفتم به مناطق خودشون چرا اونجا برای اونها اعلام نشد چون مسئله بود مربوط به اهل یمن بود و از اونجا اهل یمن در غدیر خم در سرای غدیر خم اهل یمن جدا می شدند و معلوم بود که اونا گزارشاتی که در رابطه با سیدنا علی داده بودند اون گزارشات بیاساس بود نادرست بود چون علی از یمن آمده بود به عنوان نماینده رسول الله در یمن برای مسائل مالی رفته بود لذا اونجا ان حضرت صلی اللہ علیه وسلم علی از خود دانستند و فرمودند که من کنتو مولاهو فهاز علی مولاهو بحث بحث خلافت نیست مولاه بمعنی جانشینی هم نم لذا انجا انچه که آن حضرت صلی الله علیه انچه که الله عز وجل بیان فرمودند اليوم اکملت لکم دینکم بعد از بیان چی هست مسائل حلال و حرام هست الله تعالی فرمود کہ احلت لكم بهیمۃ الانعام الا ما یتلى علیکم الا ما یتلى علیکم رب بعض توزی دادن در حرمت علیکم المیته کاملا برای ما بیان شد الحلال و بین والحرام مبین همه واضح شدن روشن شدن آشکار شدن حالا فرمود که دین چی شد کامل شد به این معنی هست فمنستر رفی مخمصه غیر متجانف خب حرام را الله تعالی بیان فرمودند الان بعد از این آیه هم همین بحثه حرام را الله تعالی بیان فرمودند اما فرمودند که کسی مجبور بشه در مخمسه مخمسه یعنی اصرار گرسنگی شدید غیر متجانه فل اسم غیر از اینکه متمایل بشه برای گناه یعنی کوچکترین گناهی نباشه چه تمایل به گناه نداشته. الله غفور رحيم خدا و رب میبخشه یعنی چی ببین در رابطه با چیه در رابطه با این هست که کسی مجبور بشه مستر بشه از اینها بخوره از این مال حرام بخوره از این حیوانی که میته است بخوره از این حیوانی که سرش افتاده بخوره اما می فرماید که مخمسه مخمسه حالت استراری را میگند گروسنگی شدید را میگند اون حالت را میگند که اگر نخورد میمیرد اگر نخورد میمیرد و غیر متجانف لئس شما قبلا خواندیم غیر باغن و همون باغ و عااد را مخمسه و غیر متجانفه لئس بیان میکنه یعنی از حدش بیشتر نخورد برای لذت نخورد بخورد به اندازه قوت لایموتش به اندازه اینکه حیات بماند نه اینکه بالاخره شکمش رسیر بکنه نه اینکه لذتی از اون گوشت ببرد تا این حد اشکالی نداره علما نوشتن فقهای ما که حکم تداوی بالحرام هم همینه حکم تداوی بالحرام یعنی میشه که آیا کسی تجویز کرد که این حرام را بخور از این مریضی خوب میشه خیلی چیزها هستند که میگویند که اگر شما بخورید خوب میشه مثلا در رابطه با دم مصفوح البته دم مصفوح خرگوش بیابانی میگویند هر کسی که آسم داره نفس تنگی داره همین که بالاخره این خارگوش را بکشد و خونش را بخورت خوب میشه معروف است حالا این تداوی حرام است آیت تداوی بلحرام جائز است میگه همین حکم داره اونجا هم انسان استرار داشته باشه استرار به چه معنی یعنی هیچ دوای دیگری وجود نداره تنها دوا همین یکی است لذا اون وقت انسان میتونه که چکار بکنه استفاده بکنه تا خوب بشه اما اگر راه دیگری وجود داره این وقت به حرام مراجعه نکنه یسالونک ماذا احلل لهم حالا بعض هم ادامه چون هنوز واضح تر بشه از شما سوال میکنن که چی چیز حلال است بران ها قل احلل لكم الطيبات بگو حلال هستن برات شما طیبات تمام اونایی که پاکیزه باشه ببینید یه بچی گفته میشه طیب منش پاکیزه هست پاکیزه کدوممه اون کهطببع سلیممون را پاک بداد اون که طببع سلیممون را پاک بداد حالا طبعی سلیم انسان ها متاسفانه به دلیل گناهان و به دلیل آلودگی ها متفاوت شده. یک انسانی این قدر جنایتکار شده که در طبع او بهترین چیز همون ارز کنم که نجس هست مثلا خیلی ها هستن که بهترین چیز برایشون بهترین گوشت و با ارزش ترین گوشت گوشت خوکه گوشت خنزیر است حالا تباعی متفاوته بنابر این معیار الان کتاب الله هست اون چیزی که قرآن به عنوان طیب اعلام میکنه اون حلال است. و اون چیزی که قرآن به عنوان خبیس اعلام میکنه نجس اعلام میکنه مثل همین خون مثل میتا اون دیگه چیه است، حرام است. رضا الله میفرماید قل احل لکم الطیبات حلال هستن برای شما طیبات حلال هستن پاکی و وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما ما علمکم الله و اینجا بحث شکار هست که از شکار اونی که شما آموزش دادید من الجوارح جوارح جمع جاریه هست جاریه به معنی زخم کننده و به معنی کسبه هم میاید یعنی کسب کننده ببینید برای حلت شراب ببخشی حلت شکار علماء چار شرط ذکر کردند اول اینه که حیوانی که شما میفرستید، اون حیوان تعلیم یافته باشد اون حیوان تعلیم یافته باشد دوم اینه که شما ارسالش بکنید از خود نرود مثلا اون سگی اون تازی که سگی شکاری که جلوی خانه هست خودش شکار را می بیند و از خود می روید این حلال نمیشه اگه او را بکشد باید شما اشاره بکنید اما تعلیم اولی تعلیم بود نه تعلیم یافته باشد شکاری شما تعلیم در سگ و غیرو این هست که او بره اون شکار را شکار بکند خودش نخورد اگر خورد تعلیم ندارد تعلیم یافته نیست معلوم میشه برای شما نکشته برای خودش برخی گذاشته چون نتونسته تا آخر بخورد و تعلیم در پرنده میگویند این هست پرنده های شکاری مثل شاهین باز وقتی که میفرستی بره وقتی که داره میره صداش کنی دوباره برگردد این علامت تعلیم در پرنده باز است. خب این پس اولین شرط تعلیم هست دومی شرط ارسال هست که شما اون را بفرستید سومی شرط اینه که اون شکار را نخورد بگذارد چهارمی شرط اینه که وقتی که میفرستید نام خدا را بفرست بسم الله الله اکبر بگو مثل ذبی وقتی که میکوشید لذا الله می فرماید وما علمتم من الجوارح آنچه که شما آموزش دادید از جوارح یعنی از کواسب یا از زخم کنند که برند حیوان را زخمی بکنن مکلبین این شرط دوم است در حالی که شما اونها را بفرستید. تعلمونهونم از ما علّمکم الله. این شرط اول هست همون توضیحش هست. اونها را تعلیم بدین همون طور که الله شما را تعلیم داده. و عرض کردم تعلیم حریک را. شرط سوم فکر مما می‌مما امسکنا بخورید از آنچه که گذاشتم برای شما. اگر نگذاشته بودن یا کم گذاشته بودن حلال نیست. شرط چهارم و اذکر اسم الله نام اللہ را برآن واتقو اللہ این نسخه اوالعمالس از اللہ پر وعد اشتباشید ان اللہ سریع الحساب ہمانا اللہ تعالیٰ زود حساب گیرندیس این نسخه تقواس. خب پس قل احل لکم الطیبات اینے حال اللہ تعالیٰ می فرما اليوم احل لکم الطیبات اینکے سبار اليوم اليوم يأس الذين كفروا اليوم أكملتوا لكم دينكم اليوم أحل لكم الطيبات مر... معلوم الشيكي همي اليوم مربوط بشي هست مربوط بتحليله تحريم هست اليوم أحل لكم الطيبات امروز طيبات براي شما حلال قرار گرفته لذا هر طيب حلال هست وهم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعام کسانی که کتاب داده شدن یعنی یهودی و نصرانی حلال است برای شما و طعامکم حلال لهم مذبوحه شما انها هم بر اونها حلال میاره اونها میخورند همچنین و المحسنات من المؤمنات برای شما حلال است ازدواج کردن با زنهای پاک دامن از مؤمنات و همچنین زنهای پاک دامن از اهل کتاب و المحسنات من الذين اوتوا الكتاب از انهایی که کتاب دادی شدن ببینید در طعام گفت طعام شما برای انها طعام برای شما اما در نکاح فقط زنهای انها برای شما جائز نیست که زن مسلمان را به کتابی بدهند. والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتو الكتاب من قبل که که قبل شما من قبل کم این هست که کسی بگه که بعد از رسول الله ب من پیغمبرم مثل قادیانیه مثل بهاییه میگم ما کتاب هم داریم، اهل کتابم نه، اینا اهل کتاب نیستند. اهل کتاب به کتابهای اطلاق میشه که قرآن اون کتابها را قبول داره. لذا ازدواج با اونها من قبل کم بیانگر این هست. اذا آتیت اجورهن محسنین غیر مصافهن در چه صورتی ازدواج با این مؤمنات یا با محسنات اهل کتاب جائزه که شما بدهید به آنها مهر آنها را در حالی که هدفتون محسنین پاک دامنی باشد غیر مصافهن به غیر از صورت‌های زنا ولا متخذی اخدان و نگیرندگان دوستی مخفیانه یعنی زنای ظاهر و زنای باطن و مقفی هیچ کدوم مد نظر نباشد و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله اللهمی فرماید که هر کسی کف بکنه با ایمان بعد از این که الله ایمان را انایت کرده کف بکنه تمام اعمالش زایمی شه یعنی این در رابطه با مرتد هست و و هو في الاخره من الخاسرین این انسان در آخرت از خسار کنندگان هست خساره خب تا اینجا احکامی در رابطه با معکولات بود محرمات و محللات اما بعد از این احکامی در رابطه با نماز میاد و بر اساس گفته شیخ این یکی از امور مصلح است امر مصلح در لابلای امور دیگر مثل امور انتظامی میاد که اینها را انسان عمل بکند، عمل به امور انتظامی چی میشه؟ آسانتر میشه مثلا اینجا دستور به نماز است اما مقدمات نماز که تحارت باشد وضو باشد غسل باشد همین ها بیان شده الله می فرمید یا ایوها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید اذا قمتم الی صلاة هرگاه گاہ که برخواستید بسوی نماز یعنی اراده نماز کردید فاغسلو وجوهکم و ایدیکم انتحارتی حقیقی مجازینیست حقیقی است. یعنی وزو بشورید چهره هایتون را و دس هایتون را الى المرافق تا آرانجها ومسحو برؤوسكم ومسکونی سرهایتون را و لکم الى الكعبین و بشورید پاهایتون را تا کعبین تا ببین وارجو منصوب است و این نصب بیانگر این هست که این اتفاس بر وجوهکم قرائت مشهور همینه فقسلو وجوهکم و ایدیهکم و ارجل پاها را بشورید حالا اگر واقعا اتفاس بر اون چرا بعد از کم آمده؟ بخاطر که الله عزوجل اینها را به ترتیب ذکر کردن ببینید فرائض وضوع هم این چهار تاستند ترتیب اینطوری که اول چهره را می شورند بعدا دستهار تا آرنج بعدا مسح سر هست بعدا شستن پا هست لذا به خاطر ترتیب الله تا را این گونه ذکر فرموده و بعضی میگند که ارجلکم هم خانده میشه، شه قرائتی هست و ارجلکم اگر ارجلکم اون باشد اتفس بر روسکم نه بلکه این جر جر جوار هست به خاطر جوار و همسایگی هست و الا حکم همونه خب چرا اصرار داریم بر این حکم به دلیل اینکه قرآن را حدیث تشریح میکنه تفسیر کند اون چیزی که در احادیث فعلی هست در تمام اون احادیث هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون را شستند مگر زمانی که موزه به پاش بود خف بود مس می کرد بعضی میگه گه اون جر در صورت مس هست در صورت موزه هست در صورت خف هست یعنی پاها را بشورید اگر موزه داشتید مس کنید خب اون وقت وم صحوب روسیکم و ارجالیکم پس کم کمتر قراءت غیر مشهوری هست کمتر اتفاق میفته چون موزه کمتر هست و دیگه در احادیث قولی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ویل للاعقاب من النار ویل للعراقيب من النار این عقب پشت پا را میگن یا عرقوب همین رگ کلفتی را میگن که بعد از اون کوز پا حساب به یک کسی وضو گرفته بود یک مقدار خشک بود آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود ويل للعقاب من النار لذا این احادیثی که در اونها وعید آمده و احادیثی که در اونها رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش را شستے همه اینها بیانگر این هست که شستن پاها فرض شستن پاها لازم هست کل پا رو شسته بود به اندازه یک ناخن مانده بود ان حضرت صلی الله علیه و سلم چنان وعیدی برایش بیان کرد و این حدیث هم در حد خبر واحد نیست در حد مشهور و متواتر چندین روایت آمده این مراد از ارجو شستن پاها هستا کعبین و این کنتم جنوبا فطح اگر جنابت داشتید خوب پاکیزگی کنید فطح را تفسیر کردن یعنی فقط تسلو چون خوب پاکیزگی کردن به معنی غسل است اما انها تهارت حقیقی بود هم وضو از حدث اصغر هم فطهرو غسل از حدث اکبر از جنابت بعد از این میرسیم به طهارت مجازی یعنی وقتی که آب نباشه تیمم اما تیمم برای هر دو یکی است تیممی که قائم مقام وضو است و تیممی که قائم مقام غسل است هر دو یک تیموم است. الله می فرماید و این کنتم مرضا اگر مریض بودید که استفاده آب برای شما زرار داره او علا سفر یا بر سفر بودید که آب محیانیست او جا احدم و انجا هست او به بمنه واق قبلنی آیرقان دید سفر بودید و جا احدم من کم من در سفر بودید و یکی از قضای حاجت آمد از دست آمد اولا مستمون النساء یا زن ها دست زدید دست به معنای لمس هست نزد شافعی رحم الله یا به معنای مجاز نزد ابو حنیفه فلم تجدوا ماء نیافتید آب نیافتید فتیمموا صعیدا طیبا پس قصد کنید صعیدا خاک پاک سعید ما يسعدو على الارض را میگن سر سطح زمین سطح زمین خاکه خاک پاک قصد کنید این خاک را وقتی که قصد کنید و دست خاک بزنید دوتا مسح است فمسحو بوجوهیکم و عیدیکم منه شما مسکنید چهرائتون را و دستهایتون را از همون خاک پس از اون سعید این سهرت مجازی هست، قائم مقام وژو هست یعنی تیمم اما بعد از این الله تعالا حکم حکمت مشروعیت تیمم را بیان می‌فرماید که این که را برای شما دستور دادیم، به خاطر اینکه الله می‌خاد آسانی باشد سختی نباشد. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. الله نمی‌خاد که بر شما حرج قرار بدهد. شمارا در تنا قرار بدهد ولیکن يريد ليطهركم اما الله میخوادتاک شما در هر صورت پاد کند وليتم نعمته عليكم و شما را تکمیل کند بر شما نعمتش را با بيان کردن شرائع اسلام احکام و دستورات اسلام لعلكم تشکرون اینجا ترغيب شکر است این احکام آسان و احکام یسرا که مواجه هستید با اینها و انجام می دهید شاکر خدا باشید شکر خداوند عز و باشید خب در این میان احکام آمدند هم احکامی در رابطه با محرمات و هم محللات و هم احکام تهارت و وضوح مجدد به مضمون سابق برمی گردیم اوفو بالعقود اینجا الله تعالی مجدد اون عقود را و مواسیق را و اهد و پیمان هایی که بستید اونها را یاداوری می فرماید و اذکرو نعمت الله علیکم ای مسلمانان شما یاد کنین نعمت خدا را که بر شماست نعمت خدا مفسرین نمیشنه هی نعمت الاسلام بزرگترین همه این احکام به توفیل اسلام بود یاد کنید اون نعمت ها را و میثاقه الذی واسقکم به و پیمان خدا را. اون پیمانی که خدا با شما بسته یک پیمان پیمان الست است الست بربکم قالوا بلا و فرمود بعدن انبیاء را میفرستم و یک پیمانی این است که ما اسلام آوردیم اسلام آوردن برای ما چی پ... آ... را... چه چی چیزی را آ... ثابت میکنه پیمانی چون که لا اله گویید این لا اله یک تعهدی برای شما ایجاد می‌کنه این چیزایی از شما میخواد چه مسلمانم مسلمانان بل بلرزم که دانم مقتضای لا اله را که لا اله از من چه میخواد تعهدی هست بعضی میگویند که مراد از این پیمان پیمانهایی که صحابه بستند بیعتی که صحابه در عقبه کردند با رسول الله صلی علیه و سلم قبل از هجرت بعضی میگن که بیعتی که در رزوان شجرت رزوان کردند مختلف اقوال ولی حق این است که هر چیزی که برای ما تعهد ایجاد میکنه اونها را شامل میشه و همچنین پیمان هایی که شما با خدا میبندید البته اهد و پیمان کدوم پیمان بر شما واجب میشه از نظر فقها اون پیمان هایی که از جنس اونها واجب دارین از جنس اونها چی واجب داری مثلا شما میگی خدایا اگر این مریضم خوب شد بر من هست که درکت نماز بخوانم. خب آید نماز دارید که بر شما واجب باشه؟ بله نمازهای دیگه واجب هست نه. بر من هست که روزه بگیرم. بر من هست که حج برم این نظر درست میشه. به خاطر اینکه از جنس همه شما چی دارید؟ واجبش را دارید. اما اگر به چیزی شما ناظر بکنید که از جنسی واجبش را ندارید مثلا میگید که اگر این مشکلم حل بشه بر من هست که از فلان مریض عیادت بکنم حالا عیادت مریض واجب نداریم استهبابی داریم لذا این نظر صحیح نمیشه اگر اینطور بگید فلان مریض را این مبلغ بدم خب ما انفاق واجب داریم اون وقت واجب میشه این مبلغ اگر فلان گوسفند را بکشم خوب گسفند کشتن واجب داریم قربانیه یا هدایه که برای حج است. بنابراین اگر پیمانی با خدا بسته اون پیمانی که از جنس او وجودش را داریم الله می فرماید. واذكروا نعمة الله عليكم ياد كنين نعمة الله ركي نعمة اسلام باشد بر شما وميثاقه الذي واثقكم به وميثاق وپايماني كي واثقكم به باشد شما بر آم پايمان بسته اذ قلتم سمعنا واطعنا اون پايماني كي بوقت التزام شما قفتيد سمعنا مع شنیدیم واطاعت میکنیم واتقوا الله از الله بهترین ترغیب اخلاص است. یعنی همه چیز برای خدا باشد. ان الله علیم و به ذات صدور، به این دلیل گفتیم ترغیب اخلاص است. خدا از راز سینه‌ها شما می‌دونه. می‌دونه نیتی انجام می‌دهید. یا آیا هالذین آمنوا کنوا قوامین لله شهدا قبل القصد بازم تأکیده که شما قیام کنید برای ادای حقوق الله قوامین لحقوق الله مراد است بر و حقوق الله را انجام بدهید یا ایها الذين آمنوا ای مؤمنین کو نو قوامین شما باید قائم کنندگان حقوق الله لله برای الله در حالی که گواهی بدهید به انصاف گواهی به انصاف <تصفيق> الان بعضی گفتن قوامیننا لله اشار به حقوق الناس بالقسط اشار به حقوق العباد است ولی در حق الله هم قسط داری قسط در حق الله توحید است و در حق الله چی است شرک است ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا وشما رب رنگ اختنک نکند تحریک نکند نشود بغض قوم مبنی بر اینکه اللہ تعادل شما عدالت نکنید یعنی حتی با دشمنان چون بغض دارید ظلم نکنید این تعلیم اسلام است بی عدالتی نکنید اعدل عادل باشید عدالت کنید هو اقرب للتقوی این عدالت بسوی تقوی نزیفتر است ولو اینکه عدالت با دشمنان باشه سبحان الله چقدر در اسلام به عدالت تاکید شده عدالتی که از ارکانه مهم هست و تقی الله این نسخه عدل است نسخه عمل است از خدا اگر بترسی عادل میشی همه بندگان خدا چه مسلمان چه غیر مسلمان حقوقشان را ادا میکنید ان الله خبیر بما تعملون نسخه تقوا الله تعالی خوب خبر دارد به اعمال شما لذا اگر شما به پیمانها عمل کردید وعده بهشت برای شما هست اگر نکردید وعده وعید هست وعده الله الذين آمین وعملوا الصالحات وعده فرموده الله عزوجل آنهاي رکی ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن الله با انها وعده فرموده لهم مغفرت و اجر عظیم برای انها مغفرت بخشش از از جانب الله و برای انها اجر عظیم از پاداش بسیار بزوج حست أما والذين كفروا انبشارة بدون تخوف والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أن هؤلاء كفّ آيات ما رأناسبت بآيات انها انكار کردن آيات را و كردن کردن على مال عند أصحاب جهنم عند الله فنابدئ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبصتوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن إعذاء موزع سابق است هم الآن شو ما خاندید وازكروا الله عليكم ومساقه الذي واسقكم به نمت خداراتكنید پیمانها را هم یاد کنید این یاد کردن نعمت سبب بشه که به پیمانها چی کنید عمل کنید ببین الانسان و عبیدل احسان وقتی که من یاد کنم که هر چی دارم از رب محسنم دارم از رب مهربانم دارم این یاد کردن مرا وادار میکنه که در حضور او کرنش کنم تعظیمش بکنم عبادتش بکنم پس الله تعالی میفرماید نعمت را یاد کنید و بعد از این که نعمت را یاد کردید پیمانی که با خدا دارید چه اون پیمانهایی که خدا خودش بسته با شما و بر شما واجب کرده چه هایی که شما نظر کردید همه را به جامعه آورید اینجا الله تعالی دوباره نعمت را ذکر می فرماید و خاصتا یک نعمت را اون نعمت چیه اینه که دشمن میخواست که دست به سوی شما بلند کنه ولی خدای تعالی دستش را نگه داشت و شما را حفاظت کرد کدوم واقع مراد است چندین واقعه اینجا اهل تفسیر بیان کردند همه اینها میتونه مراد باشه. خیلی از آیات هستند اشاره به واقعات زیادی دارن مثلا اینجا من دو تا واقع را عرض میکنم یکی اونه که برای شخص رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق افتاد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در یکی از غزوات زیر درخت استراحت کردند شمشیر را آویزان کردند یک عربی از کفار آمد شمشیر را آیسته برداشت یهو شمشیر را از نیام در آورد و به رسول الله گفت من یم ناو او نی کی هست که بیتونه تو را از من نجات بده حفاظت بکنه. آن حضرت صلی الله علیہ وسلم فرمود الله در بعضی روایت هست که محض اینکه اللہ گفت اون لرزید و ترسید و شمشیر از دست افتاد رسول اللہ شمشیر را برداشت گفت حالت تو رکی از دست من حفاظت میکنه اون گفت که تو بالاخره بنده باش که سخت،, سخت گیر نباش آسان بگیر منظور اینه که من اشتبایی کردم مرا نزم حالا این لطف پروردگار بود که شما را حفاظت کرد بعضی این واقعه را گفتند بعضی واقعه دیگر که اونجا با توجب این که سیغه جمع هست یا یوالذین آمنو اون اولی مربوط به رسول الله گرچه سلامتی رسول الله برای تمام امت هست خطری که برای رسول الله بود برای تمام امت بود ولی سیغی جمع هست این دومی بیشتر و امثال این دومی بیشتر با تفسیر آیب مطابق به نظر می این این است که الله تعالی اشاره می فرما جریانی که شما دیروز خواندید که مسلمانان یه روز نماز ظهر را خواندند در جبهه کفار حسرت خوردند که چه فرصت اطلاعی بود از دست دادیم اینا وقتی که نمازشون را بخونند اصلا غیر از نماز به چیزی دیگه نمی اندیشند اصلا از این دنیا میرند بهترین فرصت بود که از اون غفلتشون استفاده بکنیم اونها را میزدیم ولی از این فرصت استفاده نکردیم بعضی گفتن خب تنها این نمازشون این سالان اصل یک نمازی دیگه دارند. اون وقت این کار را میکنیم. آمادگی کردند. آمادگی کردند الله عز و جل آیه نازل فرمود. که معاذب باشید کفار حمله میکنن. نماز خوف را الله تعالی مشرو فرمود. یک گروه پشت سر رسول الله، یک گروه وجاه عدو، اونا وقتی که میخواستند دیدن نا اینا از قبل با خبر شدن، آماده باشن، سنگر گرفتن، شمشیر بیده، صف بسند در مقابل ما لذا نتونستن کاری بکنن. بعضی میگن این جریان را اشاره دارد. علا ای حال از عموم آیت بفهمید که هر آنچی که سبب چی میشه،, میشه، نجات ما میشه و الله تعالی ما فضل میکند. اون هم مراد استند. یا ایوها الذین آمنو، ای مؤمنین اذکرو نعمت الله علیکم یاد کنین نعمت الله را بر خود کدوم نعمت اذ هم قوم ان یبسطو ایلیکم ایدیهم زمانی که اراده کرد قومی که ان یبسطو ایلیکم ایدیهم اینکه دستهای خودشون را بسوئی شما دراز کنند دست درازی کنند فکف ایدیهم عنکم باز داشت الله دستهای را راز شما لذا اینیمت قابل یاد و واتقو الله از الله بترسید الله را در نظر داشته باشید اولین تقوی دومین توکل اینها اصول فوز و موفقیت و علی الله فلیتوکل المؤمنون فقط و فقط بر الله عزوجل باید توکل بکنن تمام مؤمنان تمام اهل ایمان در آیات گذشته الله عز عزوجل بما مؤمنين یاداوری فرمودند واذکروا نعمت الله علیکم و ميثاقه الذی به یاداوری نعمت های خدا و پیمان خدا پیمانی که با خدا بستیم به اون پیمان پایبند باشیم. حال در این آیه خدای از زوجال نمونه از نقض عهد را بیان می‌فرماید. دو تا نمونه بیان میشه. یک نمونه مال یهود هست و یک نمونه مال مسیحیان است. گویا به ما مؤمنان گفته میشه که شما مثل یهود و نصارا نباشید پیمان شکنی نکنید یهود پیمان بستند نتیجه چی شد نصارا هم پیمان بستند نتیجه چی شد حالا پیمان یهود چی بود پیمان یهود این بود که به وحدانیت خدا ایمان بیاورند و آنچه که در تورات به اون عمل کند ان الله اخذ ميساقهم ان يعبدوه و لا يشركو به شئ و ان يعملو ما في التورات من الاحکام والتکالیف این پیمان را انها شکستند شما مسلمانان نکنید مثل انها نتیجه را ببینید نتیجه بسیار نامطلوبی. و بعد الله تعالی پیمانی که مسیحیان شکستن اون را داوری می‌فرماد. الله می‌فرماد ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائیل. همانا الله الزّوجال پیمان گرفت از بني اسرائیل و بعثنا منهم اثناء عشر نقيبه و ما تعین کردیم از آنان دوازده نفر را به عنوان نقيب، نقيب سردار هست کبیر القوم النقیب کبیر القوم کرتبی میگه تفسیر خازن میگه قال ابن عباس النقیب از زمین زامن منظور هست هر در هر قومی الله تعالی یک نفر را به عنوان زامن مسئول بزرگتر به تعبیر ما رئیس سردار تعیین کرد والله عزوجال خطاب فرمود و این خطاب از طریق نقيب به افراد قوم رسید وقال الله اینی معكم الله فرمود من با شما هستم معیت معنوی الله به معنی نصرت به یاری است به نجات است من عزت و سربلندی هست این وعده خدا اما شما چکار بکنید؟ بکنید لئین اقمتمو الصلاة اگر نماز را برپا داشتید و آتیتمو الزکات، زکات دادید و آمنتم برسولی و همه رسول, رسول من ایمان آوردید بازی از رسول را اونها ایمان نیاوردند، به عیسی ایمان نیاوردند، به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نیاوردند. وعذر تموهم و اون رسول را یاری رساندید، اونها را حمایت کردید یاری رساندید. و تمو الله قرض حسنا و بخداوند قرض دادید قرض حسنه، قرض الحسنه منش بلاعواز هست، صدقه هست بعضی میگه حسنا، اشاره به این است که یعنی دنبال چی نباشید عواز نباشید که خدا همین جا ببلغتون را برگردانه به شما حسنه به این من است. بعضی میگه حسنه یعنی اون صدقه که میده در اون اخلاص باشد حسنه اشاره به ح... چی هست به اخلاص هست قرض الحسنه یعنی برای خدا باشد برای ریا نباشد برای هدف دیگه نباشد خب اگر شما این قرض الحسن علاوه زکات است یعنی بقیه صدقات اگر شما به اینها عمل کردید من خدا چکار میکنم وعده الهی لا عنكم عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار حتما حتما کفار می کنم دور می کنم از شما سیئات را این جزای سیئات را و لا ادخلنکم و داخل می گردانم شما را در جناتی کی جاری هست از زیر کاخا قصورش نرعا فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ظل سوا السبیل هر کسی که کفر کرد بعد از این ناسپاسی کرد ناشکری کرد او از راه درست و از راه راست گمراه شد عزیزان انایت بفرمایید که بنی اسرائیل این در واقع تذکر و تلنگوری به ما مسلمانان است بنی اسرائیل نقض عهد کردند نتایج نقض عهد چی بود در آیه بعدیش ما می اگر خدای نا کرده افراد این امت اگر نقض اهد بکنن پیمانی که با خدا بستن بشکنن همین نتایج برای اونها هم هست و شده بعضی از این نتایج <تصفح> نتایجی که خدا ذکر می‌فرماید یک لعنت لعناهم دو قساوت قلبی دل هاشون سنگ میشه سه تحریف یعنی کتاب خدا را تغییر می دهند چار نسیان تعلیمات اون چی که خدا یاد داده اونها را فراموش می کنند پنج خیانت حالا ما می بینیم اینها بعضا هستند خیلی جا می بینیم که مسلمان ها بالاخره مترودند نصرت خدا برایشون نیست قصوات قلبی دارند سنگدلی دارند آیات الهی را تحریف میکنن تحریف لفظی کسی نمیتونه بکنه تحریف معنوی میکنن منظور اینه مراد اینه این نباید باشه این باید باشه و فرامین خدا را فراموش کردند عمل نمی کنند اجرا نمی کنند خیلی از دستورات به فراموشی سپرده شده خیانت زیاده لذا اون نتایجی که الله تعالی در خیانت یهود بیان میفرمایند اونار می بینید امروز هستند اینا تذکرن برای ما حالا ببینید که چیکار کردند یهود و نتیجه چی شد فبما نقضهم میثاقهم به سبب پیمان شکنی آنها به سبب نقض آنها پیمانها را شکستند لعناهم ناهم این نتیجه ول. ما اونها را لعنت کردیم، نفرین کردیم، از رحمت‌های خود من دور کردیم. دو. و جعلنا قلوبهم قاسیا. مدل های اونها را سخت کردیم. سنگ دلشون نرم نشد. سه. یوحربو نالکلمه عموازعی. تحریف کردن کلمات الهی را از موازه از جایش تحریف لفظی هم کردن تحریف معنوی هم کردن بس قبلا گزشته چار و نسو الظم مما ذکرو فراموش کردن بخشی از تعلیماتی که تذکر داده دا شدند دا یعنی نسیانی تعلیمات الهی پنج ولا تزالو تطلعو على خائنتم منهم همواره تزالو به معنی همواره هست به معنی دوام هست منظور اینه که حالا خیانت جزه تب و اونها شده همیشه این کم خیانت می کند همواره مطلع میشید، شما بر خیانتی از آنان معلمنا أن الغدر والخيانة عادة مستمرة لهم ولأسلافهم كما يعلم من وصفهم بالتحريف وما معهم خيانة الا جزء اظنهم ان طبيعتهم هاذ جزء اخلاقهم هاذ هم وارم مطلع شيء بل خياناتي قليلا منهم هم اندكي كي استثناء ازند كساني كي ايمان آوردند عبد الله بن سلام واعوانش لذا این ها هستن بنابراین این خیانت یهود است اما فعف عنهم وصفح ان الله يحب المحسنین شما از انها را معاف کن و درگذر باش اللت اینه که خداوند محسنین را نیکوکاران را کسانی که احسان میکنند، الله دوست دارد شما به اونها تعرض نکن خب این نمونه اول بود نقض عهد کردند یهود نقض عهد کردند اما نمونه دوم را الله تعالی بیان می‌فرماید نصارا را اینا هم نقض عهد کردند نصارا هم جز بنی اسرائیل بودند درست اینها اینا به عیسی ایمان آوردند ولی اینها هم خیلی پیمان شکنی کردند الله تعالی نتیجه نقض عهد اینها را بیان می‌فرماید وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارًا از آنانی که گفتم ما نصرانی هستیم اخذنا میثاقهم ما پیمان اونها را گرفتیم ما اهد گرفتیم اما انها فنسو حظا مما ذکرو اینها فراموش کردند بخشی از آن چه که تذکر داده شدن بخشی را فراموش کردن مثلا ایمان به توحید ایمان به محمد صلی الله علیہ و سلم اینا را فراموش کردند نقض عهد کردند به سبب همین نقض عهدشون الله می فرماید فا اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم ما واقع کردیم بین آنها دشمنی و بغض را تا روز قیامت تا روز قیامت دینم با هم اختلاف دارند ببینید مسیحیان همیشه با هم اختلاف اختلاف در همه ادیان هست مسلمان با هم اختلاف داره یهودی با هم اختلاف داره اما نبین اندازه بقیه اختلافات اختلافات جزئی هستن نسبت به اونا اونا اختلاف دارند در رابطه با اصولشان در باره کلیات مثلاً یک گروه میگه سه خدا، یک گروه میگه نه همون ایسا این خداست و خیلی فرق میکنه نه یک گروه دیگه میگه نه فرزند خداست اینیت و تسلیت و ابنیت رش مخان دید و نصارا گروه های مختلفی در طول تاریخ بودند امروز مثلا ستا گروه هستند که اینا خیلی دیدگاهشون هایشون با هم دور هستند اصلا با هم نمینشینند همین کاتولیک ها که مال روم هستند و پروتستان ها و از کنم که یک گروه دیگری ارتدکس ها حالا اینا گروه های متفاوت و مختلفی که در اصول با هم دیگه فرق دارند و انجیل هایشون الان چندین نسخه بود الان به 4 نسخه همین 4 نسخه را پذیرفته این 4 تا نسخه هم چه با هم تفاوت داره پس اینها هم این نحوست چی هست نحسته نقض عهد است پیمان شکنی است الله می فرماید فاغرینا بینهم العداوه والبغضه این ادوات و بغض را که ما واقع کردیم تا روز قیامت این ضرر دینی است و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ان قریب الله به اونها خبر میده که چی کردند چرا اینها عهد را شکستند خدا خبر میده با چی با جزا و عذاب الله خبرشون میده لذا راه حل چیه بعد از اینکه نقض عهد این دو گروه را الله ذکر می فرماید پیمان شکنی این دو گروه را ذکر می فرماید الله عز وجل بعد از این ترغیب میده واقعیت ها را بیان میکنه الله اونها را دعوت میده تنها راه اینه که به این نبی که آخرین نبی هست و در های شما هم وحدش هم دید ولی شما پشت سر آختید اون راه. به این ایمان بیاورید ورید. الله می‌فرماید: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ای آل کتاب حمانت آمد برای شما رسول ما رسولی که یو لكم کثیره ما کنتم تخفو من الکتاب بیان می کنه برای شما بسیاری از آنچه که مخفی می کردی از کتاب مثلا توحید را و یا عفوان کثیر بسیاری را نادیده می گیرد چیزهای جزئی را قادجه اکم من الله نور و کتاب مبین علاوه از این رسول هم با این رسول از جانب الله آمده برای نور آمده نور یعنی چه واو تفسیری از یعنی کتاب آشکاری آمده این رسول با خودش چنین کتابی آورده یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام چنان کتابی است که الله هدایت می کند به وسیله این کتاب چه من اتبع رضوانه این مفعول اول یهدی هست هدایت میکند اون انسانی را که تابع رضای پروردگار باشه تابع دستور خدا باشه مفعول دوم کجا هدایت میکند السلام. اونها را هدایت میکند به راه راست به سبیل سلامتی به سبیلی که از همه خطرها در امان باشند و این حکمت اول کتاب است این فائده اولین کتاب است فائده دفم و یخرجهم من الظلمات الى النور بی الله بیرون می کند انها را استاری که های شرک و کفر و بدعت و بدبختی الى النور بی سوی نور توحید ایمان بی بتو با توفیقش این فایده دوم دو فایده سوم سو خلاصه و یهدیہم الی صراط مستقیم را راهنمایی میکند بسوی صراط مستقیم لذا اے کتاب چنین رسولی و چنین کتابی آمده اگر میخواهید از این همه اختلافات از این همه چند دستگی ها نجات کنید بیایید بسوی إن اما اهل کتاب چیکار کردند نیامدانند و اهل کتاب در رابطه با اونها که گفتند مسيح و خدا یکی است مسيح و خدا یکی است الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا هم انا كفر کردن کسانی کی گفتند ان الله هو المسيح ابن مریم همانا الله او هست مسیح ابن مریم هست الله و مسیح ابن مریم عین همند هیچ فرقی ندارن فقط در آسمانها ها نامش الله در زمین اسمش مسيح است الله عز وجل می فرماید اگر یکی برای همین مسیح و برای مادرش و برای همه اهل زمین اگر خدا اراده حلاکت بکنه کی نجات میده؟ چنانچه مشکلات آمد برای مسیح مردم به او حجوم آوردند کی نجات داد؟ الله نجات داد. قل فمی عمل من, من الله شیعه بگو پستی کسی مالک از الله چیزی را یعنی کسی مالک هست مالک تصرفات الهی ان اراد ان يهلك المسيح ابن اگر الله اراده بکند که حالات کنه یعنی موت بیاورد بر مسیح ابن مریم و امه بر مادرش و من فی الارض جميعا و تمام اونای که در زمین است بر همگی موت بیاره کی میتونه جلوی خدا رو بگیره کی تصرفی داره هیچ کس نداره داره ان تصرف فغت وفغت برائي الله ولله لا اسى ولا امه فغت برئيس الله است ان تصرف ولله ملك السماوات والأرض فغت وفغت برائي الله بادشاهي آسمانها وزمين وما بينهما انت كما بين آسمانها وزمين يخلق ما يشاء هرچی که او بخواهد خلق میکند لا ایسا و امه ایسا ما و مادرش خودشون مخلوقند والله علا كل شيء قدیر الله بر چیز قدیر است ایسا و مادرش نیستند اونا مقدورند الله قدیر است حالا ببینید هم پیمان خودشون را شکستند به توحید ایمان نیاوردند به رسالت ایمان نیاوردند و چه خباست های دیگری داشتند هم یهود هم نصارا حالا اللہ تعالی بیشتر اینها را عطاب می بیشتر سرزنش باوجود این همه کفر باوجود این همه نقض پیمان شکنی و تمام خباست ها و فسق و فجور بعض هم میگه ما محبوب خدایم ما از مقربان خدا وقالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤ او. و نصارى میگن ما ابناء الله هستیم. اینجا ابن به معنای محبوب است و احباؤ او تفسیرش هست. ما ابناء الله هستیم یعنی محبوبان خدا هستیم. خدا مارد ما رو دوست داره چون که ما از نوادگان بندگان خاص او هستیم ما از پیغمبر زادگان هستیم آقا زادگان هستیم الله تعالی می فرماید که اگر این چنین است چرا خدا شما را در طول تاریخ عذاب میداد به بخاطر خباست های شما بخاطر نقض عهد شما بخاطر شرک شما قل فلی من يعذبكم بذنوبكم بگو پس چرا خدا شما را عذاب میده به سبب گناهانیتان چرا؟ بعضی میگن در آخرت چرا خدا شما را عذاب میده؟ بل انتون بشر ممن من خلق بلکه واقعیت اینه که شما بشر هستید از اون بشرهایی که الله آفریده با بقیه بشر فرق ندارید در برای شما هم هرچی قانون خدا باشه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هر کس را الله بخاطمی بخشش و هر کس را بخد عذاب میده چون مالک است پادشاهی مطلق است ولله ملک السماوات والارض وما بينهما واليه المصير پادشاهی ان فقط مالک خدا است ما بين اینها هم و مرجع هم فقط وفقط فقط الله هس. نبیت توی کسی دیگر اما مجدد دعوت ای اهل کتاب این خود ستایی را بذارید اینکه خود را ابناء الله و احبا میگید بزارید. ببینید یک فترتی گذشت فترت یعنی زمان انقطاع وحی سالهای سال پیغمبر نیامد قبل زود زود زود میامد سالهای سال پیغمبر نیامد یک فترت بزرگی بود زمان انقطاع وحی طولانی بود حالا بعد از این فترت پیامبر ما آمد در زمان شما آمد که فردا به خدا نگوید که کسی نیامد به ما بگه ما جا انا من بشیر ولا نظیر این بشیر هم هست نظیر هم هست آمد ایمان بیاورید. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل اي اهل كتاب همانا آمد برای شما رسول ما رسولی که بیان میکند یعنی وظیفه رسول است که بیان میکند توضیح میده على فتره من الرسل یعنی بر انقطاع از رسول بیش از 500 سال گذشته بود آمد که ان تقولو یعنی لالا تقولو یا من ان تقولو آمد از این که نگوید ما جا انا من بشیر ولا نذیر برای ما نه آمد هیچ بشیر مجد دهنده و هیچ بیم دهنده اللہ حجت را تمام می کند اعلام فرماد فقط فقد جا اکم بشیر و نذیر همانا برای شما آمد هم مجد دهنده کسانی که برای کسانی که قبول بکنند و هم بیمدهنده برای کسانی که انکار بکنند لذا شما حالا بیایید و ایمان بیاورید و اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم اذکرو نعمت الله علیکم اینجا خدای و نمونی نمونی از و یک نمونه را نمونه از زلط یهود بر ترک جهاد بیان می حالا ربتش با گذاشته به چند صورت میتونه باشه یکی اینه که در گذشته بحث نقض عهد یهود و نصاره بود یکی از صورت های نقض عهد همین بود ترک جهاد اونها را الله تعالی فرموده بود که تورات را نازل می کنم به تورات عمل کنید اما یکی از احکام تورات چی بود جهاد بود اونها عمل نکردند یک صورت ربط اینه یک صورت دیگر ربط اینه که بعد از ذکر عهد شکنی به اهل کتاب گفته شد که این پیامبر بعد از این مدت طولانی آمد ایمان بیارید فردا نگوید که بشیر و نظیر نیامد خب رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی امیدوار بودند که اینها ایمان بیارند اینجا اللہ تعالیٰ ذکر که اینها که به همون موسا ایمان داشتند موسا اونقدر اذیت کردند حرف موسا را گوش نکردند توجه نکردند اینا کجا به شما ایمان میارند یعنی گویا ذکر چیشون هست ذکر عدم ایمانشون ذکر خباثت هایشان حالا ببین موسی علیه سلام، اونها را دعوت میده به سوی جهاد اما قبلا نعمت های پروردگار را برای اونها بیان می و اذ قال موسی لقومه یا قوم زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم من اذكروا نعمت الله علیکم یاتکنی نعمت های الله را که بر شما هستند ارزل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا بدلیل اینکه قرار داد در میان شما انبیاء پدران شما را چقدر پیغمبر قرار داد اسحاق یعقوب یوسف خود ابراهیم موسی اینا همه پیغمبر بودند و جعلكم ملوکا و شما رب قرار داد از پدران اینها خیلی پادشاه بودند بعد از اینکه یوسف علیه صلی تا چندین سال نسل یوسف و اولاد بنی اسرائیل پادشاهی را بدست داشتند و آتاکم ما لم یؤت من العالمین ای قوم من اللہ به شما داد آن چیزی که نداد به هیچ که از جهانیان از عالمیان مثلا به به بنی اسرائیل اللہ از عبر سایه داد من داد را از سنگها جاری کرد چیزهایی که به شما داد به هیچ کسی نداد لذا حالا ای قوم دریمریم میریم به ارد مقدسہ و خدای از زوجل دارش ما را امتحان میکنه ببینید بعد از اینکه که از دریا عبور کردند فرعون غرق شد رفتند موسیل صلی و علیہ اولین کاری که شد تورات را دریافت کردند و بعد از اون ادامه دادند در صحرای سینه رفتند به طرف شام به طرف فلسطین بیت المقدس حالان جای اصلی هم شام بود اما کجا زندگی کنند؟ اون شهرهای مرکزی و شهرهای مقدس به دست عمالقه عم بود قوم از اون زمان که ظالم بودند و فلسطینی بودند اونها گرفته بودند بنی اسرائیل را موسی صلی اللہ گفت شما با این عمالقه عم یا با این فلسطینی ها باید بجنگید باید جهاد کنید و ارض مقدس را بیت المقدس را باید از چنگال شما نجات بدهید اما اینا چیکار کردند؟ اینا اول قبول نکردند بعدا سیدنا موسیٰ علیه السلام گفت که همین کسانی که سردار هستند دوازده تا تیره بودند دوازده تا سردار داشتند چون فرزندان یعقوب دوازده تا بودند این دوازده تا سردار برند یه بررسی بکنند بلاد را ببینند و اون قوم را ببینه از نزدیک بعد بیاین اینجا گزارش بدند اینا وقتی که رفتند اونجا دیدند چه بلاد خصبی هست چه سرزمین زمینای آبادی چه باغای چه چشم چشمزارهای اما دیدند که این قوم هم قوم بسیار تنومندی هست همینو امکانات دارند همینو اصله دارند تعدادشون خیلی زیاد هستند اینا با هم دیگه مشوره کردند این سرداران گفتم ما که بریم اونجا پیش افراد قوممون، این چیزها رو نگیم نگیم که اینا خیلی زور دارن خیلی قدرت دارند خیلی اسلحه دارن، اونا می ترسند جهاد نمیکنن، بریم فقط از آبادی این سرزمین ها از خصب این بلاد از این باغ ها و از این چشمزارها صحبت کنیم تا اونها علاقه من باشند و بیان بجنگند همه با خود این, این را تی کردند اما اینجا وقتی که برگشتند از این دوازده تا سردار ده تا خیانت کردند دو تا فقط که اینجا ذکرشون هست قال رجولانه دو نفر یکی که ارز کنم از فرزندان یهودا بود و یکی دیگر یکی یوشع بن نون و یکی کالب بن بی یوکنه این دوتا چیزی نگفتن از مردان تنومند بخت نصر و عمالقه چیزی نگفتن فقط به قوم گفتن بجنگید خدا چنین بلادی برش ما آماده کرد اما بقیه دهتای دیگه سرداران خیانت کردن ترسیدن اونا گفتن این نفی قوم جبارین خیلی زور خیلی ستم خیلی اینا امکانات دارن ما نمیتونیم قوم را ترسوندند، لذا قوم آماده جهاد نشد آماده جهاد نشد آخر صاف رفتم به موسی اعلام کردم موسی اگر تو میخوای که با ما جهاد کنی ما نیستیم تو و پروردگارت جهاد بکن آزاد بکن ما همینجا منشینیم بلاد را آزاد بکن و ما بعد از اون میاییم اونجا قرار میگیریم این آیت داشته باشی آیات را الله میفرماید یا قوم ادخلوا الارض المقدسه موسی به اونها گفت ای قوم داخل بشید به سرزمین های مقدس التي کتب الله لكم همان سرزمین های ک الله برای شما در لوح محفوظ نوشته که اونها مسکن شما هستند ولا ترتدوا على ادباركم بر نگردید پشت سر که فتن قلب و خاسرین شما ناکام و نامراد میشید خسار دینی و دنیاوی میکنید اما قوم چه جواب دادن قالو یا موسا این نفیها قوم جبارین گفتن ای موسا همانا در آن شهر قومی هستند جبار ستمگر وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها هم همانا ما حرقز داخل نميشبين حتى كي خارج بشبن فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أگر انها خارج بشب ما بعدن داخل ميشيم أما الدو نفر در تعيد موسى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما دو نفر گفتند از انهای که می ترسیدند از خدا يخافون الله از خدا می ترسیدند از انهای که انعم الله علیهما الله بوسیل الدین بر انها انعام فرموده بود انها بقوم گفتند ودخلو علیهم الباب ای قوم داخل بشید بر این قوم, قوم از شهرها بر امالکه از درها داخل بشید فإذا دخلتموه فإنكم غالبون و خدا شما داخل بشید شما غالب میشید شما را خدا پیروز میکند و الله فتوکلو این کنتم مؤمنین فقط و فقط بر خدا توکل کنید اگر مؤمن واقعی هستید نه ترسید برید وارد بشید شعر را بگیرید اما اونها چی گفتن قالو یا موسی ان لن ندخلها ابداً ما دام فیها ای موسیٰ ما داخل نمیشیم ابدا تا زمانی که اونها هستند. فذهب انت و ربک فقاتل انا ها هنا قاعدون برو و تو و ربت بجنگید شما دو نفر بجنگید ما اینجا نشستیم حالا این شما دو نفر بجنگید معنیش چی بود؟ این چند تفسیر داره بعضی می گویند که استهزان گفتم مسخره کردند قالوا ذلك استهانتا و استهزان به سبحانه و تعالی و برسوله علیه السلام و عدم المبالات به پروانه کردند یعنی گویا کفری بود این را تفسیر روح المانی نوشته ابو السعودم نوشته که اینها یعنی به صورت مسخره گفتند اما بعضی میگن مسخری نیست اونا این اعتقاد را داشتند چون آیات را دیده بودند نصرت خدا را برای موسی دیده بودند اینه گفتند که تو اگر تنها بری رب به تو تو را کمک میکنه ما را نبر و یقین داشتند همونطوری که در اون نامه شما خاندید که اون صحابی نوشت حاطب ابن ابی بلتعا به مشرکین مکه سوگند یاد کرد که اگر از رسول الله تنها بیاد خدا او را یاری میکند این اعتقاد را داشت اونها هم این اعتقاد را داشتند که موسی تنها بیاد چون رب با او هست موسی را رب چی میکند یاری میکند این تفسیر دوم است معنا حقیقی و الوجه فيه ان, ان يقال اذهب انتا و ربکا یعینو که علا تو رب بریت شما را رب کمک میکنه ما نمیتونی ما میترسی پس تمسخور نبود حقیقتی بود که اونها اعتقادش را داشتند این دو معنا هست یک تفسیر سومی هم هست میگن که مراد از رب رب مجازی هست رب حقیقی نیست برادر بزرگ را هم رب میگویند کنایه از برادر بزرگ هارون است یعنی شما دوتا برید خدا شما را کمک میکنه ربک سید و هو اخو کال اکبر حارون این بازی گفتند برادر بزرگت هارون شما دو نفر برید اما موسیٰ علیه سلات و السلام وقتی که این پاسخ را دید موسا لسلات و السلام نامید شد و دعای کرد که در این دعایش یعص بود گفت بار هر چی که پیام تو بودن من به این قوم رساندم وظیفه را انجام دادم اما بیشتر از این من مالک نیستم مالک خودم هستم و برادرم هستم قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی گفت ای رب من همانا من مالک نیستم مگر مالک خودم هستم نفسم هستم و برادرم هستم ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین جدایی بی انداز بین ما و بین قوم فاسق ما دیگه از هم جدا کن، اینها از من حرف گوش نمی کنند الله عز و جل فیصله کرد فیصله چی سرگردانی بلا تكلفي زلة قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة فالمدهمان إن قرية يعني بيت المقدس حرامة برآناً تاچهل سال يتيهون في الأرض سرقرداناً در زمين فلا تأس على القوم الفاسقين تو اندوهی نباش بر قوم فسقین نراحت نباش این قومی هست که فسق میکنه تمرد و سرکشی میکنه اینا را خدا عذاب میده تو همین بیابان سرگردان سرگردانی به چه معنیه چه بعضی از مفسرین میگن سرگردانی به این معنی که از صبح حرکت میکردن میرفتن میرفتن شب دوباره همون جای اول ولی این زیاد به ذهن نمیخورد چون اونا اراده رفتن نداشتن همین جا بلا تکلیفی نه حکومتی داره، نه قدرتی داره، نه شهری داره، نه پستی داره نه عزتی داره، همین سرگردانی هست یعنی یه قومی که بر سرنوشت خودش حاکم نباشد اون قوم عذاب خدا برو است. اون سرگردان هست لذا موسیٰ علیه و در همین میدان همین جا وفات کردند الله تعالی هم حارون را ازشون گرفت هم موسی را وقتی که خداوند فرمود همینجا شما میمانید اطراف کوهها بودند موسی و هارون رفتند همون کوهها عبادت کردند و قوم همینجا تو میدان سرگردان بود بعد از مدتی موسی از کوه پایین آمد و خبر داد که برادرم هارون وفات کرده و من همونجا دفنش کردم بعد از مدتی موسی علیه السلام هم وفات کرد لذا الله تعالی این قوم را سرگردان کرد این نسل همین همینجا مردند از بین رفتند نسل جدید آمد جوانها بزرگ شدند اونها آخر این سرگردانی و این پریشانی را دیدند این زمان یوشه علیه السلام به پیغمبری رسید به یوشه علیه السلام گفتند که شما کسی را تاین کن به عنوان فرمانده جنگی ما آماده میشیم می جنگیم یوشه علیه السلام دید وقتی که قوم برای جهاد هستند جهاد کردن و انها را شکست دادن دو بیت المقدس را فات کردند. لذا حمینه که الله فرمود فلا تأس على القوم الفاسقين شما بر قوم فاسق اندوگین نباشید وطلو عليهم نب ابني آدم بالحق واقعی دیگری را الله بیان می الله می بخوان بخان بر انها تلاوت کن خبر دو, آد دو فرزند آدم را بحق دو فرزند آدم حابیل و قبیل ان که اسماشون در روایت ها و احادیث آمده حابیل و قبیل هستند اینجا اشاره به این هست که تنها خیانت از اغیار و از غریبه ها نیست گاهی خود خودی ها هم چی می کند خیانت میکنند گاهی برادر به برادر خیانت کند لذا این دو برادر قابل دشمن شد با هابیل هرات چرا دشمن شد الله بهتر میداند اون چیزی که از قرآن معلوم هست همین قدر که اینجا هست بنده توضیح میدم اما این روایتی هم هست این روایت بیشتر از اسرائیلیات گرفته شده لا نصدق ولا نکذب این همین که معروف است که سیدنا آدم علی الصلاه و السلام هر روز الله عز از هر شکم به او دو تا می میداد یک پسر و یک دختر و این پسر و دختری که از یک شکم بودن برای همدیگه حلال نبودند از دو شکم وقتی بودند این پسر برای دختری که از اون شکم بود یعنی از اون حمله اولی بود جایز بود و همچنین بالعکس حالا دو تا فرزند که متولد شده بودند یکی حابیل بود یکی قابیل هر دو از دو شکم از اون شکمی که قابیل متولد شد از اون حملی که قابیل متولد شد خواهر داش به نام اقلیما و از اون حملی که حابیل متولد شد خواهر داش به نام لیوذا حالا باید چیکار میکرد باید قابل با لیوزا که خاهر حابیل بود ازدواج میکرد و حابیل با اقلیما که خاهر کی بود قابل بود ازدواج میکرد برعکس ولی چون خاهر قابل زیبارو بود و خاهر حابیل اونقدر نبود اون نمیخواست با خاهر حابیل ازدواج کنه میخواست با قهر خودش ازدواج کنه اینجا بود که گفته شد خب صدقه بدید صدقه بدید اگر صدقه هر کس قبول شد اقلیما مالی او هست قابل چون بخیل بود این مقدار ای کمی گندم به عنوان صدقه داد و حابیل یک قوچه چاغ و فربید صدقه داد آتشی که از آسمان آمد صدقه حابیل را قبول کرد لذا اقلیمه و مالی او شد این سبب دشمنی شد سبب حسادت شد که چرا اون مقبول است و من مقبول نیستم به همین دلیل او را کشت حالا ما نمیتونیم اینا ارز کنم که کل داستان را تایید بکنیم یا تکذیب بکنیم اما اون چه که بعضی از محققین میگویند و شیخ ما هم همین رو ترجیح میده اونه که از خود داستان برداشت میشه از خود آیات برداشت میشه آیات را که من ترجمه بکنم شما دقت بفرمایید اینطور معلوم میشه قرآن فقط بحث صدقهشون را میگه گویا به اینها دستور داده شد که صدقه بدهند برای خدا قابل که مؤمن بود، مخلص بود، صدقی خوبی داد. الله به اخلاص و به کیفیت صدقش نگاه کرد، صدقش قبول شد. اما قابل بخیل بود، صدقی خوبی نداد. چون صدقی خوبی نداد، لذا صدقش قبول نشد. فقط حسادت از, از کجا آمد؟ از اینجا که صدقه او قبول شد و صدقه اون قبول نشد دیگه بحث دوتا دختر در قرآن نیست نظر ما به همین بسنده میکنیم که در قرآن است علت اصلی پذیرش چیه؟ صدقه است و صدقه را الله دستور داده بود دقت بفرمایید وطلو علیهم نبا ابنی آدم بالحق بخان بر آنان خبر دو فرزند یعنی داستان دو فرزنده آدم رب حق بخان اذ قربا قربانا وقتی که هر دو قربانی دادن برای تقرب قربانی دادن فتقبل من احدهما قبول شد پذیرفته شد از یکی از اونها یعنی حابیل ولم یتقبل من الاخر قبول نشد از دیگری قال لا این به همین دلیل حسادت پیدا شد حسود گفت، قابل گفت، لا اقتلن نگ، به خدا من تو را میکشم، او گفت چرا خیلی من میکشی؟ قبول که نشده به خاطر این که خدا به تقوا نگاه میکنه، به خلوص قلب نگاه میکنه، ببینید، بحث قبولیت است، بحث چیزی دیگه نکاه و غیره نیست، قال اِنَّمَا يتقبل الله من المتقين جز نیست که الله قبول میکند، از متقین قبول میکند، از پرهیزگاران قبول می کند لذا تو من را بکشی من که به تو تعرض نمی کنم لئی بسطه ایلی یدک لتقتلنی اگر دراز کنی سوی من دستت را دست درازی بکنی که من را بکشی لتقتلنی تا مرا را بکشی ما انا بباسطی یدی یا ایلی من دست درازی نمی کنم سوی تو دستم را نمیارم. تا تورا بو کوشم چرا اني اخاف الله رب العالمين من از الله میترسم که ربه عالميان هست اني اريد ان تبو ابي اثمي واثمك من ميخوام که تو رجوع كني به گناه من و گناه خودت يعني یعنی اگر انکار راب كني ميبري گناهان ما را هم با خودت ميبري با به من رجوع کردن هست یعنی رجوع میکنی گناهان من رحم هم حمل میکنی و گناهان فتکون من اصحاب النار و وقت از اصحاب النار میشه برادرش را مععزه میکند و این جزای ظالمین هست اما ببینید هر کسی که جنایتی بکند گناه خودش را بدوش میگیرد مگر کسی که در حق دیگری ظلم بکند وقت گناهان مظلوم هم بگردانی کی میشه ؟ زالیم میشه شما حدیث معروف را خندید که رسول اللہ فرمود مسکین کی هست گفتن که مسکین کسی هست که مال نداره فرمود نه مسکین کسی هست که اعمال داره صدق و سیام داره زکات داره روزه داره روز اما چون حقوق انسان ها را پایمال کرده ن بر انسان ظلم کرده روز قیامت اعمالش را برمی دارند نمازش را یکی می‌بره زکاتش را یکی می‌بره صدقاتش را یکی می‌بره هیچ چیزی براش آخر هنوز زی ها باقی هستند آخر چیکار میکنند گناهان زی ها را به گردنش بر میکنند اون یکی میگه به من چیزی نرسید همه اعمالش را بقیه بردن میگویند که باش هرچی گناه داریم گناهان تو این در مقابل هست بس این در بعضی موارد که انسان مظلوم واقعی میشه گناهانش چی میشن بر ظالم و ستمگر بار میشن اینی اورید و انتبو ابی و ایسمیک این هست معناش فطوعت له نفسه قتل اخی اینه که این موعد تأثیر گذار نبود براش چون اون طابع نفس بود خوش کرد برای او نفسش براد قتل برادرش را یعنی نفس این چیز را برایش و خوب جلوه داد فقط له او را کشت فاصبح من الخاسرین از زیانکاران شد یعنی بیچاره شد بدبخت شد ولی خودش بیچارگی و بدبختیش را نمیدانست. کشتن برادر بدبختیه بیچارگی انسان انسان را دنیا و آخرت انسان را به آتش میکشد. نابود می کند اما بعد از اون این جسد برادر به دوشش بود نمی دونست کار بکنه خدای عزواجل برایش کلاغی فرستاد فبعث الله غرابا کلاغی را خدا برای راه فرستاد که کلاغی دیگری مرده بود او را در زمین دفن کرد فبعث الله غرابا يبحث في الارض كزمير مشكافت ليريه كيف يوارى صوته اخي تابئونشان بده چيگونه دفن کند مخفي کند لاشه برادرش را جنازه برادرش را هلا گفت قال يا ويلتا اي حسرات اي افسوس بر من عجزت ان اكون مثل هذا الغراب آیا من آجز شدم که مثل این کلاغ باشم فاواریت اواریت سوعت اخی بپوشانم جنازه برادرم را فا من النادمین پشیمان شد پشیمان استی از قتل پشیمان نشد از کشتن پشیمان نشد از این که به اندازه این کلاغ هم درک نداره این تابحال این جنازه بدون شش بود و سرگردان از این پشیمان شد کاش هم اول دفنش می‌کردم به این معناس نه اینکه او پشیمان شد و توبه کرد از قتلش نه تا قیامت اونطوری که در حدیث میاد هر کسی که قتلی را مرتکب میشه قابل چون اولین مؤسس این عمل شنیع است قابیل اونجا سهم داره گناه بأهم مرسي بس اگر توبه مي کرد بأغناه نمي رسي توبه نكارد من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا الله عز و می فرماید به همین دلیل ما بر بنی اسرائیل نوشتیم یعنی فرض کردیم به چه دلیلی ببینید این مقدار مبهم است مفسرین اینجا بحث کردن بعض میگن اشاره به این واقع مذکور است یعنی به دلیل جلوگیری از خونریزی چون اینجا کشت هیچ کسی نبود که او را بلاخره بکشد رفت تو می بیابان لذا بعد از اون ما در شریعتها در های بعدی که از مطرحترینش شریعت بنی اسرائیل بود ما فرض کردیم که هر کسی که کسی را کشت فکا ما قتل الناس جميعا گویا همه مردم ها را کشت لذا او را بکشید ای من اجل ذالک کتبنا القصاص کتبنا لابنی اسرائیل یعنی چی کتبنا القصاص کتبنا القتال القتال قول بعدی هست کتبنا القصاص ما قصاص را نوشتیم برابنی اسرائیل پس یعنی بعد از این قصاص چی شد مشروع شد قصاص فرض شد تا این طور نباشد که هرکی بیاد هر کسی را بکشد لذا معلوم میشه که اولین شریعتی و اولین دینی که در اون دین قصاص لازم شد و فرض شد هم دین بنی اسرائیل است. چنانچه بعد از آن در دین عیسی نبود در دین اسلام هم قصاص شد همون طور معندگار شد کتب علیکم القصاص نه شما قاندیت ولیکن فی القصاص حیاته اما شیخ رحمه الله معتقد است که اینجا من عجله معنای دیگری دارد ببینید قبل از این موضوع موضوع چی بود؟ جهاد بود نه؟ موضوع جهاد بود که به بنی اسرائیل گفتیم که این قوم که آمده حق شما را غصب کرده بلاد شما را تصرف کرده دست بالا دست نگذارید بری با اینها بجنگید. موسیٰ به اونها گفت که بری بجنگید اونها گفتن نه ما نمیتونیم بجنگیم حالا اینجا الله تعالی چی میفرماید میفرماید خاطر اینکه این برادر ساکت شد یعنی حابیل هیچ دفاعی از خود نکرد دفاع که نکرد دست به شمشیر نبرد اون برادر دیگر کشت او را گفت حتی سراحتن گفت که اگر تو دستت را به سمت من بیاری ما نبی باسطی یدی من هیچ چی یعنی حتی دفاع نمیکنم. این درست نیست حالا اون زمان برای اونها شریعت واجب نشده بود الان برای ما درست نیست ما باید هر کسی که بر ما حمله کرد باید از خود دفاع بکنیم حتی اگر در دفاع در شریعت ما مسلمانان اینه که اگر در دفاع اون کسی که آمده ما را او را زدیم و کشتیم خون ندارد نه قصاص دارد نه دیه دارد دفاع واجبه لذا شیخ رحمه الله می فرمای معتقد است به خاطر ساکت شدن و از خود دفاع نکردن ما بنی اسرائیل را دستور دادیم که ساکت ننشینن كتبنا علی بنی اسرائیل ای كتبنا القتال جهاد را نوشتیم چون بس بس چی است جهاد است یک کسی آمد خدمت رسول الله گفت یا رسول الله فلانی اشاره به کسی کرد فلانی دندان من شکسته یک دندان یا دو دندان این دندانها را بیرون کرده دیار میخواست ازش بگیره رسول الله هم اون خواست تا دیار ازش بگیره. گفت که دندانش را چرا شکستی این جریمه داره گفت یا رسول الله من دندانش را نشکستم من از خودم دفاع کردم اون دست من را گاز گرفت به دندان محکم گرفت من دستم را کشیدم دفاع کردم دستم را کشیدم دندانش در, در آمد دندانش کنده شد لذا ان حضرت به او گفت که پس به تو دیه تعلق نمی گیره این فرد از خود دفاع کرده لذا دفاع لازمه هر کسی از خودش دفاع بکند بر مدافع چیزی نیست الله می فرمین من عجل به بخاطر همین که چون حابیل از خود دفاع نکرد کتبنا القتال على بني اسرائیل کتبنا یعنی کتبنا القتال ما جهاد را بر بني اسرائیل نوشتیم و این مطلب را که جان انسان چقدر قیمت داره جان معمولی نیست جان بی ارزش نیست این مطلب را نوشتیم که انهو من قتل نفسم بغیر نفس شان این است که هر کسی نفسی را بغیر نفس بکشد یعنی نفسی را در مقابل نفس نه بنا حق بگوشد حالا کسی در مقابل کسی کشته میشه کسی کشته خودش را میکشند او فساد فی بدون فساد در زمین میدونید که فساد بعضی از فساد اینه که میآید مفصل فی الارض کسانی که محاربه میکنند و بعضی از فساد مثل زنای محسن است نه بدون فساد در زمین فاک انما قتل الناس جميعا گویا کشت انسانها را همه انسانها را و من احیاها هر کسی زنده کرد یعنی سبب حیات انسانی شد سبب نجات انسانی شد فکا انما احیا الناس جمیعا گویا او زنده کرد همه مردم را سبب حیات همه شد این قانون را ما بعد از این بر بنی اسرائیل نجشتیم که هیچ کسی دیگه دست بالا دست نگذارد دستار پشت سر نبندد که هر می کشد بید بکشد نه دفاع لازمه ولقد جاءتهم رسولنا بالبینات لذا قانون ما که تصویب شد همانا آمد پیش آنها وقتن فوقتن پیامبران ما با دلائل آمدند ثم این كثير منهم بعد ذلك في الارض لمصرفون سپس تعداد زیادی از اینها بعد از این در زمین اسراف کنندگان بودند کسانی که متجاوز بودند، یعنی تجاوز کردند، قتل کردند، انسان را کشتند انسان را از بین بردند، لذا بسیاری از اینها. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا. ببینید، انجا پس به س جهاد آمد و بحث قصاص بر اساس گفته بعضی از مفسرین بعد از اون الله عزوجل نه تنها حد قصاص را بلکه حد قطع الطريق را هم بیان می فرماید قطع الطريق کسانی که سرقت می کنند اما سرقت کبراه یک کسی هست که دزدی میکند دزدی مخفیانه میکند یعنی طرف خوابه طرف غافل است، جیبش را میزند خانهش را میزند اما این دزدی سوره هست کوچک است. نسبت به این دزدی کبره است، اونه که علنی دوزدی میکند نمیترسه جلوش را میگیرد اسلحه را بلند میکنه، تکام نخور و وسایلش را بر این قاطع و طریق هست قطع و طریق هست این جرمش از اون دزد خیلی بیشتر است این جرمش از اون دوست چیه؟ خیلی بیشتر است البته اینجا الله تعالی چار تا جزا بیان فرموده یکی اینه که کشته بشه این قاطع طریق هم هست فساد فی الارض هم هست محاربه هم هست فساد فی الارض هم هست حالا خیلی ها در, در کشور ما اعدام میکنم به همین عنوان به همین بحانه که اینها ها محارب هستند حالا ببینیم کسی که اعتراض میکند به وضعیت چه بلاخره به وضعیت اقتصادی اعتراض میکند یا به وضعیت سیاسی اصلا مخالف است با ما موافق نیست با نوع حکومت ما موافق نیست آیا این محارب هست؟ یا تعریف محارب اونه که امنیت را سلب میکند از مردم در راها و مردم را میکشد ببین چهار جزا بیان فرموده خدای تعالی چهار صورت داره در دو صورت قتل بله در یک صورت قتل این قتل برای کسی است که کشته مسافر را رهگذر را چیکار کرده کشته تفسیر صحیح و قول صحیح همه علماء اینه که کسی کشته او را بکشند دومی این هست که هم کشته هم مال برده هم مال طرف را بالا کشیده برای خودش برده دزدیده هم خودش را کشته این انسان با این تغلیزی بیشتری بشه اول دست و پایش را قط کنند بعدا به دار بزنند این دو صورته. سومی صورت که اینه که فقط مال برده کسی را نکشتی مال طرف را برده ولی خودشون وحشت ایجاد کرده مثل اون دوز دوزدکی نبرده مخفیانه نبرده بس تنها مثل اون دوز دستش راقت نمیکنن دست و پایش رقت می من خلاف دست راست و پای چپ این سومی هست چارمی اونه که نه توفیقی آفته کسی را بکشد و نه توانسته که مالی ببرد فقط چیکار کرده فقط وحشت ایجاد کرده راها را نامن کرده این حکمش زندان هست او فو فی الارض هر اندازه که قاضی سلامی دونه یک سال دو سال سه سال این زندان بکنه پس کسی اعدام میشه کسی بدار زده میشه که کشته دیگران را اما اینجا یک فرق دیگری با بقیه قتلها هست در بقیه قتلها قصاص هست اونجا حق ناس هست یعنی کسی اگر کسی را بکشد اون حق حق و مقتول است اگر بکشند میتونند بکشند اگر بخواهند دیه بگیرن هم میتونند اما اینجا نه اینجا کسی که اعدام میشه کسی که کشته میشه هم برای حق و است و هم برای حق الله یعنی اگر ولی دم رضایت بده هم کشته میشه متوجه شدید که این فساد در زمین کرده مردم را تمام مردم را وحشت انداخته هیچ کس برای تجارتش برای نیازش برای هیچ چیزی از اون راه نمیره که نامن است پس این تنها اون یک نفر را که کشته اون حق او برگردن ایچ نیست حق همه هست چرا اگر توبه کرد اینجا الا الذین تابو هم میاد اگر توبه کرد قبل از دستگیری اون حق حق چی میشه بخشیده میشه بعدن اگر دستگیرش کردم بعد از توبه بعد از رجوع بعد از امان حالا کسی میاد میگه من طالب قصاص هستم برادرم را کشته بله قصاص میشه اگر بخشید هم بخشیده میشه الله میفرماید انما جزاء الذين يحاربون الله جزی نیست که جزای کسانی که یحاربون الله محاربه میکنن با خدا و رسولش میجنگند یعنی با بندگان خدا میجنگند راهار راها را بر انها ناامن میکنند قطع الطریق میکنند ویسعون فی الأرض فسادا و در زمین تلاش میکنند را این ویسعون فی الارد فسادا تفسیر یو الله و رسول چطور می با خدا و رسول یعنی <تصفيق> تلاشگر فساد در زمین هستند خب نتیجهش چیه سمره این فساد ان یو قتلو این کشته بشوند در صورتی که فقط قتل انجام دادن او یو یا اینکه که بدار زده بشوند در صورتی که هم مال بردند و هم انسان ہرا او تقطع قطعا ایدیہم و ارجلهم من خلاف یا دست و بر برعکس قط بشه در صورتی که فقط مال بردن او ين فاو من الارض یا زمین نف بشن یعنی تو زندان ها انداخته بشن در صورتی که چیکار کردند فقط وحشت ایجاد کردند ذلك لهم خزی فی الدنیا این برایشان رسوایی در دنیاست. در دنیا با این عذاب گرفتار می شد. ولهم فی الاخره عذاب عظیم. در آخرت برای این راهزنها عذاب بسیار بزرگی هست. برای اینها عذاب بسیار بزرگی هست. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. حالا ببینید کسانی که در شهر، در شهرها الان اقدام میکنند به سرقت مسلحانه حالا اینها اگر حکم شون حکم محارب نباشد ولی اینها کمتر از محارب نیستند گرچه محارب به کسانی هستند که راه را میبندند ولی اینها خیلی ها هستند در شهر می آیند جلوی مردم را میگیرند جیب مردم را خالی میکنند گوشی های مردم را میبرند ساعت های گران قیمتشون را میبرند اینها هم محارب هستند اینها هم مفسد هستند متاسفانه با این قشر خوب برخورد نمیشه اینها هم باید دستگیر بشند به اشد مجازات گرفتار بشند الله عزوجل برای همین افرادی که به وسیله اسلحه میروند و هم مال مردم را میگیرند و چه بسا مردم را میکشند الله عزوجل وعید بیان فرموده ذالک لهم خزیون فی الدنیا در دنیا برای اینها رسوایی هست، سرفکندگی هست، شرمساری ساری هست. این وعده الله، الله اینها را, را شرمنده می کند، را رسوا میکند می کند. اگر توبه نکنند، و در آخرت، ولهم فی آخرت عذاب عظیم، عذاب بسیار بزرگ هست. هرچی اینها توبه بکنند، اینها مال این همه مردم بردند. اینها، این, این همه مردم را به وحشت انداختند هیچ محله امنیست، خیابان امنیست، نیست، کوچه امنیست نیست. اینا امنیت را به هم زدند. لذا این حق مردم از اینها گرفته میشه اینها اگر اعتقادی داشته باشند اینها در روز قیامت به اشد مجازات گرفتار میشن و لهم فی الاخرته عذاب عظیم الا الذين تابوا چرا توبه کسانی که توبه بکنند کسانی که توبه بکنند من قبل ان تقدی رو نه اینکه در زندان توبه می کند. کسی که در زندان توبه می کند خب حالا اون پیش خدا توبهش قبول میشه یا نمیشه ما این نمیدونیم ولی از نظر قانون توبهش قبول نمیشه. باید مجازات بشه. اگر کشته کشته بشه اگر مال برده دست و پاش قط بشه البته من قبل ان تقدی رو قبل از اینکه شما بر اونها مسلط بشید یعنی قبل از اینکه دستگیر بشند توبه بکنند بعد از اون حق الله معاف است اما حق الناس معاف نیست مال برده برگرداند انسان را کشته باید دیه بشه؟ قصاص بشه و یا اینکه اگر بخشیدم دیه بده فعلمو ان الله غفور الرحیم الله می فرمه بدانی که خدا غفور الرحیم هست بخشاینده هست و مهربان هست برای کسانی که توبه میکنند یا ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید و به سوی او راهی بیابید و الله تعالی به ان کسانی که محاربین هستند ان کسانی که می خواهند توبه بکنند الله عزوجل میفرماید از خدا بترسید توبه بکنید و راهای قربت به خدا را، راهای رسیدن به خدا را تلاش کنید. لذا الله می‌فرماید: یا ای یوهل‌الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اتّقُ الله، از خدا پروا داشته باشید، از خدا بترسید، و ابتغویلیه الوسیل، و بتلبید تلاش کنید به سوی خدا وسیله را وسیله به چی میگویند خوب دقت کنید وسیله هيا فعیله بر وزن هست فعیله هست علامه آلوسی زیبا این را چی میکند این را تفسیر و تعریف میکنند میفرماید که به معنا ما یتوسل به ال الله من فعل الطاعات و ترک سیعات هر آن چیزی که از قبیل طاعات و ترک سیعات انجام دادن طاعات و ترک گناهان انسان را به خدا نزدیک می کند اون وسیله هست یعنی نماز وسیله هست روزه وسیله هست ترک چرانی وسیله هست ذکر خدا وسیله هست تلاوت قرآن وسیله هست همه اینها وسیله هستند و ابتهو وسیله الوسیله این هست وسیله نه اینکه به اشخاص متوسل بشید به افراد متوسل بشید این اسمش وسیله نیست حالا وسیله جایز همینی که خدمت شما عرض کردم وسیله به ایمان وسیله به اعمال وسیله به ارز به خدمت شما دعا وسیله به اسمای حسنا البته ما بحث وسیله را به تفصیل انشاءاللہ در سوره بنی اسرائیل میخوانیم سورتهای جائز وسیله و سورتهای ناجائز وسیله را اونجا بحث میکنیم به تفصیل و با دلیل ولی اینجا همین قد بدانید بعد از اینکه الله تعالی به این محاربی میگه که تلاش کنید راه رسیدن به خدا را یعنی اون چیزهایی که شما را به قرب خدا میرساند جبران مافات می کند ند بقرب خدا چی انسان را میرساند اطاعت و بندگی ترک گناہ و ترک سیئات لعلکم تفلحون ها وجاهدوا فی سبیله در راه الله مجاهده کنید در راه الله جہاد کنید تا اینکه شما راستگار بشید اما کفر و فسق و گناہ انسان را از خدا دور میکند و کافر هر چی که بالفرد در زمین هست اینها رو بخواد به عنوان فدیه بده الله تعالی میفرماید که او از عذاب خدا نجات نمی یابد این تخویف اخروی هست ان الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا همانا انهای که کفر کردن اگر باشد برای آنها ما فی الارض جميعا تمام آنچه که در زمین هست همگی برای او باشد و مثله دو برابری این باشد مثل این باشد هم با او لیفتدو به من عذاب یوم القیامه تا کہ اینا بده دی برای نجات گرفتن از عذاب روز قیامت ما تقبل منهم اینا قبول نمیشه مال قبول نمیشه وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ الله میفرماید برای این انسان ها عذاب دردناک است این هایی ای که کفر کردند و میخواند از عذاب خدا با پول نجات بیاوند نخیر الله میفرماید بعد از اینکه وارد جهنم می شه یریدون اهی من النار این ها می که از آتش جهنم خارج بشن اما الله میفرماید وما هم بخارجین منها نیستن آنها خارج از آن آتش ولهم عذاب مقیم برای انها عذاب دائمی هست این عذاب دائمی برای کیه برای کفار انالذین کفرو پس تنها راهش توبه است. روی آوردن به ایمان هست و السارق و السارقت خب شما قبلا بحث محارب را خندید کسی که راهزنی می کند و دزدی می کند. اما کسی که بدون راهزنی دزدی می کند. ببین یک دزد اونه که علنی میاد سری راه نمی تسه تفنگ را نگه میدارد به سر مردم. یکی اونه که نه مخفیانهه نگاه میکنه که فرد کی غافل میشه تا حاسش پرت میشه جیبش را می زند تا خوابش میبرد خانش را میزند این دزد نسبت به اون اولی مقداری چی هست؟ جایگاهش کمتر و پایین تر است را؟ چون مثل اون وحشت نه انداخته بعدن انسان متوجه میشه که فلان چیز گم شد این مثل اون چی ندارد؟ قطع دست و پا ندارد این فقط قطع دست دارد الله میفرمد و السارق و السارقت و مرد سارق یا زن سارق مرد سارق یا زن سارق یعنی اینجا این احکام فرقی نداره چه مردان باشن چه زنان فقط تعو ایدیهما این حکم است قط کنی دست اون هر دورا چرا جزاء ام بما کسبا این جزای اون چیزی هست که کسب کردند نکالم من الله این درسی است از جانب الله عبرتی است از جانب الله عز والله عزیز حکیم والله عز و غالب هست و کارهایش با حکمت است. اما اگر همین سارق توبه بکند توبه بکند کی توبه بکند فمن تابه من بعد ظلمه و اصله کسی بعد ظلمش یعنی بعد سرقتش توبه بکند و اصلاح بشه خودش را اسلا بکند در آینده چرین کاری نکند فئن الله یتوب علیه خدا بر او رجوع میکند اینجا هم ارز کردم حق الله معاف میشه حق الله چی هست قطعی است اما حق الناس معاف نمیشه اون مالی که برده اون طلای که دزدیده اون موبایلی که دزدیده هر چی هست اونها را باید اونها ارگز بخشیده نمیشوند ان الله غفور رحيم همان الله عزوجل هم بخشنده هست و هم مهربان هست الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض انجا خداوند احکام را بیان فرمود حالا برای تعمیل احکام برای تکمیل احکام الله عزوجل بیان می فرماید قدرت خودش را یعنی این اللهی که اینقدر قادر و مقتدر است فرامین این خدا را به جا بیاورید حدودش را به بیاورید تجاوز نکنید آیا نمی‌دانی که ان الله له ملک السماوات والارض همانا برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین یعذب من یشا و یغفر لمن یشا هر کسی را که بخواهد عذاب میده و هر کسی را که بخواهد هر کسی را که بخواد الله می بخشد عذاب و مغفرت همه بدست او هست لذا فرامین اون الله را پا نگذارید احکام او را سرپیشی نکنید والله على كل شيء قدیر الله تعالی بر هر چیز قادر و توانا هست در آیات گذشته احوال یهود را خاندیم بالخصوص این بخش که از آمادگی برای جهاد از همراهی موسی علیه و آله نبینا افضل الصلوات والتسليمات برای جهاد سر باز زدند همراهی نکردند الله تعالی خباست اون قوم را و سرکشی اون قوم را بیان فرمودند و بعد از آن قصه و داستان فرزندان آدم آمد که بعضی معتقدند علت این داستان هم همین هست که وقتی که انسان بی دفاع بماند انسان ضربه می خورد باید انسان از خودش دفاع کند یعنی جهاد برای ملت مسلمان گرچه در تمام ادیان بوده لازم هست در این آیات که بخش دوم سوره هم از اینجا آغاز میشه اینجا زجر و سرزنش هست بر منافقین منافقینی که در واقع پشت پرده همون یهودی بودند اما ظاهر مسلمان بودند و وقتی که شرائط ایجاب میکرد با سرعت به طرف کفر میرفتند یعنی به همون حقیقت خودشون برمیگشتند الله تعالی میفرماید یا ایها الرسول لا يحزن الذين يسارعون في الكفر ای رسول مکرم شما را حزین نکند ناراحت و غمگین نسازد کسانی که به سرعت به سوی کفر میروند یعنی شرایط را نگاه میکنند گاهی شرایط ایجام میکنند زود بسمت سمت کفر بروند اینا کیا هستند من بیان اون هست من الذین قالوا آمنا بی ولم تؤمن قلوبهم انهایی که با دهان و با زبان گفتند آمننا معلوم میشه که محل ایمان زبان نیست محل ایمان جوارح نیست ظاهر نیست بلکه محل ایمان باطن است، درون هست قلب هست به همین خاطر از انها ایمان نفمشه چون ولم تؤمن قلوبهم قلوب آنها و درون آنها ایمان نیاورده ومن الذین هادو و از آنان کی یهودی شدند سمعون للكذب سمعون لقوم آخرین یعنی نا بظاهر مسلمانند اما در واقع یهودی هستند انها هم الله تعالی می فرماید و همچنین اده دیگر از یهودیان که اینها هم بسرعت بسوی کفر می سمعون سماعون للكذب سماعون این مبالغه هست یعنی خیلی گوش میکنن زیاد استماع میکنن توجه میکنن دروغ را منظور از دروغ چیه؟ منظور از دروغ تحریفات یهود است. تغییراتی که در کتابشون دادند مثلا نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها دروغ میگفتند بشارت رسول الله پیشگویی در رابطه با بیست رسول الله در کتابشون بود اما آنها دروغ میگفتند آنها واقعیت را نمیگرفتند لذا سمعون لقوم اخرین و از اون طرف یعنی تحریفات اونها را دروغ های اونها رو گوش میکنند و از این طرف کلام شما را گوش میکنند که به اونها برسانند به کجا؟ به سردمداران خودشون به رؤسای خودشون، رؤسایشون از یهود منظور آیه چیه؟ منظور آیه اینه که گوش به فرمان اونها هستند اما سخنان شما را که گوش میکنند به عنوان جاسوسی گوش میکنند چون یک گروهی از متکبران یهود هستند که اونها در مجلس شما حاضر نمیشن، اینها گوش میکنن برای اونها گوش میکنن یعنی به اونها میرسانن. سمعون لقوم آخرین قوم آخرین چیه؟ احبار و رهبان یهود هستند. الله الوسی رحم الله اینجا نوشته: والمراد أنه عيون عليه علي صلّى و سلام القوم بر عليه رسول الله صلی الله علیہ وسلم انها جاسوس انت اما جاسوس اسو یکی جاسوسی برای یکی لئولایک القوم همون که لم یاتوک همون و رخبان پس انها اگر آمدند و بظاہر ایمان دارن برای این تجسس است برای جاسوسی است برای خبرچینی است کدوم قوم آخرین اون قوم آخرین که لم یاتوک پیش شما نی آمدند پیش شما انها نی آمدند منزور پیش شما نی آمدند همون متکبران هستند از احبار و رهبان یحرفون الکلمه من بعد مواضعه اللهمی فرماید که کلام الله مراد از کلم کلام الله هست یعنی تورات کلمات تورات ببخشید کلمات تورات را تحریف میکنند جا بجا میکنند من بعد مواضعی یعنی بعد از مواضعش بعد از اون مواضع اصلی در اون جایی که اون کلمات هستند اون کلمات را جا بجا میکنند اصلش اینجا اشاره هست به جریانی که برای بعضی از یهودی های خیبر اتفاق افتاد. در اونجا یه زنی با مردی مرتکب زنا شد که این زن از اشراف اونجا بود منصوب به بزرگان یهود بود بزرگان خیبر بود لذا وقتی که اون رسواییشون برملا شد افشا شد اینها میخواستند که حکم را اجرا بکنند حکم در رابطه با زنا در دین یهود رجم بود سنگسار بود همون چیزی که پیش ما هست لذا اونها گفتند علمای اونها گفتند به افراد پایین‌تر گفتند که شما بروید خودشون نمی‌آمدند شما بروید پیش پیامبر مسلمانان بروید ببینید اونها چه حکمی صادر می کنند این بار ما چون در کنار اونها هستیم وزیر حکومت اونها هستیم بر اساس قانون و حکم اونها حکم را اجرا می کنیم چونکه نمیخواستند خواستند سنگسارش بکنند اونها در هر مسئله می دیدین که احکام قرآن آسان تره تسحیل است نسبت به اون چیزی که پیش یهود است اینجا فکر می کردند حتماً تخفیفی هست تسهیلی هست ضربه های شلاغی هست نمی که این زن کشته بشه به این دلیل بود که گفتند شما بروید و کسانی را که فرستادند از علماء یهود آنها وقتی آمد محضر رسول الله صلی الله علیہ وسلم آن حضرت فرمود که این حکم پیش شما چیه؟ دستور پیش شما چیه؟ قانون چیه؟ اونا گفتن که چون اونجا پندشون داده بودن بهشون گفته بودن اونها گفتن که دستور پیش ما این هست که کسی که مرتکب این کار بشه اون چی میکنیم؟ اون را چهرهش را سیاه میکنیم و تشهیرش میکنیم و بعد ضربش حلاغش میزنیم بالاخره این که اعلام کردند آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از طریق وحی متلع شده بود که پیش اونها هم رجمه فرمودن بیارید همون عبارت تورات را اونجا که کلمه رجم بود اونجا که دستور سنگسر بود همون ملا از اون رد شد و دستش را رویش گذاشت عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہو که یکی از علماء گذشته یهود بود او خبر داشت او میدانست او دستش را برداشت و اون عبارت را نشان داد چرا این را کثوان میکنی لذا یحرفون الکلمه من بعد مواضیعه امام رازی نوشته من بعد مواضیعه ای وضع الجلد مکان الرجم وضع الجلد مکان الرجم بجای رجم و سنگسار اونا چی گفتن جلد شلغ لذا این تحریفشون بود اما اللہ تعالی می فرماید کہ یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه اون بزرترهاشون گفتند این اوتیتم هذا فخذوه اگر این چیز به شما داده شد یعنی اگر شلاق و بالاخره امثال شلاق فخذوه بگیرید قبول کنید اجرا کنید کی اینا گفت اونهای که نہیں می خدمت رسول اللہ همون بزرگ ترهایشون ان المحرفین والقائلین هم القوم والآخرون انهایی که اینو می گفتند گروه دیگه بودن که نمی خدمت رسول الله ای قولنا لأتبائهم السماعین لهم بهمون پیروان خودشون که قرآن انها را گفت سماعون للكذب همیشه تحریفات انها را گوش می اینها گفتن که ان اوتیتم هذا فخدوه اگر این حکم به داده شد بگیرید و ان لم تؤتوه فاحذروا اگر این حکم داده نشد این داده نشدید فاحذروا بفرضیت قبول نکرید اما الله عز وجل اینجامی فرماید و من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا هر کسی که خداوند بخواهد فتنه‌ او را فتنته اینجا به معنی خدا گمراهی را الله بخواهد و اراده کند شما هرگز مالک نمیشید برای اون از خدا و از عذاب خدا و تقدیر خدا هیچ چیزی قلا املک لکم ضر و لا ولا نفعن خدا اینا را گمراه کرده لذا اینا کی گمراهی خدا برای اینها شما هیچ کاری نمیتونید برای اینها بکنید اولائک الذین لم يرد الله ان یطهر قلوبهم اینا کسانی هستن که خدا نخواسته که دل‌های اوشان را پاک بکوند خوب توجه بکنید این لم یورد الله ان یطهر قلوبهم مسبوق به سابق است این نیست که از اول خدا اراده هدایت اینها را نفرموده. ما بار بار خواندیم این چون اشاره به همون مهر جباریت است چون اگر اینا به معنای ظاهر بکنیم منش این میشه که او بیچاره ها پس گناه اینا دارن خدا خودش نخواسته که اینا هدایت بشند خودش نخواسته که اینا پاک بشند این نخواستن خداوند عز و جل ارض کرده مسبوق بسابق است بر اساس یک عمل کرده کفری و عمل فتنه خود اونها است اون چیه؟ اون همون جلال بل هست اون همون عناد هست تعصب هست کلا بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون کسب خودشون هست عمل کرد خودشون هاس. حالا اینها چی اینها چون که گرفتار تعصب بودند گرفتار عناد شدند حق را میدانستند و زد کردند لذا اولئک الذين لم پس اون زمینه را هم حتما در زد داشته باشید چون اون تعصب را خرج دادند خدا من نخواست که این یطهر قلوبهم خدا اینها را پاک بگردانند لذا لهم فی الدنیا خزیون ولهم فی الاخره عذاب عظیم برای اینها در دنیا هم رسوایی است رسوا شدند تمام مسلمانان و یهودیان دیدند که اینها دارن کتمان میکنند اینها دارن به همون کتاب خودشون عمل نمیکنند رسوایی بزرگتر از این؟ خودشون را چنان بزرگان و احبار و روحانی میدونن که از جایشون تکار نمیخورن دیگران را میفرستند ولی تعریف میکنند لهم فی الدنیا خزیون این رسوایی در دنیا است محرومیت از هدایت در دنیا است ولهم فی الاخره عذاب, عذاب عظیم این سمری است در آخرت برای اونها عذاب عظیم هست خب اینکه خاندیم سمعون لیلکذب علت این سمعون للكذب سمعون للكذب را چه تفسیر کردیم؟ یعنی تحریفات اونها را ہمیشه گوش میکنند دروغ های انها را در تورات در احکام تورات که جا بجا میکنند تحریف میکنند الله می برای چی هست اکالون لسحط این علت سمعون للكذب است اکال هم مبالغه آکل هست اکال مبالغه آکلون هست یعنی اینا خیلی گوش میکنن دروغ چون خیلی حرام میخورند خیلی حرام میخورند قبلا ام ارز کرده بودم که اگر اینها ایمان بیاورند واقعیت را بگند اون مرجعیت از بین میره اون درامت از بین میره اون حرام خاریش از بین میره پس به خاطر منافع دنیا این همه تحریف است، این همه تغییر است، این همه جابجایی است. لذا الله تعالی می فان فا جاؤ ک، فحکم بینهم، آو آعرض عنهم. اگر پیش شما آمدند، فحکم بینهم، بینونها فیصل کن، آو آعرض عنهم یازونا، اعراز کن. ببینید کفاری که زیر نزاره نظام اسلامی و حکومت اسلامی باشند دو هستند یکی کسانی که به عنوان زمی هستند یعنی حکومت اسلامی را پذیرفتند قانونش را پذیرفتند و تحت پرچم حکومت هستند برای اونها هر وقتی که ای بشه که فیصله انها به وسیله حاکمان مسلمان میشه بر اساس قانون شریعت فیصله میشه اما گروه دیگه هستن که اونها مستقل فقط با ما معاهدند پیمان دارند مثل یهود لذا یهودی که کنار مدینه بودند آنها با مسلمانان معاهد بودند یعنی اون زمان جزیه نمی پرداختند عهد داشتند حکومت اونقدر گسترده نشده بود قوی هم نشده بود که اونها زیر چترش بیان به عنوان ذمی بدل و ذمه بپردازن جزیه بدهند نه مستقل بودند حکم اینها این هست که در مسائل خانوادگی در مسائل اسرا و غیره طبق قانون خودشون فیصله میشه طبق قانونه خودشون فیصله میشه ما اجبار نمیکنیم اونها رو الزام نمیکنیم که حتما قانون ما را بپذیرند اما اگر خودشون آمدن گفتن که در این مسئله شما فیصله بفرمایید اون وقت ما فیصله میکنیم نه بر اساس قواعد مدنی اونها نه بر اساس شریعت اونها بر اساس حکم خداوند دستور قرآن اینجا همین مسئله بود که انها کمی آیند فانجا او کفحكم بینهم او هم یا بین اونها فیصله بفرما فیصله فیصله قصاص هست فیصله فیسل رجم است جلد هست ارچی هست بفرما این اختیار رحم داری او هم یا ایراز کن بگونا خودتون بری کنید چون ارز این اختیار برای حاکم است، این در رابطه با معاهدین است. در بار زمیان زمی باید به هر صورت قانون اجرا بشه اما و این توعرض عنهم اگر اعراض کنی از اونها، فلن یضرو کشیع پس اونها ارز کنم که به شما هیچ ضرری نمیدهند. ببینید مراد از اعراض چه مراد از اعراض بعضی میگن فیصله نکردن است ولی نه مراد از اعراض فیصله نکردن شیخ رحمہ الله شیخ امامی فرماد اگر فیصله نکنند بگه خودتون فیصله بگید که برای رسول الله خطری ندارد بلکه مراد از اعراف فلن یذرو که چه این است که اعراض ان ابقاء العهد است اعراض ان ابقای عہدس یعنی اگر فیصله کردید اونها فرمان شما را قبول نکردن دیگه اونها را چی کن اون عهدی که با اونها بست اون عهد را تمام کن دیگه ای لم یسلمو حکمک فاعرض عنهم وعن معاهدتهم وقل لهم نحن نقاتل معكم بیمانهس اعراض کردی از ابقای عهد جرای اعتراض ان ابقایات چون وقتی پیغمبر فیصله بکند اونا نمیتونن غیر از فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه بکنن اینجا که پس پیش رسول الله آمدند وقتی که فیصله رسول الله را قبول کردند رسول الله حکم رجم سا بر اونها چی کرد صادر کرد حالا که حکم رجم صادر شد نمیتونن چی چیکار بکنن این را اجرا نکنن اگر اجرا نکنن معاهده دیگه تمام از این بباد بجنگید بیرونشون کرید به این مانا هست پس اونها مجبور شدن که قبول کنند رجم اجرا شد لذا الله می فرماید و این تو عرض عنهم فلن یضروک شیئا اگر اعراض کردی از ابقای عهد اونها هرگز بشما زرر نمی رسانن و این حکم تفحکن بینهم بالقسط اگر شمارا حکم قرار دادن شمارا داور قرار دادن فحکم بین آنهم بانصاف به انصاف و به قانون الهی بینشون داوری کن. ان الله يحب مقصتین. همانا الله وجل دوست دارد انصاف کنندگان را. حالا تعجب و شگفت از این هست که چگونه اونها به شما میگن بیا شما فصل کن. در حالی که تورات هست. معنیش اینه که اونا به همون تورات هم ایمان ندارند اونا حتی به تورات همچی ایمان ندارند اگر ایمان به تورات داشتند از این شاخ به اون شاخ نمی پریدند حکم این فردی که مرتکب این عمل سیاح شده در تورات مشخص بود نمی خواهم به تورات عمل کنند میاند به دستور شما به قانون شما فکر میکنه اینجا آسان تره برای و کیف يحکمونوک و عندهم التورات چگونه شما را حکم قرار میدهند در حالی که پیش اونها تورات است فیها حکم الله درون دستور خدا هم هست یعنی تمام حدود الهی در تورات هستند. سمه یتولون من بعد ذلك تعجب از این است که اون دستور را میبینم بعدا برمیگردند اعتراض میکنه از اون اصلش اینه علت اینه که و ما اولاک بالمؤمنین اینا اصلا مؤمن نیستند اعتقاد ندارن مؤمن مؤمن نیستن به چی مؤمن نیستند تفسیر مذهبی نوشته مؤمن به هیچ کتابی از کتاب الله نیستند نه به تورات و نه به قرآن و ما اولاک بالمؤمنین به شئ من کتاب الله لا بالتوراث ولا بكتابك لا بالتوراة هو الا العمل بها وامنوا بما يصدقه ويوافق به تورات اگر مؤمن بودند عمل میکردند اجرا پس می اینها شعار میدند که ما عالم به توراتیم مؤمن به توراتیم و اما اولاکبل مؤمنین حالا الله تعالی فضیلت تورات را بیان میفرماید تورات هم کتاب خدا و در زمانش این, این فضائلی که بیان میشه این فضائل در زمان خودش هست نه امروز امروز که تحریف شده امروز که جا, جا شدن مراد نیست همون زمان خودش بالاخره کتاب هدایت بود کتاب نور بود تمام انبیاء بنی اسرائیل بیش از چهار هزار پیغمبر به تورات حکم می کردن. احبار و روحبان تبلیغ تورات می کردن. اما اینجا یه چیزی نوشته که من قبل از اینکه ترجمه بکنم اینو خدمت شما عرض بکنم تا ترجمه مفهوم بشه فهمیده بشه اینجا هست به مستحفظو من کتاب الله یعنی تورات را ما که نازل کردیم بر اساس قوانین تورات همه انبیاء گذاشته از موسا تا عیسی هرچی پیغمبره حالا چار هزار تا بودند بیشتر کمتر همه بر اساس تورات حکم میکردند و احکام را صادر می هرچی که احبار روحانی بودند همه بر اساس تورات اما اینها زامن حفظ تورات از سوی خدا قرار داده شده بودند یعنی الله تعالی به همه اینها مسئولیت داده بود، ماموریت داده بود که تورات را حفظ کنند، تورات را نگذارند که جابجایی شه، بشه نگذارند که در تورات تغییر بیاید. اما اینها تورات را چی کردند؟ نه اینکه حافظ تورات شدند، بلکه خودشون تورات را تغییر دادند. دا، یعنی همین احبار و روحانی. خودشون در تورات تحریف ایجاد کردند پس الله عزوجل اینها را کافر میگوید اینها را غیر مؤمن به تورات می نامد حالا در رابطه با تورات و درباره انجیل الله عزوجل علماے اون ملت را علماے اون مذهب را یعنی مذهب یهود و مذهب نصارا را دستور داده بود که شما وظیفه‌تون هست شما زامن حفاظتش هستید باید اونها حفاظت می‌کردن ولی اونها نکردن اما وقتی که نوبت قرآن می رسد الله عزوجل به ما مسئولیت نمیده به علمای این امت نمیده الله میفرماید ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون زامنش مایم خود خداوند است چرا این حفاظت را به وسیله بندگان خودش به وسیله همین علماء و حفاظ الله می اما زمانت را خدا به عهده خودش می گیرد حالا بعضی ها وقتی که به ظاهر نگاه می کنند اشکال وارد می کنند که آیا این تبعیز نیست اون هم کتاب الله این هم کتاب الله چرا زامن حفاظت اونها علماءشون قرار گرفتند زامن حفاظت قرآن خود خدای اززوجل قرار گرفت چه فرقی بین این کتاب هاست علماء نوشتند به دلیل این که بعد از اون کتاب ها و بعد از اون انبیا، انبیاء دیگه می آمدند کتاب های دیگه نازل می شدند اگر درجای تغییری درجای تحریفی دستکاری انجام می گرفت کتاب بعدی می آمد و اون را چی می کرد اسلام می کرد بیان می کرد اما بعد از قرآن دیگه کتابی نمی آید و بعد از رسول الله صلی علیه و سلم دیگه نبی نمی آید همین شما در این رکومی خانید الله اول تورات را می فرمه بعد الانجید را بعدا کتاب قرآن را و محیمن می فرماید یعنی محافظ این کتاب هست. قرآن چون آخرین کتاب الله هست برای اهل زمین محافظ کتابای گذشته هم هست خودش را هم الله محافظت میکنه چون بعد از این پیغمبری نمی آید بعد از این کتابی نمی آید لذا اگر این در این دست برد زده بشه این تحریف بشه انسانیت تا قیامت سرگردان میشن نمیدونه که دین حق چیه راه حق چیه بین خاطر الله عزوجل چون پیغمبر نمیفرسته، فرسته چون دیگه کتاب نمیفرسته، فرسته حفاظتش خودی اللہ عزوجل است این فرق است بین قرآن و بین کتابهای گذشته اللہ میفرماید ان انزلنا التوراۃ فیها هدا و نور ما را نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود يحكم بها النبیون الذين اسلمو حکم کردن داوری کردن فیصله کردن به تورات النبیون الذين اسلمو انبیائی کے اعتقادا و عملا تسلیم بودن تسلیم تورات و الله حکم صادر می کردن للذین هادو برای یهودی‌ها برای ملت یهود والربانيون این ربانیون اتفس بر نبیون یعنی بعد از نبیون ربانیون احبار حکم صادر میکردند والربانيون والاحبار هم چنین بر اساس تورات ربانیون ربانیون دراویششون رب میگند احبار علماشون را میگند هم بر اساس احکام تورات دراویش و علما حکم صادر میکردند بمستحفظو این با بای سببی است به سبب اینکه استحفظو یعنی از اونها طلب شده بود حفظ تورات بمستحفظو من کتاب الله از اونها خواسته شده بود حفاظت کتاب خدا من من زائده هست یعنی استحفظو کتاب الله اونها از اونها خواسته شده بود که حفاظت کنن کتاب خدا را و كانوا علیه شهدا و بودن آنها بر این چیز شهدا، شهدا یعنی چه؟ یعنی مراقب، اونا الله دستور داد و مراقبت کنند. یعلمو و کانو علی شهدا تفسیر نوشته، رقبا و یو می تعلیم و بیان میکردند. اونها بالاخره نگهبان نگاهمان بودند، حافظ بودند، باید این کار رو میکردند. و تفسیر روح المانین شهدار رقباء یحمونه من ان يحوم حول حماه التغییر والتبديل بوجه من الوجوه انها محافظان به عنوان محافظ تعین شده بودند که حمایت و حفاظت میکردند تورات را از اینکه تغییر و توش بیاد و کانو علی و الله تعالی به اونها هم اینه گفته بود فلا تخشون ناسا وخشونه این خطاب به یهود به بی علماء یهود است نترسید از مردم و از من رب بترسید یعنی چه؟ یعنی حکم تورات را هرچی هست شفاف و آشکار برای مردم اعلام کنید بگید ولا لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا ببینید که دین فروشی نکنید نگیرید در مقابل آیات من پول اندک که آیات را کتمان کنید برای مردم راه توجیه باز کنید و درست کنید و پول اندکی بگیرید آیات من را نفروشید یعنی در احکام تحریف نکنید ببینید ولی علماء یهود همین کار را کردن قرآن گفته بود خدا بهشون گفته بود که نکنید این کار را همین کار را کردن و متاسفانه بسیاری از علماء مسلمان که کتمان میکنند قرآن مجید را قرآن را کسی نمیتونه تحریف بکنه چرا تحریف معنوی میکنند یعنی تفسیر میکنن به مالایوراد چیزی که مراد الله نیست تفسیر میکنن بر اساس هوای نفس خودشون تفسیر میکنن بر اساس خواسته های خودشون تفسیر میکنند، اصلا دین را تفسیر میکنند و خلاصه دین را در صفرها قرار میدهند که فکر میکنه کسی دین فقط نام مراسمات است، نام بخور بخور است، لذا اینها هم در واقع در مقابل آیات الهی سمند کلیل میگیرد. الله میفرماید که به اونها الله فرمود ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله هر كسي كه حكم نکند به آنچه که الله نازل فرموده فاولئك هم الكافرون این كافر هست ببینید سوال انجاز كه آیا عمل نکردن به كتاب خدا موجب كفر ميشه چون بسیاری هستند که از همین آیات و امثال این آیات حکم تکفیر صادر می کنند هر مسلمانی که عمل نکند هر حاکمی که قانون خدا را اجرا نکند اون را تکفیر می کنند و جهاد را بر علیه اون لازم می دانند همون چیزی که افراد داعش همین را اعتقاد داشتند و از همین نوع آیات استدلال می‌گرفتند و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون تمام این کسانی که به قوانین خدا عمل نمیکنند و پایبند نیستند اینا کافرند اینا مباح الدم هستند کشتن اونها را مباح میدانستند در حالی که این معنا نیست بلکه و من لم يحکم بما انزل الله مراد از عمل نکردن درجه کامل عمل نکردن است. درجه کامل عمل نکردن، عدم اعتقاد هست، عدم تصدیق هست، عدم حقانیت آن هست که اون را حق نداند این من لم یحکم هست. این را از خودمون نمیگیم. روایتی هست. روایتی هست که همین تفسیر را چه می کند تحیید می کند. اون روایت در مسند امام احمد رحمه الله است. و من لم یحکم بما انزلالله نوشتی و من لم يعتقد بما انزلالله مراد از من لم یحکم چیه من لم يعتقد. یعنی این حکم نکردن حکم نکردن بر اساس جوارح نیست حکم نکردن بر اساس قلب هست یعنی اعتقاد داشتن نباشه بر اساس همین علامه آلوسی نوشته و من لم میفرماد الحکم و انکان كان الشامل للفعل القلب والجوارح حکم شامل بچی میشه به فعل قلب هم میشه به فعل جوارح میشه حکم نکردن عمل نکردن با جوار هم میشه با قلب هم میشه لکن المراد هنا عمل القلب و هو تصدیق لم يحکم یعنی لم يصدق لم يعتقد اینجا مراد عمل قلب هست یعنی تصدیق نکردن بله در این شک نیست که هر کسی که کتاب خدا را تصدیق نکند و کافر است. در ادامه میفرماید ولا نزاع فی کفر من لم به بما انزل الله تعالی در رابطه با کفر اون هیچ شکی نیست اما کسی اعتقاد دارد ولی از روی سستی عمل نمی کند اینکه تکفیر نمیشه این کافر نیست اعتقاد دارد به کتاب خدا ولی خودش تنبلی کند کتاب خدا میگه که نماز بخون کوتاهی میکنند کتاب خدا میگه حجاب کن کوتاهی کند پس برای نخواندن نماز برای عمل نکردن به حجاب برای این کسی کافر نمیشه چرا فسق هست؟ نافرمانی خدا هست. لذا الله می میفرماید که هر کسی که اعتقادی به اونچی که خدا نازل فرموده داشته نباشد این چی هست کافر هست. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس هلا بعد از بيان مساله الرجم البته الرجم قبل ما گفتيم در قران اشاره شص مراد همین اشاره بود وكيف يحكمونك وعندهم التوراة بعد از بيان مساله الرجم الله تعالى قصاص لهم از تورات بيان مفرماية كدر اسلام هم همين هست و كتبنا عليهم فيها برآن ها برآن يهود نوشتیم در أنتورات. آن تورات انن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف انك هر نفس در مقابل نفس کسی کسی را کشت کشت نمیشه ولو انك تفاوت داشتن قاتل و مقدور از نظر قومی از نظر فامیلی از چشم در مقابل چشم گوش در مقابل گوش وال الازون بالازون بینی در مقابل بینی و الازون بالازون گوش در مقابل گوش و سن بسن دندان در مقابل دندان وال الجروح قصاص تمام زخم ها برابری یعنی چه؟ یعنی هر عضوی که کسی قط کرده اگر اونجا قصاص ممکن بود برابری ممکن بود اونجا جب قصاص می گینن گوشش را برین گوشش را می بینیش را بینیش را اگر چشمش را بینائیش را از بین برند چشم بینایی چشمش را از بین البته جایی که قصاص و برابری ممکن نبود امکان داره که کسی قصاص بگیره بی یا بیشتر میشه یا کمتر اونجا به مثل معنوی رجوع میشه به بی همون جریمه مالی اما الله عزوجل توجه فرمای زمنی اینکه الله تعالی تشویق فرموده به چی به قصاص به بخشی تشویق نفرموده بلکه حکم قصاص را بیان فرموده تشویق و ترغیب میده به سمت چی بخشش فمن تصدق بیه ترغیب از کجاست؟ از این که بخشش را اللہ تعالی با صدقه چی می کند؟ تعبیر می کند و ترغیب دوم اینه که فهو کفارت الله یعنی این کسی که تصدق می کند می بخشد یعنی چیز اضافی دادن نه؟ کسی که می بخشد پس این کفاره برای گناهانش است این احکام تورات لذا الله می و من لم يحكم بما انزل الله، فاولائک هم الظالمون هر کسی که حکم نکوند یعنی اعتقاد نداشت واشا به اون چیزی که خدا نازل فرمود این ظالم ها الظالم کامل مراد است که همون کافر میشه وقفینا على آثارهم ان احكام تورات بود. بعد از تورات ما فرستادیم پشت سر اونها آثارهم یعنی آثار انبیاء یحکم به نبییون همه همین انبیاء آمدن بر اساس تورات عمل کردند پشت سر اونها فرستادیم ایس ابن مریم را که مصدقا لما بین یده تصدیق کننده اون کتابی که جلوش بود من التورات یعنی تورات من من بیانی یاست و ما بی عیسی انجیل دادیم هر پیغمبر کی میاد اگر پیغمبر واقعی خدا باشه کتاب های گذشته رد نمیکنه تصدیق و تایید میکنه و مصدق لما بین ادی من التوراۃ و آتیناه ال انجیل فیه هدا و نور الله تعالی انجا انجیل رحم بیان می فرماید که انجیل رما به عیسی دادیم در آن هم هدایت بود هم نور هدایت از نظر اعتقادی نور از نظر عملی یعنی هر کسی که میخواست هدایت بشه عقیده درستی داشته باشه هم عقیدر از انجیل میگرفت و میخواست که در زندگیش نور باشه بر اساس انجیل عمل میکرد و مصدقا لما بین ادهی من التورات و هودا و موعزتا للمتقین و این انجیل هم خود عیسی هم مصدق تورات بود انجیل هم مصدق تورات بود و مصدقن لما بین اده من التورات و در حالی که این انجیل هم هدایت بود هم موعزه بود اما هدایت موعزه برای متقین کسانی که استفاده بکنن از خدا بترسن لذا دستور دادیم که وَلْيَحْكُمْ اهل الْانجیلِ بما انزل الله فِيهِ اهل انجیل باید حکم صادر کنند به اون که الله نازل فرموده در آن اما هر کسی که حکم صادر نکند یعنی اعتقاد داشته باشد و من لم يحکم بما انزل الله فاولائک هم الفاسقون اینها فاسق هستند فسق کامل مراد است فسق کامل هم کفره زول کامل هم کفره الفاسقون و المراد به الدرجه التامله ای المتمردون ان خارجون اند عن, عن, عن الإيمان فسق اصل معناي نافرمانی خدا خروج عن طاعت الله به شکل کمال که خارج بشه انسان کافر میشه که اعتقاد داشت باشه. پس ببینید کسانی که به حکم خدا حکم نکنند به ما انزل الله حکم نکنند فاسقند زالمند کافرند که هر سو مفهوم یکی هست. ظلم کامل فسق کامل که همون کافر میشه. اما مراد کسانی که حکم نکنن مراد از عدم حکم درجه کامل عدم حکم است یعنی عدم اعتقاد عدم حکم با قلب خب این دو مرحله گذشت تورات آمد انبیاء حکم کردن انجیل آمد تا اینکه نوبت قرآن آمد حالا نوبت قرآن است اللہ می فرماید وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ما نازل کردين بسوئي شما كتاب رب بحق نازل کردين مصدقا لما بين يديه من الكتاب درها كتاب تصديق كونن ديك كتاب هاي قبلز انبودند ومهيمنا عليه ومحافظ ورقيب برانها محافظ و رقیب یعنی مراقبت میکنه از تمام مطالب تورات و انجیل هر مطلبی که اینها تحریف کردند جابجا کردند قرآن اصلاح میکنه قرآن اگر در تورات یا در انجیل برخلاف حکم توحید چیزی آمده قرآن میگه اون طور نیست حکم اینه که اینجا در همون انجیل این بیان شده و مُهَيْمِنًا عَلَيْهُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ الله به پیغمبرش میگه پس شما حکم کن بین اینها بر اساس اون که خدا نازل فرموده حتی بین یهود و نصارا وقتی که شما را حکم قرار میدند و لا تَتْبَعَ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ شما از خواهشات اونها پیروی نکن مراد از خواهشات چیه مراد از خواهشات احکام خود ساقته علماء یود و نصر مثلا همین جا رسول اللہ فرمود کہ مگر دیدگاہ شما دیدگاه دینی شما در رابط با یہ گفتن کہ بالاخره چهرش رسیہ کن بدنامش کن تشهیرش کن ضربش اللہ بده. این احکام خود ساقته از خود درست کرده بودن ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق أي معرزا عما جاءك من الحق عادلا عما جاءك من الحق أز أحكام خود ساقتنا ونحن نعلم في حالة عراض كوني أز حق كبير شما شما برأساس إن حق يعني قرآن فسلكون لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة الله يفرمون برأي هر أمتي ما قرار دادمت شما شریعتی و روشی هر امت شریعتی داره و هر امت طریق داره طریق عمل ببینید اون چیزی که در همه امتها بوده از نظر ایمانیات و عقائد هیچ تفاوتی نیست همه امت ها از نظر اعتقاد از نظر اصول چه امت نوح باشد چه امت ابراهیم باشد چه امت محمد باشد امت موسی و عیسی باشند از نظر عقاید ایمانیت هیچ تفاوتی نداشتند از نظر اصول تفاوتی نداشتند اما از نظر مسائل و احکام فرعی اصلن ازدواج طلاق بعضی از معاملات اینها را الله جل بر اساس صلاحیت و نیازهای هر زمان صادر فرموده بر اساس صلاحیت ها و نیازها در هر زمان مثلا در یک زمان نیاز بوده که فرد میتونسته با خواهرش ازدواج کنه جایز بوده در یک زمان جائز بوده که یک فرد دو تا خاهر را همزمان در عقد داشته باشه در شریعت های مختلفی بوده در یک زمان مثلا در عصر حجر تمثال مجسم سازی از قرآن معلوم میشه مجسم سازی جایز بوده انجام میدادند لذا احکام مختلفی بر اساس شرائط هر زمان بر اساس نیازهای هر زمان وجود داشته را میگن شرع و منهاج لکل جعلنا منکم برای هایی که از شما یعنی لکل من الامة لکل امت من الامم جعلنا منکم شرعتا و منهاجا اما شرع و منهاج مانا اشتیه فرقش اشتیه بعضیا چیزای گفتن که علوسی مثلا نقل کرده و خودش رد کرده میگه اشرع الاحکام الفرعیه ببخشید فردیه وال منهاج الاحکام الاعتقادیه ولیس بشی غلطه چون کہ اینا هر دو درباره احکام اعتقادی نیستن بازی میگن شرع از نظر ظهور و وضوح و منهاج از نظر رفتن و عمل کردن بر آن مثلا یک حکمی الله نازل فرموده خیلی واضح است از این جهت که واضح است شرع است همون یک چیز وقتی که شما بهش عمل میکنید میشه منهاج یعنی طریق روش و مولانا دریا آبادی عبدالمجید دریاآبادی که تفسیر ماجدی را نمیشتند ایشو میفرمایند که منظور از شرع احکامی هست که از کتاب الله ثابت است و منظور از منہاج احکامی است که از سنت رسول الله ثابت است احکامی که از کتاب الله ثابت هستند مشخص نماز و زکات اینا اما منہاج انها که از سنت ثابتا ای ای حال منهاج شرعه هر دو مربوط به هستن به اعتقادات نیستن لذا اللہ می که برای هر امتی از شما ما قرار دادیم شرعه یعنی شریعتی و منهاجا طریقی ترق، طریق عمل ولو شاء الله لجعلكم عمت واحده اگر الله می خاص همه شما عمتی واحده قرار میداد همه شما یک دین یک مذهب ولاک بللوكم اما الله تاال همه یه چیز قرار نداد میخوادبی از مع شما را در آنچه که داد به شما. فصل بهقول خیرات پس ای بندگان من در کارهای خیر از همدیگه پیشی بگیرید. بی ببینید این. ولكن لیابلوکم این جاهس این آیه هر جاهس ولی این ولكن استثناهی جا نشده لذا این آیه را ما هر جا تفسیر آیات دیگه قرار می دهیم القرآن یفصر بعضه بعضا ولیکن لیابلوکم حکمت و فلسفه اختلاف شرائع را بیان می کند اختلاف ها را بیان می فرماید در جاهای دیگر نیست. مثلا در سوره هود الله می‌فرمت: ولو شاء الله لجعل الناس واحدة. در سوره شورا شما ولو شاء الله لجعلهم واحدة در سوره راد ولو الله لهذ الناس جميع. در سوره سجده ولو لآتينا كل نفس هداها. اگر ما میخواستیم چرا خدا نخواسته چرا خدا یکی قرار نداده چرا همه موحد نیستن همه مومن نیستن الله میفرماید که اگر خدا میخواست دیگه اختیار را از شما سلم میکرد درسته مثلا جلوی شما راه طاعت و راه معصیت گذاشته اگر خدا میخواست همه شما راه طاعت را بگیرید اون اختیار معصیت را شما سل میکرد همه شما مجبوراً چی میکردید کردیت میکردید. می اون وقت امتحانی نمیشد. شد وقتی کہ صلاحیت گناہ مثل فرشتہ فرشتہ صلاحیت گناہ ندارند اختیاری ندارند چه بخاند چه نخاند تصویح و تقدیس دارند یعنی تصویح و تقدیس برای آنها مثل نفس کشیده ماست. بس اگر خدا میخواست اختیار را از شما سلب میکرد الله این کار را نکرد چون شما را برای امتحان آورده ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم لذا در اون که به شما داده الله میخواست شما را امتحان بکند هم خیر را جلوی شما گذاشته هم شر را هم خوب را هم بد را لذا ای بندگان مخلص الله فستا بقل خیرات در کارهای خیر از هم دیگه پیشی بگیرید إلى الله مرجعكم جميعا فغط و وفغد بسوي الله بازگشت همگی شما فينبهكم بما کنتم فيه تختلفون بشما خبر میدهد الله بر بما کنتم فيه تختلفون در آنچه کی شما درون اختلاف میکردید یعنی فردا خبر میده کی, کی حق بود خب و بينهم بما انزل الله خاندیم که بعداً بعد از تورات و بعد از انجیل ما انزلنا الیکال کتاب بسوی تو ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب را نازل کردیم شما چی کن و انحکن بینهم بما انزل الله ما این کتاب را دادیم تا اینکه شما حکم کنی بین آنها، بین یهود بین آنچه که الله نازل فرموده ولا تتبع احوائهم از احوای اونها پیروی نکن الان خاندیم احوا، یعنی احکام خود ساخته مسائل و آرای کجی اونها که اونها خودشون ساختند اونها را اتباع نکن وحذرهم ان یفتنوک از اونها بر حذر باش این شما را در لغزش واقع کنند از بعضی از ما انزل الله ویلک اونها میخاند که شما این طور فیصلو کنید بر حذر باش اون وقت میلغزید فَإِنْ تَوَلُّوا فَعْلَمَ اگر انها اعراض کردند گفتن نه ما فیصل قرآن رو قبول نمی كنیم فعلم ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم بدان كه الله ميخواد اونهارا در همین دنیا بمصیبت گرفتار بکند در همین دنیا برسند به به بعض زنوبه هم نتیجه بعضی از گناهانشان را و این کثیر من الناس لفاسقون همانا بسیاری از مردم فاسقند بسیاری از مردم از ارز کنم که حکم خدا خارجن حالا این و انحکم بینهم به ما انزل الله بر اساس این تفسیری که ما کردیم بر میگرده به همون گذاشته یعنی بحث چی بود رجم بود و بحث فیصله بین یهود بود اما بعضی برای این آیه شان نزول دیگری بیان میکنند شان نزول هر چی باشه مفهوم امینه بعضی میگوند که یه روزی خدمت آن حضرت صلی الله علیه بعضی از بزرگان یهود آمدند یک اختلافی با هم داشتند کعب ابن اسد آمد که رئیس بنو قریزه بود و عبدالله ابن سوریه آمد شاس ابن قیس آمد اینا آمدن به رسول الله گفتن گفتن شما میدونید نفوذ ما را در میان یهود اگر ما ایمان بیاریم همه یهودی آی ایمان بیارند هیچ کس نمی ماند خب منظور منظور اینه که ما یه بحثی داریم یا اختلافی با کسانی داشتن پیش شما می برای فیصله شما به نفع ما فیصله بعد از اینکه نفع ما فیصله کردی ما ایمان میاریم اون وقت شما میبینی تمام یهود به سوی شما رجوع میکنند رسول الله صلی الله علیه و سلم نپذیرفت گفت نه من چنین کاری نمیکنم لذا او انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم میگن منظور این است که هر چی که خدا نازل کرده حالا دستور برای بقیه علماء مسلمان هم همینه که انحکن بینم به ما الله مردم پولداران سیاسیون سرداران شاید اونها چیزای دیگه بخواهند ولی تنع و انحکن بینهم به ما الله و لا تتبع اهواهم با جوری تفسیر کنیم که در هر زمان این آیه مستاق داشته باشه امروز هم باید بر اساس دستور خدا صادر بکنیم حکم را هرچی که قرآن میگه چی که خدا میگه اصلا مردم را سیاسیون را حکومت داران را در نظر نگیریم خدا را در نظر بگیریم و لا تتبع احواهم و یعنی از تمی ها از تهدید اونها از تتمی اونها بر باش که این یفتنو کم بعض منزل الله و شما را به فتنه واقع میکنن می لغزانند از دستورات خدا بعض معنظر الله. لذا الله تعالیٰ می فرماید کہ اف حکم جاہلیتی ابغون آیا حکم جاهلیت می یعنی حکم جاهلیت چی ہے حکم جاهلیت ان حکمی است که خلاف فیصلی خدا باشد خلاف فیصلی غرآن باشد لذا تمام مسلمانانی که امروز امروز متاثر هستند از غرب و فرهنگ غرب و قوانینشون بعضا بر اساس فرهنگ غرب است، بر اساس فرهنگ کفار است. بلا نسبت دوتا دختر و پسر با هم دیگه وقتی که خودشون راضی هستند الان بعضی از حکومت ها هستند میگه خودشون راضی نمیشه اجبارشون کرد میره هر عمل بدی انجام میدهند این چیزی است که در غرب هست پیش کفار هست این در واقع نشأت میگیر از بی از بی غیرتی افا حکم الجاہلیتی ابغون آیا حکم جاهلیت را میخاند میخاند که از قوانین دستاز انسانها تبعیت بکنند و قانون خدا را نادیده بگیرند در حالی که ومن احسن من الله حکما. لقوم یقینو از نظر حکم کدوم حکم از حکم خدا زیباتر و بهتر کاملتر و جامعتر مفیدتر اما چه کسی نمتوجه میشه چه کسی حکم خدا را زیباترین حکم میدارد این برای قومی هست که یقینون یقین دارد لذا جاهایی که حکام مسلمان میخاند احکام خدا را اجرا کنند تمام دنیای غرب سر و صدا میکنه حقوق بشر چی میشه حکم خدا است فرمان الهی عزوجل لذا سختی ها بعضی سختی ها امکان داره سختی های منطقه‌ای باشند اون سختی های منطقی نظر ما نیست اما اون مسائلی که جزء احکام خدا هستند در اون مسائل نبد کوچکترین نشان داد. اگر کسی به حکم جاهلیت عمل کند، الله طالع ازونها رازی میشه و من احسن من الله حکما لقومی یقینم. لذا بعد از این الله طالع میفرماید که این تمام بر میگردد به اینکه با یهود و نصره شما دوستی دارید، دوست نباشید. یا آیُهَ الَّذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا الْيَهُودُ وَالْنَّصَارَى أُولِيَاءَ ای مؤمنین شما نگیرید یهود و نصارا اولیا دوست صمیمی ببینید این مطلق دوستی نیست ما قبلا در رابطه با موالات بحث کردیم ولی اینجا می‌خوام یه نکته جدیدی عرض بکنم اون اینه که این مطلق نیست یعنی به هیچ وجه با یهود و نصارا ارتباط داشته نباشیم خدا چنین چیزی به ما نگفته و الا مگر رسول الله صلی علیه و سلم با یهود و نصارا معاهده نبستند معاهده را کی شکست؟ یهودی شکست شکستند رسول الله معاهده داشتند پیمان داشتند با یهودی با بن قرزا با بن نذیر، و اهل خیبر هر یکی که معاهده را شکست رسول الله رفت سراغشون برای خیانتشون تنبیشون کرد اجلاعشون کرد بیرونشون کرد پس مطلقاً ارتباط نیست یا مطلقاً دوست شدن نیست. مگر خدای عزوجل اجازه نداده شما دیروز خاندید که زن یهودی میتونید ازدواج کنید زن مسیحی میتونید ازدواج کنید خب این زن یهودی که شما مسلمان ازدواج میکنید فرداف مادر فرزند شما میشه یا نه بالاخره همسر یکی هست مادر یکی هست مطلق دوستی مشکل نداره پس چنو دوستی مشکل داره بسیاری از علما میگویند که مراد از این دوستی اون دوستی هست که بر اساس سمیمیت باشه و رازهار به اونها بگویم یا ایوها الذین آمنو لا تتخذو بطانتن شما خاندی این آئی که مومنی شما اونها را رازدان خودتون قرار ندهید بعضی این میفرمایند و بعضی دیگه میفرمایند که مراد از یهود اون یهود و نصاری که کمر بسته بر علیه حکومت مسلمانان هستن اون زمان در مدینه طیبک حکومتی تشکیل شد و نوپا بود یهود و نصاره کمر بسته بودن که باید این حکومت را از بین ببرند خدا خودشون را از بین برد یک یک الله تعالی اونها را بیرون کرد از مدینه جلاواتن شدند پس وقتی که یهود و نصاره دست به توطعه بزنند دوستی را قدغن کنید ممنوع کنید هیچ رازی به اونها نرسانید هیچ در این جلسه از خودتون سخن نگویید نه اینکه معناش این نیسته که بالله خدای نکرده مطلقا دوستی و مطلقا رابطه داشتن هر نوع رابطه باشد این برای انسان مشکل داره اگر این مشکل داشت خدا اجازه نمیداد ازدواج کنیم ما پس الله می فرماید يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أي مؤمنين شما قرارنا دهيد يهود ونصارى دوست سميمي وقلبي بعضهم أولياء بعض بعض يزونها باهم دوستن بعض شما نيستان ومن يتولهم منكم فإنه منهم هر كسي دوستي كنت أشما بعانان فَإِنَّهُ منهم یعنی هم سمیمیت قلبی همانا او از انحاس اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ همانا الله عز و جل توفیق هدایت نمی دی قوم ظالمین را یعنی وقتی که خیلی دوست بشید با اونها قلبا خدا توفیق حدایت بشما نمیده. دی فَتَرَ این دوستی سمیمی را کی داره؟ دوستی پشت پرده را دوستی قلبی را و رازدانی را که رازها را افشا می کنیم منافقین فطرالذین نفی قلوبهم مرض مرض یسارعون فیهم ببینید یهودی ها منافقین که با اونها دوست می شدند چی بود همون بحانه که امروز خیلی از مسلمانان دارند مسلمانان امروز وقتی که گفته میشه با یهود و نصارا نباید دوست بشیم. میگه بالاخرم در دنیا مشکلاتی هست فردا برای ما مشکلی پیش میاد اینها درد ما میخورند منافقین هم همینه میگفتم میگفتن این دنیا دنیا حوادثه دنیا مسائبه ما باید با اینها دوست میشیم معلوم نیست که فردا قدرت مال اینها باشه اون وقت اگر ما با اونها دشمن باشیم همه ما را نابود میکنند بی از بین میبرند پس برای این توهم این احتمال نگیم توهم بگیم برای این توهم اونها با اونها دوست میشدند فردا الله نشان داد چی شد تمام یهودی که ثروتمندترین بودند پولدارترین بودند دارای بیشترین امکانات بودند را الله تعالی بعد یکی بعد از دیگری خار و زبون کرد زلیل شدند رسول الله انها را بیرون کرد با خفت و خاری رفتند هم بنو قینقا هم بنو نذیر، هم بنو قریزا هم اهل خیبر کسی نماند لذا شرمندگی و سرفکندگی برای کی ماند؟ برای منافقین که می گفتند دوست بشیم با اینها فردا شاید همه چیز به دست اینها بیفته الله می فرماید فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَسْمَبين كسانيرا کہ دل انھا مرض ہا یعنی نفاق اس شک اس یسارعون فيهم باسرعت بیسوی انھا میروند یعنی مسارعت اران زود میرون بیسوی انھا یقولون ان تصيبنا دائرة ما می گفتن اگر ما موالات نکنیم شاید با مصیبتی با مالی مواجه بشیم اینا ما را حمایت میکنن الله میفرماید فاصل الله ان یاتی بالفتح او امر من عنده عسى الله عصای خدا به معنی وعده خداست نه وعده الله ان یاتی بالفتح ان کی بیا ورث فتح بیاره برای شما مسلمانان و منافقین را رسوا کنند او امر من عنده یا امر از جانب خودش فیصبحوا على ما اثر رو فی انفسهم نادمین پس بگردند همین منافقین بران چکه اونها مخفی کردند در دل داشتند ما اثر رو فی انفسهم در دلشون چی بود همین که ما مغلوب بشیم شکست بخوریم همین را فکر می اینا نادم بشند چون منافقشون ظاهر زا، میشه و الذین آمنوا آها اولئک الذین أَقْسَمُ اقسموا بالله جهاد ایمانیهم انهم لمعكم و میگوین که سانکی ایمان آوردن به منافقین آیه اینه اقسموا بالله جهاد ایمانیهم سوگند یاد کردن به الله نهایت سوگندشان را غلیظ تری سوگند را که اینا باشوا هستن شما قسم یاد میکردید حالا ببین چی شد حبتت اعمالهوم اعمالشون برباد شدن فاصبحو خاسری خاسس شدن ناکام و نامراد یا ایها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين بحث مرتدین است ببینید بحث مرتدین با بحث موالات با یهود و نصارت چه رابطه داره اولا ربط آیه را خدمتش معارض بیکنم ربطش اینه که موالات زیاد و دوستی زیاد سبب چی میشه ارتداد میشه سبب ارتداد از دین میشه همین امروز شما ببینید نگاه بکنید خیلی از مسلمانان هستند از کشورهای اسلامی اینا رفتند برای زندگی به طرف غرب به طرف یهود رفتند به طرف نصارا رفتند از همین کشور ایران رفتند از کشورهای دیگر رفتند اونجا رفتند زوب شدند اونجا رفتند جذب شدند میبینیم که الان کلیپ هایشون میاد صحبت هایشون میاد در صحبتهاشون ارتداد پیدا میشه اصلا همون حرف اونها رو میزنند همون دیدگاه و نظرات اونها رو دارند لذا ما علوسی میگه بیان ان موالاتهم مستدعیه للارتداد عن الدين این آیه داره بیان میکنه که دوستی با یهود و نصارا سبب چی میشه ارتداد از دین میشه اما اینجا الله عز وجل می فرماید ای مومنین اگر شما برگردید از دین خدا پروایی نداره خدا گروه دیگر قوم دیگر را که اونها صفات اهل ایمان را دارند اول ترجمه آیه یا ایها الذين امنوا أي مؤمنين من يرتد منكم عن دينه هر كسي كبرغرد أز دينش فسوف يأتي الله بقوم يعني فلا يضر, يضر الله فلا يضر دين الله يضر دين خدا رزالة نمي دين جزاة جواب است چرا فسوف يأتي الله بقوم ان قريب مياورد الله قوم راك يحبهم ويحبونه الله انها ردوس دارد وانها الله ردوس دارد اذلة على المؤمنین که انها مؤمنین عاجزا در مقابل مؤمنین نرمند یعنی عاجزی می کنن اعزت على الكافرین بر برکافرین يجاهدون في سبيل الله صفات انها انها جهاد می در راه الله ولا يخافون لوم تلائم انها از ملامت ایچ ملامت کنن دین می ترسند ببینید مصداق این آیه چیه اولا این را خدمت شما عرض کنم که در زمان رسول الله صلی علیه و وسلم هیچ کسی مرتد نشده به این صورت به صورت دست جمعی که آیه میگه بجای این قوم قوم دیگری نمیاریم اصلا چینین چیزی نبوده فقط تک تو که گاهی مثل همون بشریه تومه ابن او بیرق شواخان دید کرد بعد مرتد شد رفت مکه اونجا مرد یا مثلا ام حکم بنت ابی صوفیان مرتد شد از مدینه رفت مکه این نوع افرادی بودن تک تکتوکی ولی این که بیاد قومی دست جمعی بشه در زمان رسول الله چنین چیزی نبوده پس این آیه به اتفاق مفسرین این پیشگویی هست در باره آینده در ارتباط با آینده که اگر هر کسی از شما مرتد بشه الله پروائی نداره برای دین خدا ضرری نداره خدا دیگه رادمردانی میاره که اوناها جهاد میکنند خدا اونها رو دوست دارن اونها خدا رو دوست دارن در مقابل مؤمن خیلی عجز دارن فروتنی دارن نرمش دارن اما بر کفار سخت و غالب هستند بعضی از این اتفاقات بعد از وفات رسول الله اتفاق افتاد بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و وسلم با تحریک همین یهود با تحریک یهود ابن سبا و امثالهم مسلمانان اون مسلمانانی که اعرابی بودن تازه مسلمان شده بودن دهاتی بودن زیاد اطلاعاتی نداشتند به این سمت اون سمت رفتند ها رفتن با این مدعیان جدید نبوت اونا ادعا کردن فکر کردن الان بعد از سنت که پیغمبری مالون هست بعضی رفتن به اونها گرهیدند بعضی ها رفتند انکار کردند زکات را گفتند زکات شما چرا میلی مخصوص زمان رسول الله بود این نوع بودند اما با اینها چه کسی مبارزه کرد در رأس ابو بکر صدیق رضی اللہ همه صحابه چنانچه اینجا تفسیر خازن از قول سیدنا علی نقل کرده که يحبهم ويحبونه ازله على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو قال علي بن أبي طالب والحسن وقتاده هم ابو بكر واصحابه كيفه جهاد کرد ابو جهاد کرد اصحاب ابو جهاد کرد بعضی از مسلمان ها در سپاه ابو بكر بالخصوص قبیله بود قبلا خیلی دشمن مسلمانان بود ما بعدا مسلمان شد بنو سقیف اینا مردانه در کنار ابو قرار گرفتند لذا بعضی از اقوام تازه مسلمان شده بودند مثل اهل طائف، مثل اهل حنین مثل بنو سقیف و در یک روایتی است که روز ابو موسیٰ اشعری نشسته بود رسول الله این آقیر خاندن اشاره به ابو موسیٰ اشعری کردن که از قوم این در آینده میایند که همون اهل یمن هستند اونها لذا الله عزوجل پیشگویی میفرماد برای آینده که اگر کسی مرتد بشه و به دین خدا ضرر نمیرساند الله عزوجل انتخاب میکند انتخاب میکند راد مردانی را مجاهدانی را سر بکافی را که اونها لا خافون فی الله لومتا لاهم. ازد تا وی چی ندارد. هر چی گفتن خطر است، مشکل. قسم یاد کرد که سپاهی را که رسول الله فرستاده من می فرستم. من به تنهایی در مقابل همین فتنه چنان اступم. چنانچي استاد همه را کالو کم کرد. همه فتنه را خاموش کرد. پس اشاره به انجاز. يا ايها الذين من مايرتد منكم عن دينه هر کسی که برگردد از شما از دینش فلا یزوره، عن شیعه، بدنی خدا هیچ چیزی زرر نمی‌رسه. فسوف یات الله بقوم ان قریب میاد. ورد الله قومی را که يحبهم و يحبونه. الله عنها ردوس دارد و عنها الله ردوس دارند. اذلة على المؤمنين، اینها عاجزي دارند، علیم الم... بمانی للمؤمنین. برای مؤمنین عزت على الكافرین، اما بر كافرین غالب هستن، یجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنند در راه الله، ولا يخافون لوم تلائم نمی نمیترسن از ملامتی چه ملامت, ملامت کنندی، ذالک فضل الله اصفات، کینها در فضل, فضل الله، ذالک فضل الله، من يشاء. الله این صفات را میدهد به هر کسی که بخواهد. والله الله علیم. الله هواسی یعنی در درباری الله همه چیز فراوان و فراخس. علیم هست الله همه چیز را میداند. انما ولیکم الله و رسوله این محل موالات است. الله فرمود که شما با یهود با دوست باشید باقی دوست باشیم. محل موالات. انما وليكم الله ورسوله جزئنيس کے ولی شما دوست و شما و حامی شما اللہ اس و رسولش ہس و الذین آمنوا ان ایمان آوردند ان که ایمان آوردند وصف مومن چی ہے صفات مومنین الذین یقیمون الصلاۃ ان که نماز را برپا میدارند دارند و یاتون الزکات و زکات می دهند و هم راکعون آنها در مقابل مسلمانان خشوع میکنند کنند ببین یقمون الصلاه عبادت جانی یاتون الزکات عبادت مالی و هم راکعون این اخلاق اخلاق مداری است متوجه شدید حالا مصداق این آیه چی هست خوب دقت کنید نکته مهم میخواهم عرض کنم تفسیرها مختلف نوشته بعضی نوشتن که شأن نزول این آیه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نوست بعضی میگن سیدنا علی هست بعضی میگن عباده بن سامت هست ولی اصلش اینه که هر کسی مصداق اول باشه اینجا مراد که شما دوست بشید با همه مؤمنین هر مؤمنی کی انصفات را داره مگر امروز عبادت تشریف داره علی تشریف داره یا ابو بک نیستن اینا یعنی موالات شما مسلمانان ببین آیات الہی عام هستند مصادیق عام هستند البته اون یک روایتی که حضرت علی نماز میخوان در حالت رکوع بود یک فقیر آمد پیش انگشتری خودش را داد به عنوان زکات این روایت بالاخره روایت درستی نیست سند درستی نداره به چه دلیل به دلیل اینکه اولا سیدنا علی وقتی که نماز می‌خوند حواسش به فقیر فقران نبود حواسش به خدا بود معروف هست که در نماز تیر را ترکش تیر راش پاش در آوردند اون چطور در نماز اینقدر توجهش هست که انگشرت را در بیارد و به بفقیر نماز فاسد میشه این عمل کثیر است اصلا این روایت با شأن جائقه سيدنا هم همخانی ندارد و دیگه اینجا مراد از وهم راکیون در حال رکو نیست بلکه والمراد من الرکو الخضوع ها هنا الخضوع والمعنا ان المؤمنین يسلون و يزکون و هم منقادون خازعون لأوامر الله و نواهی و هم یعنی در مقابل دستورات خدا کاملا تسلیم و بعضی میگن و هم راکعون یعنی خاشعون متوازعون لله این روح المانی نوشته ولی رخازن نوشته همه تفاصیل این نوشتند لذا یک فرد اگر مراد بود سیغه جم خدا استفاده نمی فرمودند. معروف است به فرزند امام زین العابدین امام محمد محمد ابن علی همون محمد امام باقیره معروف است به امام باقیر به ایشون کسی گفت که آیا مراد از این سیدن علی هست گفت علی هم جز همین مومنین است بله سیدنا علی از آیه خارج نیست ولی مراد از این تمام کسانی الذین آمنوا تمام کسانی که دارای این اوصاف هستند یعنی ای مؤمن با اینها دوست بشید امروز هم شما با کسانی موالات کنید با کسانی دوست بشید که یقومون الصلاه یاتون الزکات وهم راکعون نماز برپا می دارند زکات میدن و خشو خضوع مثل ملل یهود متکبر نیستند آنها خیلی تکبر داشتند اللہ تعالی می کسی که با خدا و رسول و مومنین بازم سیغ جمعید مومنین دوست باشد اون جز حزب خدا است و حزب اللہ غالب است و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا این برکات دوستی هست هر کسی که دوستی داشته باشد با الله با رسولش و الذين و با کسانی که ایمان آوردند فإن حزب الله هم الغالبون اون حزب الله و حزب الله غالب هست پس عزیزان این نکته از قرآن کریم خوب بگیرید محکم بگیرید که الله دوست دارد ما دوست مؤمنان باشیم اول دوست خدا خدا را دوست داشته باشیم رسول خدا را دوست داشته باشیم و علامت دوستی خدا و رسول خدا اطاعت و اتباه است اطاعت الله اتباع رسول الله و بعد با صالحین یعنی با اون دست از مسلمانانی رفت و آمد داشته باشیم نشست و برخواست برخواست که اونها صفات دارند صفات ایمانی دارند عمل دارند یقیمون السلاة یعطون الزکات، مهم راکعون متوازی اخلاق مدارند خوبند ولی متاسفانه مسلمانان افتخارات دوستی اونها مادیات هست یک کسی که مثلا با بزرگترین سرمایه اگر سلام علیکم دارد ارتباطی دارد با افتخار میگه من با فلانی ارتباط دارم اصلا شماره تلفنش تو گوشی هم هست هر وقت بخوام بهش زنگ میزنم این افتخار نیست این که یکی میگفت من با فلانی داری ما با هم یک صفر قضا خوردیم این ای افتخار نیست کسی که یک رکت حتی نماز نمیخاند ولی خب پول دارد پست دارد یعنی خیلی ما از مسیر دور هستیم بعضی از ما افتخار و اون چیزی که سبب موفقیت در دنیا و آخرت میشه از نگاه الله از نگاه قرآن اینه که انسان محبت داشته باشه بعد از خدا و رسول خدا با صالحان با کسانی که بالاخره متیر الله و متبع رسول الله هستند. یا ایوها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا بازم موضوع ترک موالات است الله میفرماید کسانی که دین شما را مسخره میکنند با اینها دوست نشید بیشتر اینها یهودی ها بودند یهود مسخره میکردند یهود چند چیز را مسخره میکردند یکی معروف است که سجده را مسخره میکردند علما و مفسرین نوشتند که وقتی مسلمانان به سجده میرفتند اینا خیلی میخندیدند و تمسخر میکردند چون معلومه که سجده در دین اونها نبوده الله اعلم در عبادت اونها نبوده فقط رکوع بوده یا حرکات دیگر لذا این سجده که هست در ما یا اذان را و اذا نادیتم الی الصلاه اتخذوها اذان را مسخره میکنند هنه قوش میکا دنو ميخن یک غیر مسلمان مسلمان یک غیر مسلمان بدون کند و الله اكبر الله اكبر سبحان الله اشهد ان اله الا الله اشهد ان محمد الله حی على الصلاح حی على الفلاح وقتی که کسی بدون تعصب گوش کنه واقعا تاثیر داره در انسان انسان متاثر میشه اما وقتی که انسان معاند باشه مسخره میکنه مثلا چطور شما دوست میشید با کسانی که دین خود شما را اینطور مسخره میکنن نماز شما رو مسخره میکنن اذان شما رو مسخره میکنن احکام شما رو مسخره میکنن خیلی ها الان هست از مسلمان نماها ما باید با اینها دوست نشیم اصلا ارتباط نباید باشه اونها مسخره میکنن مسجد دارن مسخره میکنن کسی نماز میخونه سوفی شده مسخرش میکنن میخندند یه جوانی میگفت که من بالاخره تبلیغ رفتم از تبلیغ برگشتم خودش نمیگفت کسی دیگه میگفت از تبلیغ برمیگشت برگشته بود میگفت که همیشه میرفت مسجد و ازان می گفت. از بس که دل داده مسجد شده بود اما اینقدر مسخرهش کردن بقیه جوان ها اینقدر که آخر پا اش را کرد به مسجد نمی رفت خب با این نوع افراد نشست و برخواست نتیجه شمی میشه که پایت از مسجد من قطع و متاسفانه امروز با این نوع اوباش ها و کسانی که بدترین گناهان و معاصی را میکنند و به بعضی از احکام دین تمسخر هم میکنند علماء هم با اینها ارتباط دارند خانه هایشون میرند حالا به منظور تبلیغ هدایت و تعلیف قلوب اشکال نداره ولی انسان با اونها رفاقت داشته باشه که میشه به دعوتشون بره این مشکل داره قرآن میگه بالاخره کسانی که مسخره میکنند دین شما را با اینها ارتباط داشته نباشید. الله میفرماید یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ای مؤمنین شما نگیرید آنها ایراکی گرفتن دین شما را مسخره و بازیچه آنها را دوست نگیرید من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار من بیانی است یعنی بیان چیه یعنی کسانی که کتاب داده شدن قبل از شما و همچنین با کفار اینها را نگیرید چی نگیرید لا تتخزو الذین مفعول اولی شس اولیاء مفعول دومی یعنی لا تتخزوهم اولیاء اینها را به عنوان دوست سمیمی انتخاب نکنید واتقو الله محلوم میشه ناراض میشه از الله بیتر سید در رابطه با دوستی کفار اگر مؤمن هستید یعنی ایمان تقاضا می مطلقاً مطلقا با انها ایک دین خدا را مسخل می کند دوست نشیم و الله عز و جل علت دیگری بیان می به ازان و فروع دین تمسخور می و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها حضوم و لعبا هرگا شما ندامی کنید شما می شما صدا می زنید به سوی نماز می گیرند اون شما را اذان شما را و العبا مسخره و بازیچه به مسخره مسخر و ذالک بأنهم قوم لا يعقلون این علت است این به سبب این است که اینا قومی است که عقل ندارد دین را متوجه نیستند قل یا اهل الكتاب ال تنقمون منا الله عز و جل سرزنش می فرماید عطاب می فرماید اهل کتاب را و علت اصلی اداوت اونها را بیان می فرماید بگو ای اهل کتاب هل تنقمون من نا نقم معنای عیب است یعنی شما از ما عیب جوی نمی کنید عیب دیگر را بر ما نمی گیرید مگر عیب ما این است یعنی اشکال ما از نظر شما اینه که ان آمننا بالله ما ايمان بخدا آوردی وما انزل الينا ايمان بكتابي كي برما نازل شده به وما انزل من قبل بكتاب هاي كي قبل از قران نازل شده وان اكثركم فاسقون وان بدونيد ان جا واعلم مقدرس بدانيد كي اكثر شما فاسقيد انس دين خدا خارجيد شما ما را مسخره مي چون ما ایمان به خدا داریم ایمان به محمد داریم ایمان به قرآن داریم امروز متاسفانه شما گاهی ببینید رسانه های دشمنان را رسانه های یهود و نصاره را همیش مسخره مسخره به احکام اسلام همش کاریکاتور میکشن که اینها خشنن اینها از عهد حجرن اینها فلانه همش اینها اصلا اصلا اینها تحمل ندارند. این حسادت هي. الله تعالی می فرماید که قل هل انبئکم بشر من ذلك آیا شما را خبر بدم بدتر از این را شما دین ما را مسخره میکنید بدتر از این را چون یهودی ها چی گفتند لما قالوا ما نعرف الدين شر من دينكم ما دینی بدتر از دین شما سراغ نداریم به مسلمانان گفت هی hey, گفتند بعض از اهل تفسیر نوشته که بعضی از افراد یهود و علماء یهود آمدن پیش رسول الله صلی علیه و سلم و گفتند شما از انبیا کی را قبول دارید از پیانبران کدوم پیانبر را قبول دارید رسول الله نام بردن از سیدنا ابراهیم نام بردن ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب و همه آبا اجداد انها را تا آمدن بی ایسا اسارا گفت: اسارا شما به عنوان پیغمبر قبول دارید؟ بله قبول دارید آنها گفتند پس ما نعرف دینا شر من دینکم. ما دین بدتر از دین شما سراغ نداریم. الله جواب داد: قل هل انبئکم بشر من ذلك؟ شما بگم بدتر از این؟ سبحان الله. الله عز و جل با چی کنایی تمام به اصطلاح عوام پیچھای اونها را گرفت اشاره کرد به تمام خباستها در طول تاریخ قل هل اونبیوکم بشر من ذالک مسوبتن عند الله از نظر نتیجه از نظر جزا سواب همون جزاست از نظر جزا و نتیجه نزد خدا یعنی نتیجه بدترین نتیجه را بگم کدوم دین داشته مالک کی بوده؟ من لعنه الله اون کسی که اللہ را لعنت کرده و غضب علی بر او غضب کرده مسلمه یهوده نه؟ و جعل منهم القرده و اون کسی که خداوند اون کسانی که از انا خداوند محمود ساخته والخنازیر خنزیر ساخته و عبدالطاغود بندگان طاغود ساخته اولایک شر مکانا این ها بدترین هستند نظر جایگا و اضل عن سواء السبیل گمراه ترین هستند راه راست این هستند نه مسلمانان و اللہ عز و جل می فرماید وقتی که شما اینها رب بگید انها ساکت میشن لا جواب میشن فاسقی دیگری ندارن بعد از این بعض هم سرزنش برای منافقین همین منافقینی که پشت پرده یهودی هستن و اذا جاؤکم قالو آمنا هر پیسی شما میامی ما ایمان آوردیم در حالی که و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجو به اینا در کفر داخل شدند و ها خارج شدند با همان کفر از اسلام والله عالم و و یک تومون الله بهتر میداند اون چیزی که اینها که تمان کردند مخفی کردند یعنی در دلشون نفاق را کفر را کتمن کردند و بعد الله عزوجل اینجا خباست های دیگر یهود را ذکر می فرماید عوام یهود و از کنم که ملت یهود همه اینها بعضی از علماء ملاهایشون همه این خباست ها را داشتند لذا اللہ تعالی انهار رزق میفرماید و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان بسیار یوزنهار میبینید که بسرعت سرعت میروند به گناه و تجاوز تجاوز در حدود الهی گناه مثل همین که ابن الله میگن و اخلهم الصوت رشوه خاری حرام خاری لبئسا ما كانوا يعملون بسیار بد عمل میکنن اینها بسیار بد است اون چیز کامل میکنند چرا احبار و رهبان انها باز نمی معلوم معلومی شکی این عمل کرده عموم هست لولا ینها هم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و, اک... اثم و اکلهم و سعد چرا باز نمیدارن دارا را دره و ششان و از سخانی گناه سخانی گناه کلمه شرکی و نمن الله و از خردن حرام حرام چی هست؟ یا نیازات لغیر الله هست یا ربا هست رشوه هست همه اینها را داشتند لبی سما کن و بسیار بد هست آنچه که اینها انجام می یعنی بد عمل می کنند اینها بله وقالت اليهود ید الله مغلوله غلت ايديهم و لعنه بما قالوا الله تعالى می‌فرماد که یهود گفت که دست خدا بسته است علی عزوب الله یعنی اشاره به بخلس تو خداوند علیاذوب الله بخیل است بسته است به معنی چی بخیل الله تعالی می فرماید غلت ایدیهم به بما قالوا دست هایشون بسته بشه یا دستهاشون بسته شده هم خبر است هم جمله دعایی هر دو احتمال است. عرض می کنم چطور و لعنو بما قالو و این مورد لعنت قرار گرفتن به اون آنچه که گفتند. ملعونم این ها لعنت خدا بر این هست ببینید این آیه گرچه یک یهودی یه گفت یا دو نفر گفتن بعضی میگن که نباش ابن قیس این را گفت و بعضی میگن که فردی به نام فخاز این را گفت چونکه باران نیامد قحط بود هیچی نبود اینا گفتن الله مغلوله خب یک نفر دو نفر بگه چرا به سمت همه یهودی ها نسبت داده شده به خاطر این که اینا که میگفتند علمایشون نگاه میکردند هیچ عکس عملی نشان نمیدادند پس علما راضی بودند بقیه یهودی ها با این گفته چی بودند موافق بودند وقتی که کسی گناهی می‌کند، کلمه کفری میگه و بعضی از کلمات که در اون کلمات اصحای ادب است نسبت به الله عزوجل و و ما هم بخندیم و دهانشون را نگاه بکنیم پس ما موافقیم بسیاری هستند امروز در همین فضاهای مجازی چنین کلماتی میگن چنین تمسخور میکنند بعضی دوزخ را مسخره میکنند قبلا خدمت شما عرض کردم کلیب درست میکنند که دارم به دوزخ می روند و اونجا هم با هم دیگه خوشحال هستند و شاد هستند و جلسه دارند و کنفرانس دارند و مشوره دارند چه کار بکنیم اینها را که وقتی که اونها بگند و ما ببینیم و ما هم مسخره بکنیم و تایید بکنیم و تشکر بکنیم که شما کلیپی خوبی ساختید ما مسلمانان، هم ما هم با اونها در این جرم شریکیم همین کار را میکردند بقیه یهودی ها اگر یک نفر دو نفر گفت بقیه تایید می بقیه بالاخره بهبه می گفتند، چه چه می گفتند. الله می فرماید وقالت یهود و يد الله مغلوله یهود گفتند يد الله مغلوله دست خدا بسته یعنی بخیره غلت ایدیهم از کردم غلت ایدیهم یا خبر هست یعنی دست های اونها بسته شده اونها بقیلند یا بسته بشه بعضی میگن که این عذابی هست که در روز قیامت برای اونها هست که دست های اونها بسته هست یعنی این گروه را الله تعالی علامت اینها که این کفر را کردن دستهشون را اللہ میبنده و لوعنو بما قالو اینها مورد لعنت و نفرین قرار گرفتن به سبب که گفتن بل يداه مبسوطتان بلک دستهای الله باز هستند یعنی همیشه الله رحمتش جاری است ينفق كيف يشاء الله به هر صورتی که بخواد خرج میکنه ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل الیک من ربک طغyana وكفرا البته حتما حتما اضافه میکند در بسیاری از آنان در بسیاری از یهود چه اضافه میکند ما انزل الکی من ربیکا یعنی قرآن قرآن در اونها اضافه میکنه چیشون را اضافه میکنند تغیان و کفره تغیان و کفرشون را اضافه کند یعنی هرچی که آیات قرآن نازل میشه بیشترینا سرکشی میکنند بیشتر کفر میکنند کلما آوقد نارا للحرب حرب کی کینه روشن میکنه آتشی بر جنگ فتنه میخوام بر علی مسلمانان ایجاد بکنند الله. اللہ اونا میکنه و ویسعونا فی الارض فسادا اینا تلاش میکنن در زمین فساد را ببین یهودی ها شما تاریخشون را نگاه کنید بخشی را شما در قرآن خان چه چقدر سائی کردن اینا برای فتنه بنو نظیر سائی کرد رسول الله را از بین ببره بنو قریزا در اون جنگی که با جنگ احزاب شرکت کرد عهد را شکستن بنو نظیر رفتن تحریک کردن مشرکین را اینا همه آتش بود آتش هایی که اینها روشن میکردن فتنهایی که اینها آغاز میکردن الله اللہ میکرد. می والله لا يحب المفسدین الله عز و جل چنین مفسدین را دوست ندارد خب اهل کتاب این همه ناکام شدند این همه ناموفق شدند حالا الله عز و جل می فرماید که برگردن بیان ایمان بیاورند، بیایم بترسند از خدا. بیشتر بیشتر ادامه ندن کفر و خواسط را ولو ان اهل الكتاب ترغيب اهل كتاب است ولو ان اهل الكتاب آمنوا اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا از خدا پروا داشته باشند از خدا بترسان لکفرنا عنهم سیئاتهم دور می‌گردانیم از آنها جزای بدیهایشون را همه گذشت را الله پاک می‌کنه چرا رب مهربانی است فقط برگرد ولا ادخلناهم جنات النعیم البته حتما حتما اونها را داخل میگردانیم در جناتی که سراب نعمت است برگشتن چیه است به عمل کردن به انجیل عمل کردن به قرآن عمل کردن عمل به تورات چیه؟ تورات دو موضوع در تورات برجسته است. هم در انجیل یکی توحید یکی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معنیشی نیست که به تورات در جای خودش عمل کنند تو همون معبد خودشون تو کلیسای خودشون بشین همون جا عمل کنند نه. در تورات در رابطه با ایمان به محمد آمده بود به اون عمل کند ولو انهم اقام التوراة والإنجيل اگر انھا قائم کنن برپا کنن تورات و انجیل را عامل بتوراة و انجیل باشند و بعد از تورات و وما انزل إليهم من ربهم وهم سنن اگر برپا بدارند عمل کنند به آنچه که نازل شده به سوی از جانب رب با واسطه نبی قاتم آخرین پیامبر خدا یعنی به قرآن هم عمل کنند. اون وقت برکات نازل میشه. اون وقت خدا باران میاره. اون وقت خدا تعالی فراخی میاره. لاکالوه من فوقهم و من تحت ارجلهم میخورند از بالای سر و زیر پا. یعنی چه؟ قال ابن عباس وغيره يعني المطر والنبات وقيل المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم وأكلوا متواصلا رزق رواسي يكوني بيا بيونها مي, مي خرط لذا ان دعوته إن هم الكفر قوتيد إن هم التمسخر كارديد إن هم الدسيسة وتوتة كارديد بجاة نرسي دي برگر دي د. الله دعوت بي لا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم از بالا سر يعني بارا نازل ميشه وزير با يعني بركات زميني همه بلند ميشه منهم امت مقتصدة بعضهم قبلنا خدمت شمع عرض کردم الله از خباستها انها مي فرما يد از فتنها انها مي فرما يد. از سرکشی های انها می فرماید اما بعض هم می فرماید که یک گروهی هستند که میان رواند اون اندک مسلمانانی که از اینها ایمان آورده هر جا الله اونا را استسلامی فرماید واقعاً قدردان بندگان هست شما خوب باشید یک نفر باشید شما را الله لحاظ میکنه شما را در نظر بیگیره منهم امتم مقتصده از همین ها یک گروهی هستن میان رو یعنی موحد یعنی چی موحد عبدالله السلام امن سلام اعمارش انصارش و کثیر منهم صا ما يعملون اما بسیاری از این ها هستن که بسیار بد عمل میکنند بسیار بد عمل میکنند لذا اینها هستن بسیاریشان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أما أي رسول من شما هر شيء سوي الله بشما وحشه شما برسال بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني شما لهذا يهودية نكون لهذه أهل را نكون وإن لم تفعل أذكر بالفرض این کار را نکردی فما بلغت رسالتا رسالت و پیام الهی را شما نرساندی اما اگر از سوی دشمنان احساس خطر میکنی والله یعصمک من الناس ان تذمین الهی الله شما را از مردم حفاظت میکنه پس میبینید رسول صلی الله علیه و وسلم تمام آنچه که بر ایشان بوده رسانده، هیچ چیزی را مخفی نکرده. و هیچ چیزی را اگر کسی, اعتقادی داشته کسی اعتقاد داشته باشد، ام مؤمنین عایشه در اون حدیثی که بیان فرمودن، اینکه این بود که هر کسی که اعتقاد داشته باشد که محمد صلی الله علیه و سلم یک چیزی را کتمان کرده، اون کفر کرده. رسول اللہ هیچ چیزی را کتمان نکرده. همه چیز را رسانده همه چیز را حتی آیاتی که در اون آیات اتاب برای خود رسول الله است تذکر برای خود رسول الله است این آیات امروز ان الله بعد از ظهر شما می یکی از اون آیات ابس و ان جاءه الاعمى چهره چهرهش شد درهم برهم شد که یک نابینای مخلص آمد این آیه بر رسول الله است لذا چنین آیاتی را هم رساندند. حالا بعضی کسانی که ما میگیم یا قرآن را نمی فهمند یا قرآن را مطابق هوای خودشون تفسیر می کنند میگن یا ایو الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک من ولایت علی یا من امامت علی ولایت علی را اعلام کن امامت علی را اعلام کن اینجا ببینی بسیه این بحثا هست، تمام بگو مگو به یهود و نصارا هست، کشمکش با انها است، اونها میخواستن که پیغمبر در رابطه با اونها مقدار نرمش نشان بده، الله تعالی اونها را میگه که سراحتا جواب بده و به اونها برسند کلام خدا را، اینجا الان شما خاندی، بعد از این میخانیم، قل یا اهل کتاب لستم علا تا زمانی که شما به تورات و انجیل و قرآن عمل نکنید به محمد ایمان نیاوری شما هیچ ارز کنم جایگاهی ندارید شما هیچ ارزشی ندارید سخن با یهود درسته آیه موردش عام هست تمام اون چیزی که بر احده رسول الله برسانه در رابطه با مسئله علی و ولایت علی نیست چنین چیزی را الله الزواجال چرا سراحت نگوید مگر امامت از نظر همین عزیزان جزء اصول دین نیست، جزء اصول دینه. حالا اصول دین توحید نبوت هست، معاد هست، امامت هست، عدل است. حالا ببینید شما آیاتی که درباره توحید است؟ چقدر سریح چقدر شفاف. آیاتی که در رابطه با نبووت است الله عزوجل برای اثبات توحید چه مثال‌هایی بیان می‌فرما مثال مگس میاد مثال انکبوت میاد مثال غلام میاد مثال‌های دیگه میاد و برای اثبات رسالت اثبات معاد و قیامت الله چقدر سوگند یاد میکنه؟ قسم یاد میکنه. چه دلائل زک میشه چه مثال های عجیبی ذکر میشه اما بحث امامت اگر امامت جزء اصول هست تو واقعا پیامبر اینجا گفته که شما بیان کن چرا هیچ جای سریح نیست همه چیز در لفافه به صورتی کنایه الیازب الله الله از کی میترسه اللہ تعالیٰ نمیگه که ولایت علی را بیان کن بلغ ما هنزل ایلی که من ربک ما هر کسی عربی بلد میدونی که ما عام هست هر چی که نازل شده هر چی که نازل شده همینه در قرآن است این بحث جز اصول نیست و جز مسائلی نیست که اللہ عز و جل اونو تعین کرده باشد و ایلا اگر اللہ عز و جل تعین می کرد اللہ تعالیٰ شفاف صریح اللہ از هیچ کسی واهمه ای نداره رسول اللہ از هیچ کسی بیمی نداره رسالت چرا مخفی بکنه چرا در به قول اینها کی میگن در حجت الوداع اعلام کردند چرا در عرفات اعلام نشد که تمام خلائق بودند اونجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در بیان در رابطه با اینکه چون حجت الوداع آخر ان حج است در رابطه با اینکه پیام خدا را رسانده سه بار از مردم اصحاب از اعتراف می‌گیره سه بار اللهم اشهد می‌فرماید بعد هر به راه خودش میره بعد در دوراهی غدیر خم اونجا چرا به اعلام میشه اونجا این اعلام نشد اونجا رفع اتهام شد از سیدنا علی کرم الله واجه که این اتهام بی جای بی اساسی میگفتند نه اینکه بحث امامت باشه اگر بحث امامت باشه چرا کلمه مولا بفرماید که مولا بر اساس اهل لغت میگن بیست خورده معنی داره بعضی از معانی مولا را گفتم مولا به معنی آغا مولا به معنی سید مولا به معنی غلام آزاد شده مولا به معنی عرض کنم پسرمو حتی میاد مولا به معنی دوست میاد مولا به معنی صاحب اختیار میاد چندی معنی دارد چرا چنین کلمه کثیر المعنی را استفاده بکنند که امروز 1400 و اندی سال گذشته هنوز مسلمانان در رابطه با معنیش اختلاف در یکی بگه این معنی که بگه این معنا. اگر این مسئله جز اصول دین هست چرا اینطور شفاف بیان نمیشه در لفافه بیان میشه لذا همون طور که از آیات قرآن است در این آیه الله عز و جل در ارتباط با مطلق پیام الله در رابطه با احکام مسائل بالخصوص خصوص عقاید توحید که مشرکین و اهل کتاب مشکل داشتن با اون در رابطه با اینها بیان میفرمايت و به پیامبر گفته میشه والله يعصمك من الناس الله شما را از شر مردم حفاظت میفرمايت ان الله لا يهدي القوم الكافرين اما اینها که در تقدیرشون هدایت نیست خداوند اینها را این کافرین را توفیق هدایت نمی فرماید در آیات گذشته و آیاتی که داریم میخانیم روی سخن با علماء اهل کتاب هست یهود و نصارا خطاب به انها گفته میشه که در صورتی شما نجات میابید و در صورتی موفقیت مال شما شماست که به همه کتاب های خدایی و آسمانی عمل کنید هم به تورات، هم به انجیل و هم به قرآن که عمل به تورات و انجیل هم مستلزم عمل به قرآن هست تورات و انجیل هم دستور داده که به نبی خاتم ایمان بیاورند لذا شما ایمان بیاورید و عمل کنید و الله تعالی اینجا بیان می فرماید که شما هیچ جایگاهی ندارید تا زمانی که عمل نکنید قل یا اهل الكتاب لستم على شيء بر هیچی نیستید در هیچ جایگاهی نیستید هیچ ارزشی ندارید حتی تقیم التوراته والانجیل وما ما انزل الیکم من ربکم حتی که اقامه کنید برپا کنید یعنی کامل عمل کنید به تورات و انجیل و آنچه که نازل شده بواسطه حضرت رسول صلی الله علیه و وسلم به شما از جانب رب شما اما این ارشادات في پروردگار آیا تاثیر گذار هست آیا گوش شنوایی وجود دارد الله تعالی در ادامه از اناد یهود می فرماید ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل إليك من ربك تغيانا و یعنی این آیات ما انزل الیک من ربکک آیات قرآن مجید بجای ان کے باعث ایمان اونها بشه بجای ان سبب هدایت اونها بشه چون در وجود اونها اناد هست تعصب اصبح هست تغیان و کفرشون ان رمی افضاید سرکشی انها رمی افضاید ولی نه البته حتما حتما یعنی بدون شک می افزاید در بسیاری از اونها اون بسیاری کیا هستند همونهایی کی که ایمان ندارن اناد دارن می افزاید کی می افزاید فاعل ما انزل الیک من ربک قرآن می افزاید از نظر تغیان و کفر بر اونها اذا فلا تأس على القوم الكافرين یعنی بعد ظهور تعصب از سوی اونها شما حسرت نخور بر قومی بر چنین قوم کافری چوش نزن نگران نباش و بعد این الله عزوجل طریق نجات را بیان می فرماید الله می فرماید ان الذين امنوا ہمانا انحای کی ایمان آوردند والذین هادوا انحای کی یہودی شدند والصابئون و همچنین صابعون کسانی که صابی شدند و نصار کسانی که نصرانی شدند مدار نجات همه انها بر ایمان صحیح و عمل درست است بر نام نیست که بگه من چون یهودیم من چون پیروی ایسا من چون صابیم و من چون محمدیم نجات میابم این اونوان انسان را نجات نمیده اس انسان را نجات نمیده چیزی که انسان را نجات میده دو چیزه یکی ایمان یعنی عقیده درست دوم دو عمل صالح این آیت داشته باشید که در اینجا مدار نجات بیان شد اما منظور از این آیه چی هست؟ منظور از این ظابطه و قانون چی هست؟ اصلش اینه که هر یکی از این گروهها کل حزم بمالده هم فریحون هر یکی از این گروهها میگفت می که ما رستگاریم یهودی می گفت چون یهودیت هست همین عنوان یهودیت نجات میده. اگر آتشی باشد لن تمسن النار الا ایاما معدودات مسیحی میگفت که همین نسبت با عیسی نجات میده عیسی بدار زده شده کفاره گناهان تمام پیروانش است و بسیاری از مسلمانان امروز هم متاسفانه همین عقیده را دارا میگویند چون ما امت محمد صلی الله علیه و سلم همین نسبت کافیه هیچ عملی اگر نباشد همین نام همین عنوان در حالی که هیچ کسی را لغبش عنوانش نامش نجات نمیده هر کسی را که نجات بده دو چیز یکی ایمان یعنی عقیده صحیح نسبت به خدا توحید یکتا پرستی و دوم عمل صالح در باره عمل صالح خدمت شما عرض بکنم عمل صالح یعنی چه عمل صالح به اون عملی میگویند که مطابق شریعت همون زمان باشد مطابق شریعت درست در گزشت بر اساس تورات هر کسی عمل میکرد اون عمل صالح بود در زمانی که قرآن ناظر شده هر کسی بر اساس تورات عمل بکند او عمل صالح نیست اون را قرآن میگه گه وَلَا تَتَّبِعُوا شیاطین یا ایوه الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات شیاطین حالا در این زمان عمل صالح اینه که مطابق شریعت محمدی علی صاحبها الفتحی عمل بشه اگر کسی بخواد مطابق شریعت موسوی عمل کند مطابق شریعت ایسوی که او منسوخ شده این عمل صالح نیست این وحدت ادیان از این آیه ثابت نمیشه از این آیه رد میشه بعضی میگن که وحدت ادیان هر دینی به خود به هر گروهی به دین خودش به شریعت خودش عمل کنه نه خیر و, و عامل صالحا تعریف عمل صالح اینه که مطابق شریعت و کتاب همان زمان باشد در گذشته تورات کتاب هدایت و رحمت بوده امروز تورات منسوخه علاوه از اینکه تحریف شده اگر تحریف نمی هم منسوخه ای میشه که کسی بر شریعت گذشته عمل بکند و بگه که بالاخره ناجی هست.الهیا زوالله امروز میشه کسی با خاورش ازدواج بکنه بگه که چون در شریعت گذشته بوده دو تا را یک جا در عقد بکنه بگه چون در شریعت گذشته بوده نه عمل ساله اونه امروز اگر اون کار بشه اون الحاد است. کسی اون اعتقاد را داشته باشد با توجه به که قرآن میگه حرمت علیکم امهاتکم و اخواتوكم حالا اون اعتقاد را کسی داشته باشد کفره پس عمل صالح اونه که مطابقی چی باشد شریعت اون زمان باشد این شرط. پس و عمل صالحا از این عمل صالح وحدت ادیان رده وحدت دین هست همه در اصول یکی هستیم اما در فرو باید مطابق نبی خاتم باشیم در شریعت و صابئون چه کسانی هستند هادو مشخصه یهودی ها و نصرانی ها صابئون در رابطه با اون چون وجود صابی ها نیست سبات جامیش است وجود سبات وجود نیست به این خاطر در تعریف آن علماء خیلی اختلاف دارند اصلش اینه بعضی میگوند حالا معروف است که صابی به کسی میگن که از داود علیه و السلام میکنه اصلش اینه که ببینید برای همه یهودی ها تورات نازل شد کتاب شریعت چی بود؟ تورات بود احکام بود شرائع وظائف حلال حرام جائز ناجائز کتاب زبور که بر داود علیہ السلام نازل شد کتاب مدح است کتاب سناح است کتاب مناجات است اوصاف رب العالمین است اوراد است اذکار است کتاب حلال و حرام نیست لذا کسانی که متبع داود بودند در شریعت از تورات شریعت میگرفتند احکام را از کجا میگرفتند تورات میگرفتند اما به عنوان دعا و ذکر و ورد و مناجات زبور را میخواندند بعضی چیکار کردند بعضی به خاطر اینکه فرار کنند از تکلیف فرار بکنند از اینکه بالاخره به شریعت عمل بکنند گفته الان که زبور آمده ما به زبور عمل میکنیم به طورات عمل نمیکنیم فقط همون دعا و مناجات را میخواندند به حلال و حرام کار نداشتند به احکام کار نداشتند لذا اینها را یهودی ها گفته اینا صابی شدند یعنی از دین خارج شدند به همین خاطر در زمان مشرکین هم یاد گرفته بودند از یهودی ها وقتی که مسلمانان دین شرکی را ترک کردن دو مسلمان شدن میگفتند که صابی شده به رسول الله میگفتن صابی شده یعنی از دین خارج شده. پس اینکه در تفسیرها شما میخواانید صابی به کسی گفته میشه که از دین خارج بشه. این هم درسته اینکه گفته میشه صبی به کسی گفته میشه که بر زبور عمل میکنه این هم درسته. اونا از دین یهود خارج شدن به همین بهانه که ما به زبور عمل میکنیم در حالی که این دستور نرسیده بود دستور داشتن از تورات احکام را بگیرند شریعت در تورات بود ولی اونها زیاده روی کردن علی ای حال اسمشون صابی بود الله میفرماید متبع همه این انبیا چه زمانی نجات میابند من امن بالله و الیوم الاخر هر کسی ایمان بیاورد به و به معاد و به خدا و روز آخرت و عمل صالحا و عمل صالح بکنن مطابق شریعت همون نبی زمان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هیچ خوفی بر آنها نیست غمگین هم نخواهند شد بر ترک دنیا در رابطه با آخرت لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسولا الله تعالی اینجا سرزنش میفرماید عتاب عطاب بیان می بر بني اسرائیل که شما هر پیامبری که آمد از طرف خدا بود به اون ایمان به بشریتش عمل بکنید اما وقتی که نبی خاتم آمد عمل نکردن لقد اخذنا میثاق بني اسرائیل همانا ما پیمان گرفتیم از بني اسرائیل در تورات و ارسلنا ایلهم رسولا بعد از اینه دومی ما مابیشuye اونها پیامبران را فرستادیم اما کلما جاهم رسولم بهمالته و انفسهم هرگا پیش آنها میامد رسولی بر اساس اون چیزی که خواهش نفس اونها نبود یعنی بر خلاف ملی اونها میامد فرقان کذبو یک اون پیامبران را میکشند تکذیب میکردن و گروهی دیگر میکشند یعنی این که رسول الله را تکذیب میکنند قبل از این اینها انبیا را هم تکذیب کردند هم کشتند چون که اینها بنده هوای نفس بودن و حسب او تکون فتنه فکر میکردند که هرگز از سوی الله برای ابتلای ابتلاء نخواهد آمد یا ازاب نخواهد آمد, آمد فتنه هر دو است. فعم و صم فعم یعنی هم نابینا شده هم کر شدن هم بینایی را از دست دادند هم شنوائی را یعنی منظور اینه که اونها ترک کردن عمل بطورت را چشم و گوش را بستند ثم تاب الله علیهم سپس خداوند بر اونها رجوع کرد رجوع خدا چیه؟ که ایسا را یعنی دوباره پیان بری فرستات ثم تاب الله عليهم، حین تاب و آمن بی عیسی. دوباره توبه کردن ایمان به عیسی وردن اما ثم عمو وصمو کثیر منهم سپس عمو یعنی دوباره کوری را انتخاب کردن, دو کردن دو و اختیار کردن و کری را بسیاری از انها یعنی وقتی که محمد صلی اللہ علیه و سلم آمد دوباره انها همین را اختیار کردند والله بسیر بما یعملون اللہ تعالی بسیر و بیناس با اون چیزی که انها عمل میکنند لذا انها هر بار برای نجات انها اللہ تعالی تدبیر فرمود انها چشم و گوش بستند نخاصن هدایت الهی دا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم همانا کفر کردن کسانی که این فتوی کفر آشکار است بعضی از مفسرین میگند این در بلغما انزل الیکا که شما در اول رکوع خاندید داخل است یا ایو الرسول بلغ ما انزل من ربک هرچه نازل میشه برسان و این هم برسان که لقد کفر الذین این عقیده عقیده کفر است کدام عقیده عقیده عینیت و عقیده تسلیس مجددا عقیده را آورده یکی عقیده عینیت را که ان الله هو المسيح ابن مریم و یکی عقیده تسلیس ان الله ثالث و ثلاثه من خدمت شما عرض کردم که این عقاید را یهودی ها آوردند یکی از علماء یهود بود قبلا هم خدمت شما گفتم ابتدا اسمش ساول بود ساول این یکی از دشمنان سرسخت مسیحی بود و منفورترین چهره در میان یهود با حوارین ایسا مبارزه می‌کرد بعد از رفع ایسا تا اینکه یه روزی صبح از خواب بیدار شد قطعاً به دلش رسید شیطان نشانش داد که به این صورت مبارزه بکنه با دینی. ایسا علیه و سلام از خواب بیدار شد و اعلام کرد که من مسیحی شدم چی شده گفت من در خواب دیدم در مسیر شام بودم در مسیر بیت المقدس بودم که نوری ظاهر شد بعد از اینکه نور ظاهر شد ایسا ظاهر شد و ایسا از من گلایه کرد که چرا تو با دین من این همه دشمنی میکنی و من در یافتم که دین ایسا دین به حق است لذا من اعلام میکنم ایمان خودم را به دین مسیحی به دین ایسا حوارین هیچ کسی قبول نکردند باور نکردند چون دشمنی و عداوت قبلی او را دیده بودند اما یکی از حوارین که قبلا اسمش را هم خدمت شما کردم باراباس معروف بود. ایشون گفت که ما قبول میکنیم وقتی که آمده به دین ما به عنوان یکی از مسیحیان بقیه شک داشتند که این آدم نخشهی داشته نباشید چون از قبل عداواتش معروف بود بعد از اون پذیرفته شد بعدا این سال اسمش را هم عوض کرد چون در دین مسیح آمد همون پولس که معروف است. اسمش را پولس گذاشت و آمد تبلیغ کردین عیسی را و کم کم این مسائل جدید را که در دین عیسی اختلاف ایجاد کرد از به شرک آمد از شرک باز چندین نوع ساخت عینیت را ابنیت را تسلیس را همه اینها این بیچاره و این بدبخت است لذا الله عزوجل می فرماید بعد از اینکه ان كفريات آمده ان كفر اعلام كن لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم كفر کردن کسان اكي قفتن الله ان مسيح ابن مريم حصل در حال اكي خود مسيح چي قفت تبلیغ مسير الله اینجا نقل مفرمات دلیل نقلی از ایسا وقال المسيح يا بني اسرائيل مسيح قفت اي بني اسرائيل اعبدوا الله ربّي وربكم فغت وفغت الله را عبادت كنيد ان الله رب من ورب شماس ان من يشرك بالله اما ناشان انس کہ ہر کسی در الوهیت شریک سازد کس رب الله فقد حرم الله عليه الجنه همانا انا اللہ حرام کرد دے بر او بہشت را و ماواہ النار وجایگاش آتش اس و مال الظالمین من انصار برای چینی ظالمینی هیچ یاورانی نیست اینها محرومند از هر نو سفارش و شفاعت ان این مسئلے عینیت بود و همچنین لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه همانا گفت کردند کسانی که گفتند الله از زواجل از سومی هست از ستا سومی هست یعنی ستا تا اله وجود داره یکی ایسا یکی مریم در گذشته میگفتند مریم امروز نمیگویند اونهایی که در زمان گذشته بودند در زمان قرآن بودند ایسا مریم و الله امروز میگن عیسی روح القدس الله یعنی بعضی جا اختلاف دارند که خدا است و مایه مریم هست یا روح القدس البته علما ما کت مطالعه دارن بر مسیحیت مینه امروز همه مسیحیان همه عقیده روح القدس را دارن عقیده مریم را ندارن اما قرآن همین میگه که در گذشته ایمان داشتن چون الله تعالی می فرصت انت قلت للناس اتخذوني و ام يا اله من دون الله، وما من إله إلا إله واحد. نيس، هيج ما عبودي ما جر ما عبودي واحد. سفان نيس. الله تعالى يفرمده، وإن لم ينته عما يقولون، أجر بازنة يعني انها از آن تكيم يجي يند. تفسير جلالة يقول من التسلس، از أقيدة تسلس بازنة ياي يند، لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. البته حتما حتما میرسد به کسانی که کفر کردن از آنان عذابی دردناک افلا یتوبون الی الله و یستغفرون ترغیب توبه است بعض هم برگردید واقعیت را میدونید آیا توبه نمی رجیو رجوع نمی سوی الله از عقاید کفریه و استغفار نمی خان به خاطر اشتباحات شون اگر این کار را بکنم بگیم مقتزی توبه وجود دارد والله غفور الرحیم الله عز و جل بخشاینده و مهربان است بعد از این الله تعالی دلائل بیان می فرمید. دلائل نفی الوهیت، دلایلی که عیسی اله نبود مادرش اله نبود اله یعنی بینیاز کسی معبود می‌تونه باشه که نیازمند نباشه اینا نیازمند بودند اینا غذا می خوردند گرست نمی تشنه می شدند نیازهای انسانی داشتند آیا یک محبود میتونه نیاز داشته باشه اینا دلیل احتیاج اصلا همین تولد و تناسل مادر بودن و فرزند بودن و اینا دلیل نیاز هستن پدر بودن اینا دلیل نیاز هستن به همین خاطر الله تعالی اینها پاک اسلم یلد ولم یولد پس الله عز و جل دلیل اقلی بر اثبات نفی الوهیت عیسی و مادرش بیان می‌فرماید مل مسیح ابن مریم الا رسول رد هم مسیحیت است هم رد یهودیت است گورا رسول نمیدانسان مل مسیح ابن مریم الا رسول نبود مسیح ابن مریم مگر رسول بود نه الٰه و نه فرزند خدا قد خلت من قبله الرسل اگر خارق العاده دیدید موجزه بود و گزشته قبل از رسول دیگه هم گزشته موجزه داشتند و امه صدیقه مادرش یک زن صالحی صدیقه بود نه اله بود نا جزه اله نا حمسره الله علیه عزوالله کانا یکولان الطعام هر دو مادر و فرزند غزامی خوردند یعنی انسان بودند انسان بودند، بشهر بودند. بحث قضای مریم گزشت در سوری علی امره انا لکه هذا قالت هو من عند الله انظر كيف نبیین لهم الآیات الله ای فرما ببین ای مخاطب ای محمد صلی الله علیه و صلی چگونه ما واضح برای اونها بیان میکنیم آیات را برای نفی الوهیت ایسا این تعجب اول استعجاب اول اما بعد ببین تعجب دوم ثم منظور ان نا یفکن ببین کدام سمت و سو به انحراف کشیده میشن بعضم قبول نمی کنن بعضم انکار میکنن ادعای الوهیت میکنن و الله میفرماید شما این هر ای میکنید اینا اخه مالک نفع و ضرر نیستن خود عیسی به خدا پناه برد میخواستن به دارش بزنه خدا پناه اجداد خودش مالکی نفع و ضرر نبود. خودش نیاز داشت به حوارین گفت من انصاری الالله من یاری میرساند کما کم می قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرن ولا نفعا بگو آیا شما عبادت می کنید بجز الله. آن معبودانی آن هستیها را که لا یملک لکم مالک نیستن برا شما مالک نفر زرر و نف نمی زرر ضرر را شما دفع کنند حتی از خودشون نتوانستند نمی توانن برای شما نفر را جلب کنند والله هو السميع العليم و هم علم غیب ندارند فقط الله اس که هر سخن را شنوا هر حالت را دانا السمیع لکل شئی العلیم و بکل الله است غیر از الله نیست عیسی را صدا میزنی از کجا میشنود از کجا خبر دارد از حالت عیسی که عالم الغیب نیست غلوب نکنید افراد نکنید بندگان خدا را به انها جایگاه خدایی ندهید اشکال بزرگ مسیحیان همین بود همین کاری که بعضی از افراد این امت متاسفان امروز انجام میدند باید انبیاء را دوست داشته باشیم به خصوص سید الانبیاء رسول الله صلی الله علیه و را ایمان به رسالتش داشته باشیم از تمام سیرت و زندگیش اش بکنیم کنیم اما در رابطه با محبت غلو نکنیم به جایگاه خدایی ندیم به بی اهل بیتش اهل بیت رو باید دوست داشته باشیم محبت داشته باشیم ایمان ما بیت باید بالاخره جزء ایمان ما باشد و بغض با اهل بیت کفر باشد اما نه اینکه به آنها به سيدنا علی جایگاه خدایی بدیم و در ردیف اعلی قرار بدیم نه هر یکی جایگای خودش را غلوف هر کسی را از جایگاه خودش بالاتر الله می قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق بگو ای اهل کتاب شما غلوف نکنید در دینتان یعنی در تعظیم ایسا و مادرش غیر از حق غیر از حق چیزی نگوید ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وفيرى فينا كنيد از خیالات فاسد خواهشت یعنی افکار افکار انحرافی انحرافی قومی که قد ضلوا من قبل خودشون از قبل گمراه بودند یعنی اسلاف شما که یهودی ها باشن آمدند و بعدا آمدند اظهار کردند دین مسیحیت را و اضلوا کثیرا و بسیاری را کردند و ضلوا عن سواء السبیل و گمرا شدند از راه میانه از راه اعتدال از راه توحید ببندگان خدا جایگاه الوهیت و معبودیت دادند نا فرات. دنبال نکنید کنید را اینجا الله تعالی از دو چیز من فرموده یکی از غلوب، از افراد و دوم از اتباع ائمه مظلین. خوب دقت کنید. پیشوایان قمبرا مثل همین ساول یا پولس خودتون هم افراد نکنید به عیسی جایگاه خودش را بدهید. جایگاه عیسی چی بوده رسول الله بوده. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الرسول إبحيانبري أسفيانبران إلهي وبعد إن هاي كي سلف شما كي آمدن وبعدها جازدن خودشون ربع عنوان مسيحي مثل همين فرد قمرا شما, شما أز إن أئمين مزلين اتباع ناكنيت بلكي شما أز كتاب خدا بيرا فيه بكنيت تبعيات بكنيت وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل هلان تخويف الدنيا بكسانيك امل لكنا كسانيك بكفر الشرك إذا ما بدهند ومنكرات رأى إذا ما بدهند إنها مورد اللعنة ستند. مورد اللعنة خدا ومورد اللعنة دوستان خدا بلخصوص دو پیانبر اینجا نام برده ایک سیدنا داود ایک سیدنا عیسی وقتی که قومشان تعدی کردند تجاوز کردند از حد و حدود الهی گزشتند این ها دعای بد کردند الله فرماید لعن الذين كفروا من بنی اسرائیل کسانی که کفر کردند از اس بنی اسرائیل مورد لعنت قرار گرفتند ملعون شدند به زبان دو تا پیغمبر علالسان داود و عیسی ابن مریم بر زبان داود و عیسی ابن مریم وقتی که یهودی ها در روز شنبه که من شده بودند از شکار ولی حیله بازی کردند و با هیله شکار می کردند چون از سیدنا داود حرف شنوی نداشتند سیدنا داوود چی دعا کرد اللهم مل عنهم و جعلهم آیا اللهم مل عنهم و جعلهم آیا خدایا انها را لعنت کن و نفرین کن و درس و عبرتی از اینها بساز یه درس باشند یه آیه باشند یه نشانی برای عبرت باشند چرا؟ چه الله تعالی انها را تبدیل به میمون کرد جعل منهم القرده و عیسی سلام السلام تو وقتی که تمرد کردند سرکشی کردند عیسی بر علیه دعای عیسی بر علیه اصحاب مائده بود در همین سوره می‌خونیم بعد از اینکه مائده نازل شد و باز هم کفر کردند فرمود اللهم لعنهم كما لعنت اصحاب السبت اللهم لعنهم كما لعنت اصحاب السبت اون وقت خدای تعالی بنی اسرائیل را خنزیر قرار داد جعل منهم القرد تول خنازیر اشاره به همین هست الله می فرماید ذالک بما عسوا و يعتدون مرض اولشان عسیان یعنی کفر مرض دومشان شرارت و کانو یعتدون نافرمانی کردند و تعدی و تجاوز می اما یعتدون تفصیل تجاوزیه کانو لا يتناهون عن منکر يرفعلو این بالاخره ادامه اون تعدی هست ادامه اون کفر هست کانو لا يتناهون ابودن که باز نه می از منکری که انجام میدادن یعنی منکر اصلا شده بو شغل اونها لبه سما کان بسیار بد هستند اون چیزی که اون اونها عمل میکردند اون کاری که اونها انجام می دادن بسیار بده حالا ببینید جالب اینجاست که همین انسانها که ملعون انبیا بودند مورد لعن انبیا بودند و خدای از و هم از اونا چه چه ساخت چی درست کرد حالا گروهی میم با اینها دوستی می منافقین منافقین است. منافقین با این ها هنوز الان دوست میشن ترا <تصفيق> کثیرم منهم یتولون الذین کفروا می بینی بسیاری از انها را که دوستی می با کسانی که کفت کردن لبئس ما قدمت لهم انفسهم بسیار بد هست آن چیزی که قبلا انجام داده اند قدمت لهم انفسهم تقدیم کرده برا انها دستاشون یعنی انها کاری که انجام دادم بسیار کاری بدی اون چیه ان سخط الله علیهم به سبب اینکه الله بر اونها خشم و غضب فرموده و فی العذاب هم خالدون اونها در عذاب همیشه میمانند الله تعالی میفرماید که اینهایی ای که با اونها دوست میشوند اینها ایمان ندارند و ایلا اگر اینها ایمان داشت چون منافق ایمان نداره اگر اینها ایمان داشتند با اونها دوست نمیشدن ولو كانوا یؤمنون بالله والنبي اگر اینها ایمان می آوردن به خدا و نبی خدا و ما انزل الیه الی آن چیزی که نازل شده به سوی نبی اگر اینها ایمان به قران داشتند متخذوهم اولیاء انها را به عنوان دوست صمیمه انتخاب نمی کردند اما دوست انتخاب کردند به دلیل اینکه ولیکن کثیرا منهم فاسقون از این منافقین فاسقند یعنی استعاده خدا خارج شدند از فرمان از خدا خارج شدند از حد و حدود الهی خارج شدند فسق همینه و اللہ تعالی اینجا بیان می که این گروه گروه یهود و مشرکین اینها بدترین دشمنان شما هم هستند چقدر با شما اداوت و دشمنی دارند این اداوت و دشمنی می طلبد که هیچ وقت با انها دوستی نکنید لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا. البته حتما حتما بدون شک میبینی مي می مي یابی اشد الناس سخطرین مردم سخترین کافران را از نظر دشمنی برای مؤمنین یهودی ها را میبینی و مشرکین را میبینی از همه بیشتر يهود مشرقين بعد مسلمانا دشمانان اليهود والذين اشركوا اما ولتجدن اقربهم مودة ميا بيك نزدیکترين افراد از نظر مودة دوستي للذين آمنوا نسبت به مسلمانان الذين قالوا اننا نصارا چه كثاني هستن هاي يكي ميگن ما نصارا هستي انها از نظر دوستي از همه نزدیکترد بشتر دوستي دارند ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ترى انها دوستان چون کہ درمیان انها قسيسين است علما بعضی میگن قسیسین علم دوست بعضی میگه القسیس هو رئيس النصارى في العلم بزرگترین عالم ایشون عالم ایشون را میگن درمیان انها علما و رهبانان و تارکان دنیا هست دراویش و علت اصلین که و انهم لا یستکبرون اینها تکبر نمیکرن ببینید از اینجا ای چیزی که برداشت میشه برداشت ظاهری اینه که یهودی ها بد جور با مسلمانان دشمنان مشرکین هم خیلی دشمنند. اما مسیحیان دشمن نیستند در حالی که ما بینیم دشمنی مسیحیان هم کمتر از یهودی ها نیست در طول جنگ ها نگاه کنید جنگ های سلیبی که اتفاق افتاده با مسلمانان تاریخ را نگاه کنید بر مسلمانان رحم نکردند اینها بس معنیش چیه؟ بعضی از مفسرین نوشتند که این مسئله برمیگرده به مسیحیانی که در زمان رسول الله بودند. در هر زمانی طبیعت فرق میکنه عادت و روحیات متفاوته. اون مسیحیان این تعصب را نداشتن که این مسیحیان دارند. مسیحیان بعدی. مسیحیان بعدی هیچ فرقی و تفاوتی با یهود ندارد. اما اون چیزی که بعضی از مشایخ و اساتید ما نوشتن به نظر اون درستر در میاد این در رابطه با مسیحیانی که هنوز مسیحی هستن نیست این آیه در رابطه با مسیحیانی هست که ایمان آوردند چون بعد میخانیم و اذا سمیعو ما انزل الى الرسول ترا اعیونهم تفیض من الدمع همین مسیحیان را میفرماید که هر وقتی که قرآن را گوش می کنند، چنان متاثر می شوند که اشکشون جاری میشه. و اعلام می کنن ربنا آمن پس مراد از این مسیحیان نه مسیحی که هنوز مسیحیه، اون مسیحی که قبل مسیحی بود الان مسلمان شده. چرا؟ چون در رابطه با ما سمعو ما انزله الى الرسول ما چند روایت داریم یک روایت اینه که وقتی که مسلمانان هجرت کردن به حبشه رفتند مشریکین مکه اونجا فرستادن فرستادگان خودشون را که اینها را جا ندید نجاشی جمع کرد احبار را روحبان را علماء را جمع کرد میخواست که بدونت حقیقت این دین را همه جمع بشن بشنوند مسلمانانی که اونجا پناه برده بودند امیرشون حضرت جعفر رضی اللہ تعالی بود جعفر ابن عبی طالب پسرموی رسول اللہ جعفر تیار که بعدن شهید شد جعفر را گفتند که این کتابی که شما داری چه کتابیه؟ جعفر رضی اللہ تعالی سور مریم را برای اونها خواند، سور مریم را که خواند، تمام احبار و رهوانی که اونجا بودند بی اضافه نجاشی بی اختیار اشکاج جاری شد لذا بسیاری معتقدند که این آیات در رابطه با نجاشی و احبار و رحبانی که ایمان آوردند درباره اونهاست. انها است صحیح ترین قول هم همینه صحیح ترین روایت هم همینه حالا روایت ها دیگر هم ممکنه که اینها هم این آیه قرار بگیرند. گاهی یک آیه چندی مصداق داره یک روایت دیگری هست که حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ در همون روزا که روز رسول الله از مکه به مدینه نرفته بود 20 نفر از حبشه را به مکه آورد و اینها کلام الهی را از زبان خود رسول الله شنیدند آن حضرت صلی الله علیه وسلم سلم سوره ای را که سوره ملک بود غالبا خاند اینها گریه میکردند و روایت دیگری هست که زمانی که رسول الله در مدینه تشریف داشتند، جعفر هفتاد نفر عالم مسیحی را به خدمت رسول الله آورد که شست نفر از حبشه بودند از نزدیکان نجاشی و هشت نفر از مسیحیان شام بودند آن حضرت صلی علیه و سلم برای اونها خواند، اونها گریه کردند بالاخره پس معلوم میشه نه اون مسیحی که هنوز مسیحی منده اون خدا میگه که این با شما نزدیک هستن نه اون مسیحیان مراد هستن که چی ایمان آوردن لذا اللہ میفرماید و اذا سمیعو ما انزل الى الرسول هرگا این همیش میشنوند آن کتابی را که نازل شده سوی رسول ترا هم این تأثیر قلبی هست قلبم جنا متاثر که ترا اعینہم می بینی چشمای اونها را تفیض من الدمع جاری میشه از اشک مما عرفوا من الحق بسبب ان کہ می شناسند حق را میدان کتاب کتاب حق است پس نا مومنان ان تاثیر قلبی این تاثیر قولی یقولون ربنا آمنا می بار الہ ما ایمان آوردیم فاكتبنا مع الشاهدین مارا هم با گواهان محمد صلى اللہ وسلم هم شهداء على سائر الامم یوم القیامة جن ان امت امت قواهی هست کذلک وسطا شهداء على الناس وما لنا لا نؤمن بالله چرا ما وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ چی شده ما ایمان نیاوریم به خدا و ما جا من الحق آنچه که آمده پیش ما به رسول خاتم پیش ما از حق و نطمع ما ایمان نیاوریم و نطمع ما تمعداريم توقع داريم أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ربما مارا داخل بقردانت حمرابا قوم الصالح ما هم جزي صلحاباشين ما انتبع را داريم انتوقع هز ربمون داريم انتوقع راكي انها اظهار داشتند الله تعالى دعائشون را قبول کر اللہ انها را جز سالحین قرار داد فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بما قَالُو بِأُنها عطا فرمود اللہ جزائن آیت فرمود اللہ بسبب آنچه که گفتند قالو مع اعتقاد نه مثل منافقین بدون اعتقاد اُنها هم گفتند بدون اعتقاد گفتند گفتند جنات این تجربی چیزی بیوند داد، اصحاب هم جنات، بیونا عطا فرمود جناتی که تجربی من تحت آنها رو خالدی فیها جناتی که زیر قصور و درختاش نهراق جاری هستند همیشه است. و ذلک جزاء المحسینین، این هست جزای مخلصین. اینها مخلص بودن منافق، نبودن کسی که اصلی قلب و با اخلاص ایمان بیاورد. اناس اما کسانی که مثل يهودها ها بمانند بر کفرشان والذین کفروا وکذبوا بایاتنا کفر کنند و ما را تکذیب کنند اولئک اصحاب الجحیم انها اصحاب الجحیم مال جهنم است خب إن بحث, بحث يهود پذیرش دعوت بازی از سوی بعضی از علما مسیحی و پاداش نیکشون که الله تعالی بیان فرمود حالا از اینجا برمیگردیم به اول سوره اول سوره بحث نفی شرک فعلی بود الله تعالی مجدد شرک فعلی را نافی میفرماید یکی از صورت های شرک فعلی این بود خدمت شما عرض کردم که چیزی را که خدا حلال قرار داده و خداوند طیب قرار داده، پاک و پاکیزه قرار داده، مثلا گوشت شتر، شیر شتر، به خاطر خشنودی باطل، او را برخود حرام قرار دادن. یعنی حلال خدا را برخود حرام قرار دادن. چرا؟ به خاطر این هست تحریم لغیر الله این خود الشرک لذا الله تعالی انجا نحف می فرما این شرک را یا ایوها الذین آمنوا ای کسانک ایمان آوردید لا تحرمو طیبات ما احل الله لكم شما حرام قرار ندهید انجا امام رازی نوشته نا اعتقادا نا قولا نا عملا حرام قرار ندهید پس حرام درست نیست برای ما چیزی که کسی به ما میگه بخورد. دمون نمی یاد بگییم نمیخوریم. بعض میگن حرام بر من این تحریم قولی هست. کسی که تحریم بکند این نوع سوگند حساب میشه. لا تو طیبات ما حل الله لكم از مال های پاکیزه که خدا حلال قرار داده برای شما ولا تعت تجاوز نکنید از حدود شرع. چه مسئله بینویسید در مسئله تحلیل و تحریم چیزی که خدا حلال قرار داده حرامش نکنید چیزی که خدا حرامش کرده حلالش نکنید تجاوز نکنید ان الله لا یحب المعتدين خداوند را ردوست ندارد و كلو مما رزقكم الله حلالم اینکه اينکه فرمود که شما حرام نکنید من اشیا یعنی املا بخورید و کلیمی ما رزق الله بخورید از آنچه که الله به شما رسدد حلال و طیب همه اونها رحلال بدانید هم پاکیزه و اتقل الله الذي أنتم بهی مؤمنون اینو سخی عمل است میخواد عمل کنید تقوه بترسید از الله الذي ان الله كي به مؤمنون اي مقتزي التقوى چون ما به خدا داريم اين ایمان ميطلبت با تقوا باشي لا ياخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اليمان چطور بعد از تحريم بحث قسم آمد خب يكي از صورتهاي تحريم كي انسان حرام ميكنه با قسم قسم یاد میکنه نمیخورم یا میگه برمن حرام است این خودش ارز کرده میگه چیه حلفی حساب میشه لذا الله تعالی اقسام حلف را اینجا به تبع اون بیان میفرمد پس ارتباط داره بدون ربط نیست اما قسم همون طور که قبلن خاندیم سنو هست یکی قسم لغب قسم الله اینکه اونجا قصدی نیست چون قصدی نیست برای دروغ گفتن و خلاف گفتن گناهی هم نیست حالا دو صورتش را گفتن یکی اینکه انسان بدون اختیار لفظی والله بر زبانش باشه. محمولا عرب ها تا می دیدن هم میگفتن والله هذا حلال کسی اونها را سوگن نمیداد ولی خوب عادت کرده بودند بعضی میگن لغو همینه بی اختیار لفظ قسم بر زبان باشه اما بعضی میگن نه لغو اینه که انسان به چیزی که قسم میخورد مطابق اعتقادش قسم میخورد فکر میکنه این مسئله اتفاق افتاده در حالی که در واقع اتفاق نیفتاده خب این انسان به گمان خودش دروغ نگفته ولی خب خبر نداره داشته قسم خورده بعضی میگن این لغو میگن این دو تا تعریف برای لغم هست اما دومی یمین منعقده هست منعقده این هست که انسان بر در آینده قسم می خورد برای آینده که فلان کار را می کنم یا فلان کار را نمی کنم اگر خلاف قسمش انجام بده بر او کفاره هست مثلا میگه فلان کار را انجام می دهم اگر انجام نداد کفاره هست. اگه میگن انجام نمیدم و انجام داد کفاره هست. خب در این رابطه هم هیچ اختلافی نیست. اما سومی هست یمین قموز که بر در رابطه با گذاشته دروغ قسم میخورد. کاری را انجام داده ازش میپرسند تو انجام دادی؟ این شعر را تو برداشتی میگه نه. بیا قسم بخور بیا قسم میخوره دروغ قسم میخوره خدا را شاهد میگیره این یمین غموس هست گناهش بسیار سنگین است خدا معاخذه میکنه و از نظر احناف این دیگه همون گناه اخروی هست و در دنیا هم اثرات سوئی بر زندگیش مرتب میشه کفاره دیگه نداره کفارش فقط توبه است توبه بکنه و اصلاح بکنه بگه من به دروغ قسم خوردم من انجام دادم اما امام شافی رحمت الله علیه می فرماید این کفاره داره کفارش رو بده الله می فرماید که لا یاخذکم الله باللغو فی ايمانکم اللہ مؤاخذ نمی فرمای شما را با لغوی در قسمها ولکن یو آخذکن بما عقدتم ال ایمان اما شما را مواخذ می اون چیزی که عقدتم ال ایمان قسم شما بر اون بسته شده یعنی در رابطه با آینده واقعات آینده وقتی که قسم را شکستید فکفارته اطعام و مساکین من اوسط ما تطعمون اهلی کم کفاره آن تام دادن ده طعام مسکین هست از تام متوسطی که شما به اهل عیالتوم میدید میدین ده مسکین را تام بده یعنی یک, یک روز تام بده ده. در یک روز متوسط چند وقت ازا میخوریم دوبار یعنی ده مسکین را شام و نعار این یک اینجا تخییر است یعنی اختیاری چون را انجام میدید او کسوتهم یه دا مسکین را لباس بده او تحریر رقبه یا یک غلام آزاد کن یا یک غلام آزاد کن این کفاره هست. فمن لم یجد فصيام ثلاثه ایام هر کسی نیافت روزه سر فیم روز است ما وظیفه میفهمین سر روز پی باشه چون تا روزهای بیشتر 60 اگر کار که سیام ستین شش روز اونجا متعابیات از این به طریق اولا. دلیل کفارت ایمانیکم این کفاریه قسم های شما وقتی قسم میخورید و حفظ ایمانکم قسمتون را حفظ کنید. قسمتون را حفظ کنید یعنی چی؟ دو تا تفسیر گفتند دو معنا گفتند. اولین که کسی که قسم میخوره بر اون ثابت بماند قسم را نشکند. مگر اینکه غیر شرعی باشه اون قسم رو بشکند مثلا قسم میخوره با پدرم قهر میشم صحبت نمیکرم این بشکند اما غیر از این قسم خود قسمش رو حفظ کنه نشکند نام خدا رو نباید زایه کند و بعضی میگن نه حفظ قسم اینه که از ابتدا قسم نخورد تا بشکند یعنی ولا تحلف اسلم اصلا قسم نخورید این افزش است وحفظوا ایمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون این گونه الله تعالی بیان می‌فرماید آیات را برای شما تا شما بندگان سپاسگزاری باشید از بخدمت شما که بعد از بیان تحریم لغیر الله چون تحریم بود چیزی را حرام نکنید خدا وقتی که حلال کردش شما حرام نکنید بعد از اون الله تعالی حرام دیگری را باید میفرم اون که نظر برای غیر الله باشد مثلا بر نمادهای شرکی حیوانی برده میشه کشته میشه این حرام است. بر اون تیرهایی که بر آستانه ها بودند تیرهای مخصوصی که قرکشی میکردن به وسیله اون قرعه انها را الله به می که آنها حرام هستند علاوه از این خمر و میسر اینجا حرمت شراب و قمار هم بیان شده این هم حرامه این سومین آیه‌ای هست که در رابطه با حرمت شراب و قمار نازل شد که در این آیه حالا چرا الله تعالی یک بار نازل نفرمود تدریجم چون که خیلی با شراب خوب گرفته بودند جزء لا یفک زندگی شده بود و نقل هر مجلس بود بنابراین این حکمت این را تقاضا کرد که دستور تدریجی بشه اول تنفر ایجاد بشه دل نسبت به اون دور بشه بعدا نازل بشه حکمش بعد از اینکه نازل شد الله عزوجل با چه صراحتی و باشه کلماتی اینجا کلماتی که در رابطه با حرمت شراب هستند و کلماتی که در رابطه با حرمت قمار هستند این کلمات قابل توجه هستند. بلخصوص کسانی که هنوز خودشون را مسلمان مینامند و میدانند و هنوز دست نمیکشند از شراب و هنوز قمار بازی میکنند. اللہ می فرماید یا ایھا الذین آمنوا ای کسانی کی ایمان آوردید انما الخمر والمسیر والانصاب والازلام یکی از شناعتای بزرگ شراب اینه کہ شراب را و قمار را اللہ تعالی در ردیف چیزهایی که شرک به خدا و کفر استن قرار داده انما الخمر والميسر والانصاب والازلام جزی نیست که شراب و قمار و همچنین کشتن بر آستانهای غیر الله بر نمادهای غیر الله والازلام و همچنین تیر تیرهای که بر ارس کنم مزارات بود بر نمادهای شرکی بود قرآنهای که اونجا بود اللہ می فرماید رجس من عمل شیطان اینها رجس هستند نجس هستند پلید هستند از عمل شیطان هستند اینها را اللہ نجس فرموده واقعا چیزی که در آن شرک باشد هم نجس هست انما المشرکون نجس و شراب هم نجس است. حتی شراب اگر بر لباس بخورد لباسی میشه شه ناپاک میشه. رجسم من عمل الشیطان ببین اولین چیز که الله نجس فرموده دوم دو اینا رو عمل شیطان فرموده سوم فجتن بوو صراحتن الله می فرماید از اینها اجتناب کنید از اینها دوری کنید لعلکم تفلحون تا رستگار بشید یعنی تا زمانی که انسان از این شرک و کفر و از شراب و قمار دوری نکند رستگاری نمی بیند اینا ها نا ناکامند این ها هستند و سفوم انما یرید الشیطان ان سفومی هم هست و علت هم هست علت حرمت شراب و قمار انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العذاوت والبغضاء جو نیست که شیطان می خواهد بین شما اداوت و بغض را واقع کند خمر وال والمیصر در شراب و قمار کسانی که شراب می نوشند اکثراً با هم درگیر میشند. کسانی که قمار بازی می کنند، چون زورشون میاد کل سر یک جا به بعد می دند میزنند تو سر هم دیگه می هم دیگر را پس علت چارم و شناعت چارم اینه که اینها اداوت درست میکنن دشمنی ایجاد میکنند، بغضو و کینه درست میکنند. خیلی اوقات میشه. همین الآن متاسفانه بعضی از مسلمانها که شراب را استفاده میکننبل خصوص در گزارش میرسه در بعضی از تارارها مراسم عروسی. بعد از اون که جوان ها مصرف می کنند وقتی خارج می شند حالت درستی ندارند از یک طرف چاغو همه هم همه با هم دارند می زنند به حال به جان هم دیگه می چندین نفر را لطفار می کند و این اتفاق همیشه می افته همیشه می شنویم پس اون چیزی که قرآن می محقق ثابت شده هست این هایی ای که مصرف می کنند بعدا با هم دیگه درگیر می شند. چونکه وقتی که سکر میاد، انسان از حالت متعادلش خارج میشه، نامتعادل میشه. و پنجم و یا عن ذکر الله و عن الصلاة شمار باز می‌دارد هم از ذکر خدا و هم از نماز. انسانی که قمار باز هست، او بیاد خدا می‌وفته. انسان، انسانی که شراب خار است، او نماز می‌خواند. اون ناپاکه اون نجس اون بمسید نمی نمیاد لذا باز شیشم اللہ تعالی خیلی این کلمات کلمات حساب شده هستند فهل انتم منتحون آیا باز می آید یا وقتی که این آیات نازل شدند سبحان اللہ تربیت شدگان مکتب نبوی انهایی که انسان های صادقین بودند و قرآن هم اونها رو بیگه صادقین بی اختیار گفتن بلا قد انتهینا بار الها بعض آمدیم دیگه انجام نمی دیم بس هست و حتی در روایتها هست که زمانی که این آیات را شنیدند و کسانی که در حال میخاری و شراب خاری بودند جام شراب به دست بود نزدیک دهان بود وقتی که آیات را شنید از همونجا برگردند برای آخرین بار نگفتند آخرین بار بزنیم نه باز آمدند و وقتی که باز آمدند هم احادیث شاهدند هم تاریخ شاهد است که کوچه های مدینه جوهای آب پر از شراب شد تمام مشکیزه ها پاره شد کوزه ها شکسته شد ظروف شراب تخلیه شدند تمام را ریختند یه بعض باز آمدند لذا آنها کسانی بودند که فرمان خدا را با جان و دل آنها اطاعت می کردند. مثل مسلمان های زمان ما نبودند که فقط اسلام و ایمان بر زبان باشه، اما در عمل و در درون نباشه. و حفظم الله می فرمد و الله و اطيع الرسول وحذروا. یعنی خدا را اطاعت کنید. رسول خدا را اطاعت کنید در همه احکام وحذر برحذر باشید از مخالفت احکام خدا یعنی نکنید مخالفت ننوشید شراب قمار انجام ندهید مرتکب نشوید وحذروا یام تاکید است وحشتوم آخرین تهدید است آخرین تهدید است فانت ولیتم اگر حولی به معنی اعتراض اگر پشت دادید اگر روی گردانی کردید پس پیغمبر ما کارش را انجام داد فانما علی رسولنا البلاغ المبین جزی نیست که بر رسول ما بلاغ مبین هست یعنی مسئله را رساندن به صورت آشکارا شفاف آشکار واضح برای شما بیان میکند بعد از این خود دانید یعنی عذاب خدا میاد اگر باز نیایید عذاب خدا قطعا به سراغ شما میاد ليس على الذين و عمل الصالحات الجناح في ما طعيموا حالا وقتی که شراب اینقدر منحوس است اینقدر نحس است نجس است عداوت درست میکنه دشمنی درست میکنه بغض ایجاد میکنه خدا را ناراضی میکنه خب اینکه در گذشته مصرف شده تکلیف اون چی میشه این سوال ایجاد میشد نه در میان صحابه که در گذشته مصرف کردیم اونها چی میشه اونها چی کفاره داره نمیدونستیم یا بسیاری از برادران ما بودند که در گذشته مصرف کردن قبل از تحریم اونها فوت کردند الله تعالی میفرماید اونچه که گزشته قبل از استحریم برای انها گناهی نیست من بعد اگر کسی مصرف بکنم بعد استحریم لذا به حساب انها اللہ میرسد لیس علا الذین آمنوا و عمل صالحات و جناح فیما طعیمو نیست بر انهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند گناهی در آنچه که در گزشته خوردند نوشیدند إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إذا متقوا وقت كي انها الشرك دوري کردند وآمنوا إيمان آوردند وعمل صالحا جامدادند ثم متقوا بعدن هم برئين تقوا استقامت کردن وآمنوا إيمان آوردن ثم متقوا وأحسنوا بعدن هم بر تقوه استقامت کردند و احسن درجه احسان اینه که کاملا از خداوند اطاعت بکنه البته بعضی از علماء میگن نه. هر یکی از اینها فرق داره اینجا الله تعالی چند بار تقوه را فرمودند سبار التقوه آمنو ثم التقوه آمنو ثم التقوه احسنو علامه کرتو بی گفته که از قول امام عرض کنم که تبریه قال محمد بن جریر الاتقاء الاول هو الاتقاء بتلقی امر الله بالقبول والتصديق والدينونه به اتقای اول که اتقو و آمنو همون اولین باری که خدا فرمود انسان ایمان داشته باشه ازو پرهیز بکنه بفزيلة ومتدين بهمان باشا ان اتقاء افضل حسد والدينونة به والعمل بان عمل كنا والاتقاء الثاني بالسباط على التسديق ثم التقوى امن يعني استقامت كنت. ثم التقوى احسن واتقاء السفوم يعني زمن اتقاء والاتقاء بالاحسان يعني التقرب بالنوافل یعنی نه تنها از اون پرهیز بکند بلکه قرب خدا را به وسیله طاعات و عبادات و نوافل و مستحبات هم انجام بدهد حاصل کند لذا الله می فرماید اینها بر اینها گناهی نیست پس اینجور ترجمه میشه لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا نیز بر آنهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن گناهی در آنچه که قبلا خوردند و مصرف کردند اذا تقو اما بین بی شرط که اذا تقو و آمنو یعنی تقوی را پرهیزگاری را پیش بگیرند و ایمان بیاورند بار اول یعنی هرچی خدا گفت قبول کنند تصدیق کنند به اون پایبند باشند و ایمان بیارند و عمل صالح انجام بدند تقوی دوم ثمت تقو و آمنو یعنی سپس بعض هم بر این تقوی استقامت کنند و آمنو بر ایمان استقامت کنند و درجه سوم ثمت تقو و احسنو بعض هم همون تقوی و پرهیزگاری را داشته باشند نه تنها انکه تقوی و پرهیزگاری بلکه و احسنو احسان احسان یعنی وسیله طاعات عبادات نوافل مستحبات قرب خدا را حاصل کنند وقتی که به این درجه احسان برسند انت عبد الله کانک تراه والله يحب المحسنين الله چنین مخلصینی را دوست می‌دارد یا ایها الذين آمنوا ليبلونکم الله بشیئ من الصيد تنالوا این آیه گرچه اشاره به جریانی هست اما معنای کلی آیه را من خدمت شما عرض کنم تا آیه بهتر بفهمید قبل از این کنجریان را عرض کنم معنای کلی این آیه اینه که گاهی الله عزوجل بندگان خودش را امتحان میکنه در چیزی که اونها را ممنوع قرار داده چیزی که خدا من کرده اون برای انسان میسرتره یعنی جایزش حلالش زیاد میسر نیست اون ممنوع زیاد میسر است چیزی که نباید انجام بدیم اون زیاد میاد جلوی چشم زیاد میاد جلوی ما و اونی که برای انسان حلال است اون اصلا پیدا نمیشه اصلا در دسترس نیست این امتحان در گذشته بوده بهترین اش امتحان یهودی ها در یوم السبت بود روزی که به انها گفته شد شکار نکنید می که مایی ها هستن شرعا سر آبان و یوم لا يثبتون لا تعدیم روزی که شنبه نبود اصلا مایی نمی آمد این امتحانه حالا مثلا راهای برای اقتصاد برای ارتزاق امروز زیاد هست. اما راهایی که جایز هستند می بینیم که برای خیلی از افراد میگن برای ما مواسثر نیست. اصلا نفی نداره فیده ای نداره. و سود و فاعیده در صورتهایی هست که اون صورتها ناجائزند مردم همینطور عادت کردند. مثلا معاملات ربوی. یکی می گفت که اصلا ممکن نیست کسی صاحب مسکن بشه صاحب خانه بشه بدون گرفتن وام دیگه هر چی کسی دنبال کسب حلال باشه ممکن نیست این صاحب مسکن باشه مگر بدون مسکن از این دنیا کوچ بکنه خب مگر لازم هست که ما صاحب مسکن بشیم از طریق حرام از طریق معاملات رباوی اس گاهی الله تعالی این طور امتحان میکنه که راهی که نامشروع از راهی که ناجایز است اون راه برای انسان خوب میثره مثلا شما برید بخواید که معامله بکنید صورت‌های ناجایز میثره اگر بکنید خوب فایده میبرید بعضی وقتا این حواله فروشان عزیز میگن صورت‌های که شما میگه ناجایز است همه با اینها کار میکنند، اگر اون صورت های جایز نه کسی کار بکنه هیچ نفی نداره نا همین امتحان الهی است همین امتحان برای صحابه رسول الله شد شبیه این الان اون چیزی که این آیه اشاره میکنه شبیه اون چیزی که برای یهودی ها در روز سبت شد برای صحابه در احرام شد از ممنوعات احرام چیه شکار هست اون زمان شکار را مثل این زمان نمیزدند که بلاخره تفککهی بکنند و خوشگذرانی بکنند و یک کبابی از شکار بخورن. اون زمان مردم برای شکار میرفتند چیزی نداشتند بخورند. همونطور که ماهیگیران از دریا ماهی شکار میکنند، اگر نباشند نمیتونن بخورند اون زمان اصلا وسیله ارتزاق بلخود در سفرهامی شکار بود. اگر شکار نمیکردند، بلاخره از گروس تلف تلف میشدند. صحابه وقتی که از حدیبیه به طرف حدیبیه رفتند در احرام بودند گرست نیم بودند چیزی نبود اما میگه که اینقدر شکار داروبر ما که اگر با نیزه میزدیم راحت میتونستیم بزنیم حتی با دست می بگیریم این امتحان الهی بود ولی صحابه مثل امت موسی نموافق نشدند در امتحان امتحان سربولاند شدند. الله تعالى به همین اشاره می‌فرماید: <تصفح> يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنين لا يبلونكم الله بشئ من الصيد حتما حتما شما را می آزماید الله بشئ من الصيد بچیزی از شکار الصید ایدیکم و ورماحكم که به او رسد هم داستان شما، هم کنیزه های شما. الله اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بالغیب. این علت است. چرا خدا؟ شما را امتحان میکند؟ الله که همه چیز را میداند. لِعْلَمَ اللَّهُ قبلا گفتیم، علم خدا به معنی ظهور است، به معنی مشخص و معین کردن است. معنی نمیکنیم تا خدا بداند؟ تا که خدا مشخص کند ظاهر کند من یخافو به الغیب چه کسی ندیده از خدا میترسد همینطور که خدا را ندیده عذابش را هم ندیده ولی میترسد صحابه بالاخره از خدا ترسیدند شکار نکردند حتی در بعضی از غزوات میاد تو احادیث کسانی دیگه که غیر محرم بودند رفتن برای خودشون شکار کردن ایتی که از شکار آوردن به صحابه دادن گروس بودن نخوردند ما نمیخوریم آخر رسول الله فرمود نه برای شما شکار نشده بخورید فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم هر کسی تعدی کند بعد از این تحریم بعد از اینکه الله اح... حرمت را بیان فرمود برای او عذاب است. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم انم از محرمات الوهي بيان تعريمه الله اس اي مؤمنين شما صيد را شکار نزنيد نکوشيد در حالي شما احرام داريد ومن قتله منكم متعمدا هر كسي بكشت شما متعمدا بكشت عمدن بكشت فجزا مثل ما قتل من النعم بس جزای اون چیزی کی مثل آن چیزی که کشته از چارپایان یعنی چی؟ اینجا در تفسیر و تشریحش اختلاف است. از. از نظر امام شافعی رحمت الله علیه این است که اون چیزی را که کشته اگر از چهارپایان مثل سوریش پیدا میشه یعنی از حیوانات اهلی جزا همونه. مثلا گاب وحشی را کشته یا الاغ وحشی را گور خر به کشته مساوی اون چیه گاو هست یه گاوی را به عنوان جزا به عنوان جریمه بکشه اگر آهوی را کشته بز را شکار کرده و زده خب جزایش مثل اون از حیوانات اهل گوسفند است بل اخر گوسفندی را باید به عنوان جزا و به عنوان جریمه بکشد اما امام ابو نصر رحمهم الله می فرماید نه جزا اینجا مراد جزا معنوی هست یعنی قیمت قیمت را چرا قیمت میگه ببین به دو دلیل یکی اینکه اینجا می فرماید يحكم به زواعد منكم اون جزا فیصله بکند داوری بکند دو نفر عادل خب وقتی که بگیم گاوی کشت گاوی وحشی آواز گاوی احلی اینجا دو نفر عادل لازم نیست اگر بوزی کوهی کشت ایک بوزی احلی و گوسفند احلی بکشد، دو نفر عادل لازم نیست وقتی که می فرمید دو نفر عادل معنیش اینه که اون چی را اون حیوان وحشی را دونفر عادل قیمت بزند. به اندازه همون قیمت حیوان اهلی بگیرد مثلا امکان داره اون گاوه وحشی به اندازه 4 تا گاوه اهلی قیمت داشته باشه حالا شما یک گوسفند بگیرید شاید با 5 6 میلیون تومن بتونید بگیرید ولی یک آهو شاید 20 میلیون تومان کمتر نباشه 5 تا گوسفند میشه نظامی فرماید قیمت معتبره چرا یکی اینکه یحکم به زوا عدلم فرمودند یکی اینکه خیلی از حیوانات هستند که وحشی هستند اما از اهلی شبیه اونها ما نداریم که بکشیم مثلا کسی خرگوشی میزنه کسی پرنده‌ای میزنه خب برای صدقه پایینترین حیوان چیه گوسفند است از گوسفند هیچ وقتی مرغ دارید که به عنوان قربانی کسی بکشه نیست گوسفند هست بالاتر گاو بس بالاتر شوتور هست پس بنابراین این یه چیزی را تعیین بکنیم که هر جا همین باشد لذا میفرمایم مثل مراد مثل معنوی هست یعنی قیمت فجزا جزا مثل ما قتل مثل اون چیزی که کشته من النعم از حیوانات اهلی یعنی قیمت بکنند و به انداز با اون قیمت حیوان اهلی بخرند یحکم بهی زوا عدل منکم دو نفر عادل داوری بکنند و فیصله بکنند یعنی اون قیمت را تعیین بکند و بعد که قیمت را تعیین کردو به وسیله این قیمت حیوان اهلی به عنوان حادی گرفته بشه به عنوان مثلا گوسفندی هست دو تا سه تا شطوره گاوه حدیم بالغل کعبه حدی باشد که به کعبه برسد یعنی اونجا برده بشه وچی اونجا قربانی بشه او کفاره طعام و مساکین یا کفاره طعام مساکین یعنی به اندازه همون قیمت طعام مساکین به عنوان کفاره داده بشه او عدل ذالک سیامن یا برابر این روزه یعنی هر چی قیمت بود در مقابل هر از کنم که فدیه هر فطریه هر تام یک روز روزه است بله لیزو وبال امره تا که این انسانی که چنین جنایتی در حالت احرام یا در حرم مرتکب شده بچشد به اون جزای امرش وبال امرش را بچشد اما در گذشته هر چی بوده عف الله عما سلف الله تعالی از گذشته عف فرمودند گذشته را الله بخشیدند اما در آینده شما باید احتیاط کنید و من عاد فینتقم الله من هر کسی که دوباره اعاده بکند دوباره تکرار بکند با وجود اینکه الله تعالی اینجا ممنوع فرمودند با وجود من باز هم در حالت احرام شکار بکند که اینها از ممنوعات هستند والله عزيز زنتقام انتقام الله انتقام میگیرد یعنی به کیفر اعمال او را میرساند والله عزيز ذو انتقام الله عز وجل غالب هست و دارای انتقام است یعنی الله میتوند انتقام بگیرد در آیات گذشته در بیان تحریمات الهی یکی از محرمات را خاندیم که صید هست در حالت احرام لا تقتلو سید و انتم حرم. که و اگر کسی شکار بکنه سیدی بزند حالت احرام باشد نه اینکه اون سید حلال میشه حرام میشه حرام است برش اما جریمه هم داره کفاره هم داره فجزاا مثله ما قتل من النعم بر اساس ان سيد يا قيمتي ان سيد از نعم و از چارپيان بايت بگيره دو به ببرد حد ينبالغ الكعبه يا معادله من جزاء طعام مسكين يا معادله ان روزه گرفتن اما از این آیه اینطور مفهوم می شود که مطلقا سید جایز نیست چه سید بر باشد چه سید بحر باشد چه شکار دریایی باشد الله تعالی این را استثناء می فرماید صید بحر میفرمای جایز است حلال است این جز محرمات نیست در گذشته حاجی ها که به وسیله کشتی ها از طریق دریا می رفتند، طول میکشید در دریا دیگه هیچ امکاناتی نیست برای خرید و فروش برای خورد و خوراک و ماهیگیری و شکار ماهی و تنهى و تنهى اميده هست و بوده بان دليل الله تعالى صيد البحر استثنافر مدنعه وحل لكم صيد البحر و طعامه لكم و هم براي استفاده شما و هم براي استفاده تمام و حلال قرار <تصفيق> این حلال از سید البحر سید دریا اما سید البر و خشکی که حرام هست اون موقته ما دمتم حرم و حرم علیکم سید البر ما دمتم حرم تا مادامی که در احرام باشی البته دوتا حرمت است یکی حرمت احرام یکی حرمت حرم حرم حدودی دارد از حرم که خارج شدید و در احرام نبودید اشکالی ندارد واتقوا الله الَّذِي اليه تُحْشَرُونَ مثل ايات دیگر نسخه عمل هست و هم نسخه تقوا و اتقوا الله النسخه عمل هست الذي اليه و بار بار خدمت شما عرض کرده بودم این داشته بيشتري النسخيك الله عز وجل ذكر مي فرمايت فكر آخرت هست الذي إليه تحشرون ان ربك بسوئوها مجام مي شفيد شارب تخويف وخرا بيها ما هست كي كسانيك تقوار رعايتنا مي كونند براي انها عذاب هست جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدية والقلائد در این آیت بعد از بیان تحریمات الله اینجا بیان منظورات الله هست نظر برای خدا کاری که برای خدا باید انجام بگیره سفر مذهبی فقط برای رضای خدا نه برای رضای غیر خدا و همچنین شما از اینجا اگر میخواهید همین شهر خودتون برای زیارت قبور برید برای زیارت قبور برای چی میره برای رضای خدا میرید خدا اجازه داده و خداوند فرموده که اونجا برید و زیارت کنید رسول الله که میگه خداوند فرموده دعا کنید برای شون یاد آخرت را بکنید پس سفر دور یا نزدیک بشه فقط برای تقرب خدای عزواجل و همچنین حیوانی که یه جایی برده میشه فقط برای رضای خدا اون هم در اماکینی که خداوند اززوجل اجازه فرموده و اون تنها چی هست بردن برای حرم برای قربان کردن برای الله نجای دیگر بغیر اگر جای دیگه ما ببریم نمادی که مال غیر خدا باشد اون رشما دیروز خادید اون جز انصاب هست الانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. لذا اینجا منظورات الله بیان میشند نظری که برای خدا اولا الله تعالی ذکر کعبه میفرماد جعل الله الكعبة البيت الحرام قرار داده دا الله تعالی کعبه را کعبه میگویند که مکعب هست یعنی البيت الحرام اون بيت حرام را اون بیتی که حرمت دارد و باعث حرام بودن بسیاری چیزها اطرافش هست اونجا جنگ حرامه اونجا شکار حرامه اونجا قطع درختان حرام هست لذا اون بیت حرام را الله تعالی قرار داده قیام للناس سبب قیام مردم سبب قیام و همچنین سبب معیشت و امنیت قیام همه معناها را داره همه اهل تفسیر معنا کردن من توضیح میدم چطور قیامل لناس هست ببینید اولین چیز امر دین و دنیا به کعبه بستگی دارد تا زمانی که کعبه شریفه باشد هم دین ما قائم هست هم دنیای ما قائم هست هم دنیای ما قائم است. چون در روایت ها داریم که یه زمانی میاد که در آخر زمان پادشاه ظالمی و غیر دینی میاد و کعبه شریفه را تخریب میکنه اونجا را صاف میکنه هیچ اثری از خانه کعبه نمیماند مسلمان های که در دنیا میمانند اونا به همون سمت رخ میکنند و نماز میخانند و کم کم کلن کعبه به فراموشی سپرده میشه یعنی همون سمت که میخانند چون دیگه چیزی نیست کم کم اونا فراموش میشه مسلمانان هم از بین میرن آخر در دنیا نه وجود کعبه میماند و نه استقبال به کعبه این همون است که هیچ نمی نمیماند لذا الله عزوجل دنیا را تمام میکند قیامت را برپا میکند پس بقای دنیا هم به کعبه بستگی دارد قوام دنیا بر پایی دنیا هم به همین به دن... همین بستگی داره و دین ما، بقای دین ما و اینکه قبله ما هست اینکه همه نمازها را با وجود اون میتونیم ادا بکنیم که او باشد به سوی او استقبال بشه حج که از فریزه های مهم و از ارکان دین است هم به وسیله کعبه و رفتن به کعبه لذا قوام دین دنیا بر همین هست تفسیر مظهر نوشته قيام الناس هو ما يقوم به امر دینهم و دنیاهم امر دین و دنیا به اون بستگی داره اما امر دنیا چطور تفسیر مدارک اللهم نسفین نوشته قیل لو ترکوهو ای البيت الحرام اگر مردم هورا ترک بکنند لم ينظرو و لم يجزو یعنی بیشتر مهلت داده نمی شوان در زمین باقی نمی مانند تمام میشه دنیا یکی اینکه که قیام القیاما للناس به این معنی که خدمت شما عرض کردم اما یکی دیگر از معانی قیام للناس اینه که این را بیشتر مفسرین معاصرین گفتند اینه که در اون زمان در سرزمین حجاز بلخصوص مردم مکه و اطراف مکه هیچ حکومتی نداشتند دنیا همه حکومت داشت یک طرف حکومت ایران بود یک طرف حکومت روم بود و تمام مردم را اونها تحت پوشش قرار گرفته بودن یکی از کشورها مثل یمن مثلا تحت سیطره ایرانی ها بود شام و سوریه اینها جز تحت سیطره شامی ها بودن، رومی ها بودند مسیحیان بودند خلاصه هر جا یک حکومتی بود و میدونید که حکومت که باشد امور به خصوص امور معیشتی و امور امنیتی که دو چیز لازمه مردم در دنیا همین دو چیز است ابراهیم علیه الصلاۃ و سلام هم برای همین دو چیز دعا کرد که امنیت باشد معيشت و اقتصاد خوبي باشد رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات هم براي امنية دعا کرد هم براي معيشت دعا کرد حالا انجا كي حكومتي نبود انجا بالخصوص وقت كي حكومت نباشد امنية نميماند هر کسي كي قدرت دارد زور دارد برمظلوم ستم میکند مالش رابطاراج برد. کیه ایک جلوش را بگیرد پولیسی هست حاکمی هست دادگایی هست وجود نداره و وقتی که امنیت نباشه اقتصادم خرابه کسی جرت نمیکنه اونجا مال بیاره کسی جرت نمیکنه تجارت بکنت لذا این دو چیز با حکومت میشه و لازمه ای یک حکومت هم همینی که برای مردمش این دو چیز را تعمیم بکند امنیت و اقتصاد در مکه مکرمه و در بلاد حجاز اصلا هیچ نه حکومتی نبود آزاد بودن مردم حتی ایرانی ها و رومی ها اینها را تحت سیطره خودشون در نیاورده بودند لذت زندگی کردن مشکله امنیت میخواد الله عزوجل کعبه و وجود کعبه سبب قوام قرار داده بود که وجود کعبه چون مردم تمام کسانی که معتقد بودند و نبودند همه احترام می‌گذاشتند بل خصوص بعد از جریان اصحاب فیل وقتی که اون اتفاق افتاد همه دنیا می‌ترسید که نسبت به اونجا تعرض بکنه لذا اون واقعه و اون اتفاق و قبل از اون هم سیدنا ابراهیم در تعلیماتش سیدنا اسماعیل هم همین بوده که اینجا حرم است مردم مکه حتی دشمن خودشون را قاتل پدرشون را اگر می در همون زمان جاهلیت در حرم می بهش تعرض روز نمی کردن بهشکار نداشتن قمن امن بود می از این جبر بیرون به حسابش می رسیم رضا وقتی که امن بود اقتصادم خوب بود تمام سفرهای تجاری به این هم برکت همون دعای ابراهیم بود سفرهای تجاری از یمن از شام هم به اینجا صورت میگرفت همه نوع خوراکی ها بود پس ببینید این همه به برکت چی هست به برکت کعبه شریفه هست لذا می فرماید جعل الله الكعبت البيت الحرام حالا اینا جز شعائر الله هستند. چند چیز اینجا خدا یاد میکنه خدا قرار داد بیت حرام را قیاما للناس سبب قوام مردم سبب برپایی مردم قوام و برپایی امنیت و معیشت بر اساس این تفسیر دوم و بر اساس تفسیر اول سبب بقای دین و دنیای مردم و شهر الحرام و همچنین ماه حرام را ماه حرام را بهش احترام می حتی دزدها و رهزان ها در ماه حرام دزدی نمی کردند زورگویان و ظالم ها در مای حرام نمی جنگیدن می ترسیدن این کار نداریم که بعد ایک سری برای منافع خودشون درست کرده بودن می خانیم در سوره توبه والحدی و همچینین حدی. این حیوان که برده می شد بهترین سواری بهترین مال اون زمان شطور بود شطوری را که وقتی می بردند البته علامتی می گذاشتن یکی از علامتها والقلائد قلائده بود نه خود قلاده همه اعتبار داشت قلاده چرمی کفشی پوستی و چیزی که گردنش آویزان میکردند و بعضی اشعار میکردند یعنی کوهانش را زخم میکردند و خونی میکردن بعضی رنگ میزدند همه اینها را الله میفرماید که اینها سبب بقا بود یعنی سبب امنیت بود سبب معیشت بود هیچ کسی تعرض نمیکرد این لطفی الله است ذالک لی تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. این همه اونچی که بیان شد چی از حرام، چی از حلال، چه این منظورات تا ای ما بدانی ذالک ای جمعیه و را. تنها این آخرینه. تمام اونچی که بیان شد تاکش شما بدانید. یقین کنید که أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. این خواص علمیه. اللہ از تمام که در آسمان ها و زمین هست اللہ می داند بر اساس اون علم کامل اللہ دستور میده ده میکند. می کند و ان اللہ بکل علیم, والله علیم و اللہ تعالی هر چیز علیم و دانه است بعد از این اللہ عز و میده هم ترهیب است هم, هم ترغیب یعنی با توجب این دلائل یه اده هستند که واقعا اونها می ترسند از خدا توبه می کنند یه دهستم پروان ندارند اعلموا ان الله شدید العقاب بدانید که همانا اللہ سخت عذاب می و ان الله غفور رحیم و همانا اللہ عز بخشایند و مهربان است اما وظیفه تو ای پیغمبر همین کاره از عذاب خدا بترسان و بمجدها و بشارتها الهی خوشبین کن مجده بده ما على الرسول الا البلاغ نیست بر رسول مگر پیام رساندن یعنی کار رسول فقط بلاغ است و رساندن این مطالب و يعلم ما تبدون و ما تکتمون این ترغیب اخلاص است. هر کسی قبول بکنه هم باید برای الله باشد چون خدا میداند. هر چی که ظاهر میکنید و هر چیزی که کتمان میکنید. و مخفی میکنید. کنید قل لا یستوی الخبیث و الطیب لو اعجبک کثرت الخبیث ارز کنم که اینجا الله تعالی نکته مهم دیگری بیان می فرماید اون این که کمیت اعتبار نداره کیفیت اعتبار داره جمعیت اعتبار نداره بلکه با خدا بودن اعتبار داره سواد اعظم هم با چی میشه با اینکه انسان ها در مسیر حق باشند لذا خبیص که شرک باشد کفر باشد نفاق باشد نظر برای غیر خدا باشد تحریمات غیر الله باشد این همه بحثای این سور حمین هستن برابر نیستن خبیص و طیبونی که پاکیزه هست توحید هست و ایمان به قیامت و ایمان به رسالت هست و در باب عبادت عبادتی که برای خدا باشد منظورات الهی باشند تحريمات الله رح رمضان انها برابر نيست ولو اعجبك كثرة الخبيث قلت در شقفت واقع كنت ودر تعجب وادار كنت شمارة كثرة خبيث يعني كثرة زياد باشا مهم شيء هست ان كيفية هست فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون بعد النسخي عمل اي اقل مندان اي اهل خرد اي دوراندشان بِتَرْسِيدٍ از خُدا لَعَلَّكُمْ این إِنَّ سَمَرَةُ تَقْوَاس تَاکِ رستگار بشید کسی که تقوا داشته باشد رستگار میشه یا ایها الذين آمنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم در حینی که این احکام نازل میشدند و این دستورات را الله تعالی صادر می فرمود بعضی وقتها از صحابه می کردند که این سوالات بعضی ها مشکل دار بود چون الله تعالی یه مسئلے را این نکته را خیلی توجه کنید در این مسئله خیلی مسائل حل میشه بعضی وقتا شما هم فکر میکنید که یه بعضی از احکام ابهام تویشون هست یا اجمال هست بعضی احکام را بعضی دستورات را بعضی آیات را الله تعالی به صورت اجمال بیان میکنه خوب باز نمیشه بسیاری از مسائل بودم مثل مسئله کلاله که حضرت عمر می که رسول الله از این دنیا رفتند و واحد تمام شدم ولی من در رابطه با کلاله هنوز شفی نشدم منظور اینه که خب بعضی وقتا انسان خوب متوجه نمیشه ولی بعضی وقتا الله تعالی یک مسئله را به صورت ایک اجمال بیان میفر. زیاد کش دادن و زیاد باز کردن و زیاد سوالات بنی اسرائیلی مطرح کردن مناسب نیست بالخصوص در زمان نزول وحی چونکه مثل همون بنی اسرائیل که خاندیم اگر گاورا همون روز اول می کشتند لَوْزَبَحُوْ اَيَّ بَقَرَةٍ لَأَجْزَأَتْهُمْ کافی بود ولی هی سوال کن سوال که می کنی در وحی بازه خداوند چیزی رزک می کنی شاید برای شما اون مخدور این رنگ باشه این صفت باشه این شرایط باشه پس الله میفرمایشه شما سوال نکنید از چیزهایی که اگر اونها برای شما واضح بشه برای شما ناگوار بشه این آیه که ناظر شو بعد از آن صحابه سوال نمی کردن در حدیث شریف می آید که خیلی دلمو میخواست که کسی از دور و نزدیکی میاد و از رسول الله سوال میکنه انسان عاقل و فهمیده باشه که سوالات خوبی بکنه تا ما هم پیش نبیم جواب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را صحابه خیلی احتیاط می کردن بعضی ها نوشتن یه روزی آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم بلند شدند و فرمودند که امروز هر کسی هر سوالی داره بکنه خب بعضی ها نحوه سوال کردن را نمی‌دانند. فردی بود صحابی بود اما سادلوهی بود مثل عبدال... بنام عبدالله ابن حضافه گفتی آن رسول الله پدر من کیه آن حضرت فرمود حضافه هست پدرش ما حالا این نو سوالات این سوال هیچ ربطی نداره با اون چیزی که بلاخره جاست الله تعالی میفرماید یا ایها الذين امنوا لا تسألوا عن اشیاء شما سوال نکنید از چیزهایی که ان تبدل لكم اگر برای شما آشکار بشه ناگوار میشه برای شما برای شما چی میشه ناگوار میشه به همین دلیل بود که رسول الله صلی علیه و وسلم نماز تراویه را سه شب چهار شب بیشتر نکاندند قیام رمضان را چونکه زمان نزول وحی بود این همه بالاخره حجوم این همه عشق و علاقه مردم کی میآیند خب فرض میشه واجب میشه اون وقت برای بعدی ها اصلا برای تمام احاد امت وقتی که واجب بشه انجامش مشکله لذا و وان تسالو عنها حين ينزل القران اگر شما سوال کنید در اینی که قرآن نازل میشه در زمانی که قرآن نازل میشه تو دلکم برای شما روشن میشه برای شما واضح میشه ظاهر میشه لذا بهترینه که سوال نکنید بعضی مردم گشت زیاد ربط نداره ولی بنده میخوام از اینجا استنباط کنم و از اینجا برداشت کنه یه مسئله ای را از چین مسئله که ارز می کنم استمباط و اشتاد بنده نیست فقها ها همینه گفتم ولی من از این آیا میخوام بهره بگیرم بعضی مردم هستن که مریضی وسوسه دارند مریضی وسواس دارند وضو میگیرن میگن ما وضو می گیریم فکر میکنیم که هنوز یه جای خوشک مونده شاید یک قسمتی از دست خوشک اونجا پشت با Hey, وسوسه دارن دوباره وضو میگیرند باز دوباره وضو میگیرند یا نماز میخونند وضوصهشون میاد بعضی ها الان یک بار وضوصه بیشه انسان نمیدونه سرکت خانده چهار رکت خانده فرق میکنه ما اینکه هر روز وضوصه هست ایه مریضی هست و بعضی ها هستند که همیشه همین دو روز جوانی میگفت که من همیشه سر نمازم احساس میکنم لباسم کثیفه و یقین داری نه میبینید شک عرض کنم یقین را با شک نمیشه چیکار زائل کردین یک مسئله ای هست که فقها گفتند و قاعده ای هست که الیقین لا یزول شک شما یقین دارید که صبح وضو گرفتید پس بر وضو داشتن استصحاب حال هم همین است بر وضو داشتن صبحتون چی دارید یقین دارید حالا سه چار ساعت گذاشته شک دارید که آیا من بیوضو شده هم یا نه ولی بر وضو داشتن یقین دارید اون یقین با این شک خود به خود زائل نمیشه یقین داشتی که لباس تمیز بوده حالا شک دارید که شاید این بالاخره لباس من کسیف شده این اون یقین با این شک ایچوق زائل نمیشه بزدار زیاد دنبال این نرو اینجا که الله می میفرماید که من اگر برای شما ظاهر بشه تسوه کنم، بهتر همونطور مجمل که هست مبهم که هست مبهمش بدان. به همین خاطر خیلی مسائل استنطفقام مفسر میگه آبهم اموما، آبهم الله. چیزی که خدا مبهم فرموده شما هم همونطور مبهم بدانید. زیاد کشش ندید، ها اگر تفصیلش در خود قرآن است در سنت رسول الله باید انسان دنبالش میکنه ولی نه در قرآن است، نه در سنت، لذا بیشتر باز کردن و مسائل از طریق اسرائیلیت درست نیست لذا چیزی که انسان به وسیله وسواس برای انسان میاد انسان اسلام وسواس را تحویل تا تا نگیرد این در واقع وسواس از طرف شیطان هست انسان بگه که همین طور که من میخوانم ولیی که بی وضو باشم ولیی که لباسم ناپاک باشه خدا ایمان قبول میکنه یعنی زیاد دنبالش نره تلقین بهترین چیزه عرض کردم اینجا هم خیلی چیزها هستن که اگر اینها برای شما واضح بشن تسوکم بهتر واضح نشن همون طور که خدا به صورت مبهم و مجمل فرض کرده همون طور انجامش بده زیاد دنبال جزیاتش نباش و انت تسالوها عنها حين ينزل القرآن تبذلک اگر شما سوال کنی زمانی که قرآن نازل میشه برای شما ظاهر میشه خدا بیان میکنه اف الله عنها خداوند الآن سؤالاتي قزشته معافكت ولكن الآن سؤال لا يمكن والله غفور حليم همانا الله تعالى هم بخشانده وهم حليم هاس قد سألها قوم من قبلكم همانا سؤال كدنا هم سؤالها قوم قبل هاس شما وقت كي برايونها جواب آمد جواب مشكل بو ثم أصبحوا بها كافرين بإنشي شنا منكر شذا أصلا أنجام نادا ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة، ولا وصیلة، ولا حام. عزب خدمت شما که ك... اه... بعد از بيان منظورات الله اینا تمام تحت شرك فيليمي اند. گفتم دريم تصور بخش شرك فيليمي است. هم مایده هم انعام. انعام. حالا بيان تحريمات لغير الله است اون چيز که انسان به خاطر غير خدا بر خود حرام میکنه. و اون غیر خدا را وقتی که ما فوق الاسباب عالم الغیب مشکل گشا حاضر و ناظر بیدنه این کفر شرک لذا بسیاری بودند که به خاطر خدایان خودشون شترهارا و اقسامی از شطرها چکار از انکاران رہا میکردند می بعضی ها فقط شیرشون را جایز نمیدونستند که استفاده بکنن مگر شیرشون را برای همون مجاوران این در واقع تعلیم و آموزش مجاوران بود به خاطر خودشون یعنی این شیر فقط برای مجاوران این بکده جایز است برای کسی دیگه جایز نیست بعضیا شیر و سواریشون را بعضی گوشتشون را انواع شد بودند. بودن اینجا خدای از زواجل چهار ذکر فرموده ما جعل اللهم من بحیرت ولا سائبت ولا وصیلت ولا حام الله تعالى مشروع قرار نداده بحیر را سائب را وسیل را حام خب در رابطه با تفسیر اینها و توضیح اینها اختلاف هست اون چیزی که بنده ارز می کنم شاید شما در تفسیرها بعضی تفسیرها با اندک تفاوت ببینید نظرات متفاوت هست الان اینا چه نو بودند منظور اون از کنم که اشتراک کلی اینه که این نو شطورها را برای معبودان وقف کرده بودند اما بهیره به اون شطری میگند که شیرده بود و فقط شیرش را به خاطر خدایان بر خود حرام کرده بودن هم بر خود، هم بر مهمانان، هم بر اطرافیان وش فقط و فقط از همون کسانی که خدمت اون معبودان را میکردن، مجاور اونها بودند فقط برای اونها جائز بود این تفسیری که من می میکنم از طابعی مشهور حضرت ابن المصیب هست می که سعید ابن المصیب قال ابن المسيب انها البحيره التي منع لبنها للتواقيد فلا تحلب فغت شیرش برای چی بود تواقید بود و اون نوشیده نمی‌شد این بحیره دومی صائبه صائبه میگویند که به اون شطری گفته میشه که دهتا شطر بچیه موانس آورده شطور ماده آورده پشت سرش این دیگه خیلی بالاخره محبوب بود و این کلی خیر و برکت داشت چون شطور وقتی که شطور بچه بیاره خیلی خوبه ولی شطور کسانی که مالکان شطور و صاحبانی شطور هستند میدونند وقتی که شطور بچه ماده بیاره بیشتر باعث خوشحالی میشه چون باز اون ماده دیگه میاره لذا می گوفته از صائبه ی ناقهت الناقه عشرت البطن اناس ده تا فقط چی می آورد؟ شو تربچه ماده می آوردن در ظرف ده سال بیشتر کم تر فتهمل ولا ترکب ولا يجذب وبرها اون دیگه گذاشتن میشد بخاطر معبودان می گفت این خیلی داره برکات هست نه سوار می شدم بر اون نه اون را چی می پش پشمش را استفاده می هیچ نوع استفاده برای خودشون جائز نمی وسیله سومی هست وسیله سو وسیله ارز کنم که هی ناقت التي تب فتلد انسا ثم انسا بولادت اخرى لیسا بينهما ذكر فیترکونها لآلهتیم این همون شطور جوانی که تازه شروع به زائدن میکنه اولینش هم شطور بچه ماده دومیم هم ماده دو تا پشت سر هم بذاه این را هم راها می کردند و آخری هست الحام حام اون شطور نری را میگفتند که اون سبب حامل شدن و آبستن شدن حداقل 10 تا شطور دیگه ماده شده. الفح یولد من ظهره عشرت البطن لذا این رحم برای معبودان رحم می‌کردند خب اینها را که بر خود حرام می‌کردند چه شیرشون را چه سواری و پشمشون را چه گوشتشون را اینا همه حلاله همه طیبه خدا حرام قرار نداده شما برای معبودان حرام قرار می‌دهید اینا حرام نمیشه. لذا واجب هست که انسان این حرمت را بشکنند چون این آلیه و ارزش را ندارند و جایگاه را ندارند این جایگاه جایگاه اولوهیت است اون حرمت را بشکند نباید بخاطر انها چیزی حرام قرار داده بشه حرام حرام الهی است اونی که خدا حرام کرده و اینها را الله تعالی مفرمه اینا افتراه بیشتر این رسومات را عمر ابن لحا اوارده بود از جاهای دیگر سفر میکرد، جاهای دیگر رسومات را می دید برای مردم مکه می آورد الله می فرماید ما جعل الله من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام الله قرار نداد بحیره، را و ن سائب را و ن وسیل را و ن حام را قرار نداد اینها را مشروع یعنی انها مشروع نیستند ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب اما کسانی کی کفر کردا افترامی گینبر اللہ دروغو را واكثرهم لا يعقلون اکثرن ها عقل ندارد خرج ندارد و ان ج اللہ تعالی التی لا يعقلون رب یم فرماید ببین عاقل کسی هست کی هر حرفی میزنه بر اساس دلیل مدرک میگه اما اینها اینها میگم از بهتران شنیدیم دیگه چی؟ و اگر قیل لهم تعالو یا ما انزل الله و یا الرسول هرگاه بیانها گفته میشود که بیاید بیسوی آنچه که الله نازل فرموده و بیاید بیسوی رسول خدا که رسول خدا برای ما بیان میکنه در مسئله تحريم و تحليل بیاید خدا هرچی گفته. و هر چه رسول الله تفسیر میکنه قالو حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا میگفتن ما را کافی است اون چی که ما یافتیم بر امام پدرانمون دیگه دلیلی نبود عمده دلیل همین بود تنها دلیل همین بود الله میفرما اولو کان اباؤهم این امن قبلا خدمت شما کردم حرف استفهام است بعد از این فعل مقدر است ایت تبعونهم وَلَوْ کان آبَاءَهُمْ كَانَ آبَاؤُهُمْ یعنی yani, آیَت تابیعُنَهُمْ آیا اون پدران را پیروی میکنند و اطاعت میکنند گرچه اون پدران باشند لا یَعْلَمُونَ شَیْئًا وَلَا یَهْتَدُونَ نه چیزی میدونستن و نه بر مسیر هدایت بودند یعنی yani, به هیچ کتابی از کتب آسمانی هدایتی نداشتند لذا آیا از چنین پدران اینها اطاعت میکنند يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم بعد ذي الله تعالى مؤمنين را خطابيكن اي مؤمنين شما نگران نواشت شما خودتون را أنفس خودتون را لازم قرار بدهيد يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم ای کسانی که ایمان آوردید بر شما هست های خودتون شما خودتون را از عذاب خدا برهانیت نجات بدهید لا یضرکم من ضل اذا اهتديتم اون کسی که گمراه شده گمراهی او برای شما هیچ ضرری ندارد وقتی که شما هدایت بشید ببینید از ظاهر این آیه یه چیزی مفهوم میشه کسانی که فقط از سیاق و سباق را در نظر نگیرند و از امقی آیه خبر داشته نباشند فقط ظاهر بین باشند یه چیزی غلطی برداشت میکنند اون چیزی غلطیه بعضی فکر میکنن که حتما ما اگر خودمون را نجات بدهیم خودمون عمل بکنیم اصلا با بقیه مردم هیچ کار داشته نباشیم ما نجات میابیم ما نجات می آبی یعنی تبلیغ بر ما فرض نیست در حالی که ما می خانیم که تبلیغ فرضه، امر به معروف و نهی از منکر واجب است حتی امین روز بود غالباً که خاندم در رابطه با اینکه یهودی ها و ارز کنم که بنی اسرائیل به عذاب گرفتار به سبب گناهان بود و لا یطناهون عن منکر و بعدا خداوند سرزنش فرمود علمارا دراویش را لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و عقلهم الصعد. چرا اینها باز نمی دارند یعنی وظیفه همه ماست که مردم را از گناه باز بداریم از آیات دیگه این وظیفه فرضیتش وجوبش لازم میشه حتی قبلا خدمت شما در آیه شریفه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر ارز کردم که گرچه یک گروهی معتقدند که این فرض یک فرض کفایه هست اما بعضی معتقدند که این فرض فرض این هست یعنی هر کسی در اون محیط و ماحول خودش یکی را تا تعالی توانایی داده در حد یک شهر یکی را توانایی داده در حد یک کشور تمام عالم بین المللیش قرار داده اما یکی دیگه وقتی که یک مسلمان عادی هست در اون محیط خانه خودش این واجب هست فرزندان خودش را از بی نمازی برحضر بدارد زنش را از بی حجابی برحضر بدارد دخترش را حاک از گناه اینا را برحضر بدارد این یعنی وظیفه تک تک امت است چون که قرار نیست بعد از این پیغمبری بیاید تنها راه بقای دین در میان ما همین امر به معروف و نهی از منکر است بس از آیات دیگر اون برداشت را میکنیم اما از این آیه از ظاهر این آیه این برداشت میشه که علیکم انفسکم خودتون خودتون را نجات بدهید کسی گمراه شد همسایه هم دیواریتون هر چی باادبات لا یا دررک مندار نح دادهده هر کسی گمراه شد شما هدایت بشید برای شما گمراییششی ضرری ندارد. در حالی که در روایط ها میآید که اگر کسانی که در مسیر حق هستند مسیر درست هستند گمراهان را وقتی که چی نکنند ارشاد نکنند عذاب بیاید همه رو در بر میگیرد. اونها چون گناه کرده اینا چرا نگفتند. چرا به وزیفه خودشون عمل نکردند پس جواب این معما این تناغز چی هست جوابش اینه که این آیه را چنانچه تفسیر ابن جریر نوشته و اصح التعویلات عندنا بتعویل هازه الآیه قوی ترین و سهی ترین تعویل از نظر ما ما عن ابی بکر صدیق رضی الله عنه فيها. روایتی کردی ایشون شده و هو يا ایوها الذين آمنوا عليكم انفسکم معنی ایش چیه الزم العمل بطاعت الله و بما امركم به طاعت خدا را ای مومنی شما لازم بگیرید هرچی خدا شما را امر کرده لازم بگیرید خدا بما چی امر کرده هم خودمون عمل کنیم هم دیگران را بأمل تبليغ بکنين ألزم العمل بما أمركم به وانتهو عما نهاكم الله عنه لا يضركم من ظل إذا اهتديتم بعد أنجام وزيفة برا شما زراري ندارة كبراهية كبراهان وقت كي شما بدنبالش نرفته بحداية شدي. يقول فإنه لا يضركم ظلال من ظل من ظل اذا انتم دمتم العمل گمرائیو برای شما زیر نداری وقتی شما دائما عمل میکنید کنید الله و ادیتم فی من ضل من الناس ما الزمکم الله به بعد از اینکه شما عدا کردید اون چیزی که خدا بر شما لازم کرده در قبال اون کسی که منکر انجام بده. من فرض الامر بالمعروف والناه عن المنکر الَّذی ترکه به او او تحاول رکوب او و یخذ علی دای اذا اداما ظلم یعنی اون امر به معروف و نهی از منکر که اون مرتکب میشه یا میخاد مرتکب بشه شما وقتی باز داشتید و باز منجام داد برای شما ضرری نداره در روایت میاد که ظالم وقتی ظلم میکنه باید دستش را بگیرید و نگذاری ظلم میکنه که اگر شما جلوش را نگیرید و ظلم بکنه شما گناهکارید ولی اگر شما جلوش را گرفتید و ظلم کرتید گناهکار نیستید پس تفسیر این آیه اونه که یعنی بعد از جلوگیری شما اگر اون ظلم میکرد شما در ظلم گناهکار نیستی شریک نیستی اما اگر جلوگیری نکردید شما هم شریکید پس این آیه معناش چی شد؟ یک توجیح اینه که برای شما ضرری ندارد بعد از انجام وظیفه‌تون. وظیفه‌تون رانجامده، خودتون هم عمل می‌کنید، دیگران را هم امر به معروف می‌کنید، به عمل وادار می‌کنید، خودتون از منکر باز می‌اید، دیگران را هم از منکر باز می‌دارید. این کار را که کردید، وظیفه‌تون کنجام گرفت، لایر در رکومانزل، لایزهطریدم. بعد از این، اگر اون گمره شد، شما برای شما ضرری ندارد. و با روایتی دیگه هست از عبدالله ابن مبارک که از تابعین جلیل القدر است ایشو میفرمایند این آیه مؤکدترین آیه است قوی ترین آیه است که تاکید میکنه به امر به معروف و نهی از از نگاه ایشون چطور ایشو میفرمایند که انفسکم مرادش این نفس خود من این من تنها نیستم انفسکم معنا همه مسلمانان هستن ما مسلمان هستن که نفس واحد نیستیم این اشتکا ازوان اشتکا له سائر الجسد بسهره والحمه رسول الله تایی کرد که المؤمن که واحد نه تنها اعضای خانواد ایمون تمام مومنین اون گوشه دنیا مومنی متعلم هست دردی دارد این گوشه دنیا ما باید باید هم دردی بکنیم ما باید خواب داشته نباشیم بخاطر او. لذا اگر در اون سر شهر یکی مشکلی دارد، مشروب می خورد، دارد و بی دارد، ما باید گویا خودمون هستیم، انفسکم. لذا به علیکم انفسکم شما مؤمنین خودتون چیکار بکنید، لازم بگیری بر خودتون. این ها را تبلیغ کنید، دین را معیزه کنید پس این آیه در رابطه با چی است امر به معروف و نهی از منکر است بعد اگر حرف شما را قبول نکردند لا یضرکمن ظاللہ اذا هدیتم او گمراه شد شما هدایت شدید در شما ضرری نداره هر جا انفسکم به همین معنا هم استفاده میشه ولا تقتلوا انفسکم ولا و انفسکم اونجا هم همین توزیات را گفتیم یا عرض خیم کرد در سوره بنی اسرائیل یک معنی انفسکم این هست که اون برادر را که میکوشی خوب برادری تو هست اون برادر را که طعنه میزنی اخه برادری تو هست به خود زدید به این معنی هست اگر آبروی او رفت آبروی تو رفت تو مسلمانی اونم مسلمانه قال عبدالله الله ابن مبارک هذه اوكد آیه فی وجوب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر چرا فإنه قال عليكم أنفسكم يعني عليكم أهل دينكم إن رأى إمام رازيني يعني بأن يعز بعضكم بعضا ويرغب بعضكم بعضا في الخيرات وينفره عن القبائح والسيئات شما هم دي قرر در الخيرات ترغيب بديد السيئات والعقوبات والقبائح برهزر بدارد إي وزيفات بس بس اون وقت که وظیفه خودتون را انجام دادید، لا یذر کم منضل اذه تدیتم زرر نمی رسانه بیشما هر کسی که گمراه شد وقتی که شما هدایت بیشید، ایالله مرجع کم جمعه بسیار الله بازگشت همه گیه شما فایناب به اکم به ما کنتم تاملون بیشما خبر میده هر اون چیزی که شما عمل می کنید. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن جاء الله عز وجل درميان مسأليرا ذكردن در رابطه با وسيئت كي وقتي كي شما ميخايد از ان دنیا بريد مالي داريد چيزي داريد وسيئت بكنيد و أگر در سفر سيد ولو إن كي مسلمانی اونجا نیست، از خودتون کسی نیست، وصیت بکنید دو نفر غیر مسلمان راحت و شاهد بگیرید. اصل این جریان، اشاره به یک اتفاقی دارد. یک، کنم، جریانی که اتفاق افتاد، اشاره به اون دارد. اون اینه که چند نفر برای سفری تجاری رفتند دو نفر ایک تمیم داری هست که بعدن مسلمان شد اون وقت غیر مسلمان بود و عدی هست از میگن هر دو برادر بوده هر دو مسئی بودند تمیم و عدی و یک مسلمان که غلام آزاد شده حضرت عمر بن عاص بود به نام بودیل این بودیل هم در این سفر با اونها بود برای سفر تجاری این مسلمان بود بودیل اون دوتا مسیحی بودن رفتن شام اونجا خریدهاشون را انجام دادند و همونجا که پولهاشون را جنس گرفتن خرید کردند این بودیل مریض شد مریض شد و حالتی برش پیش آمد که متوجه شد داره می میره و نمیتونه مکه برگرده به مدینه برگرده لذا چی کرد نامه نوشت نامه نوشت و برای ورسه خودش البته چون که عمر ابن عاص او را آزاد کرده بود لذا مولایش عمر ابن عاص بود و شما می دونید که این ترکش ماله مولا میشه لذا برای او نوشت لیستی از اجناسی که خریده بود این لیست را در, میا... در وسط اجناس مخفی کرد که وقتی اگر همراهان من خیانت کردند بلاخره لیست را ببینند این همراهان هم اون لیست را ندیدند در میان این اجناس یک می بود که از نقره بود و مرسع بود یعنی تزیی شده بود با تلا بسیار قیمت بالایی داشت که حتی میگن به هزار درهم فروخته شد بعدن این را هم در میان وسایل گذاشت این دوتا شیطان فریب شندت خیانت کردند و همین جام را برای خودشون برداشتند بقیه اجناس را بستند و بعد از اینکه او فوت کرد به مدینه آمدن اجناس را تحویل دادن به امر ابن عاص گفتن که فوت کرد ایشون و این اجناسش به ما که به شما تحویل بیدیم اونها اجناس را گرفتن برداشتن بعد از چند روزی که باز کردن اون اجناس را و اجناس را نگاه کردند که چی دارد چی بوده در میانی اونها اون لیست را دیدند اون لیست را وقتی که تطبیق دادن دیدن همون جامی که علائمش را هم نوشته بود مشخصات را نوشته بود و اگر اون قیمت ترین جنسی که خریده همونه اون درمیان اینها نیست لذا ادعا کردند عمر ابن عاص رضی الله تعالی نو ادعا کرد خدمت رسول الله بر علی این دو نفر این دوتا مسیحی خود تمیم بعدن که مسلمان شده بود تعریف میکرد کرد روایتش در ترمیزی و غالبا در مسلم هست اونها وقتی که ادعا کردند که اینها خیانت کردند باید شاهد می شاهد نداشتند بر اساس دستور اسلامی وقتی که مدعی شاهد داشته نباشه بر مدعی خسم است خب آن حضرت صلی علیه و سلم این هر دو را سوگند دادند. این هر دو سوگند خوردند که ما خیانت نکردیم ما بر نداشتیم لذا دیگه چیزی دست امر ابن نگرفت و نتونست که اثبات بکند که نتونست اثبات بکنه دیگه صبر کرد اما الله عز و جل مقدر کرده بود که این جام برگرده بعد این جام را در بازار پیدا کرده میگن در بازار مکه پیدا کرده این جام را همین مشخصات بود و اینا هم حتما مترصد بوده میگشتند که این کجا فروخته میشه اونجا پرسیدن از اون مغازدار اون کسی که میخواست بفروشه گفتن این را از کجا وردی اون گفت اینا را تمیم و عدی به من فروخته چقدر فروخته هزار درم متوجه شده این همون جام هست بعض دوباره این ادعا مطرح کردند. خدمت رسول الله، یا رسول الله. اینا اون وقت گفتن ما نخریدیم ما بر نداشتیم حالا مشخص بودی نه برداشتن به فلان فرد فروختند آن حضرت صلی اللہ دوباره اینها را خواست اینها دیگر نتونست اینکار بکنن گفتم بله ما خریداری کرده بودیم از خود بدل چرا اون وقت نگفتیم اون وقت نمی گفت... نگفتیم چون متهم میشدیم شما شک می کردید ولی ما از خودش خریدیم خب الان که مدعی خرید هستید بیارید گواهان خرید را شما وقتی خریدید دو نفر گواه بیارید که خریداری کردید گواه نداشته دونا حالا مسئله برعکس شد جای مدعی و مدعی عوض شد حالا اون دو تا مسیحی هستن چی مدعی باید شاهد بیارن اگر ندارند اینها باید سوگند بخورند سوگند بخورن اینجا هست که لا حق حقو می یعنی گواهی ما قسم ما حلف ما از حلف اونها چی هست احق هست بدلیل چی؟ بدلیل اینکه ما علمی نداریم اصل وارث بر علم سوگن میخوره کسی که بر پدر کسی ادعا میکنه که من این مبلغ را ازش میخوام شریعت همینه اون مدعی را میگه شاهد بیار اون شاهد نداره حالا این مدعی را میگن که این میخوام منزل شما را ببره پدر شما فروخته بین اونا سوگن بر علم میخورن که ما خبر نداریم وقتی که سوگن بر علم بخورن دیگه دف میشه ادیاء پس اینها هم سوگن بر علم خوردن که ما دو نفر که امر ابن آسی که دیگه از آزای خانواده که ما اطلاع نداریم که این جنس را بدیر به اینها فروخته باشد و گفتن که شهادت ما از شهادت اونا احق لذا بر اساس این آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجدد فیصل فرمودند جام را برای اینها و اون دو نفر را گفتن بری شما پول بند خدا را که گرفتی پس بدید این در رابطه با همین است الله می فرماید یا ایوها الذين آمنو شهادت بينكم اذا حضر احدكم الموت ای مؤمنین شهادت بین خود شما لازم هست وقتی که حاضر شد یکی از شما را مرگ شهادت چه زمانی؟ این بدل است اون زمان شهادت را می فرمند حین الوصیت اسنان حین الوصیت بوقتی وقت وقتی وسیت می کند اسنان زواعدل منکم دو نفر عادل از خودتون که شما شاهد باشید فلان مال چنینه فلان مال چنونه وقتی که مسلمان هست جا موجود است از خودتون شاید بگیری از دیگران نگیرید یا اگر در سفری بودود اونجا مسلمانی دارو بردون نیست او اخران من غیرکم دو نفری دیگه غیر از خودشما اگر شما در زمین رفتید ضربتون فی الارد بمعنی سافرتم اگر شما مسافرت کردید فأصابت کم مصیبت الموت. به شما حادثه مرگ رسید تحبیسون هما من بعد سلات این دوتا را بعدا سوگند بردید. یعنی دو نفر شاید شاید سوگندی هست من بعد سلات میگن بعد نماز اصر چون بعد نماز است در تمام مذاهب مقدس است. معتقد آخری روز هست وقت رجوع الله هست وقت استغفار هست ملائکه شیفتشون جابجا میشه این در تمام تعلیمات هست فیقسمان بالله ان ارتبطم اگر شما شک داشتید اونا قسم بخورند که ما این شهادت را کمیدیم دیدیم لا نشتری به ثمن قلیلا ولو کان ما پول اندکی در مقابل این شهادت نمیگیریم گرچه اون کسی که ما برایش قسم میخوریم برای شهادت میدیم از خشاوندان باشد. ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين ما شهادت الهي را کتمان نمیکنیم چیزی که خدا مارا شاہد قرار ما را شاهد قرار داده ما بهمون شهادت می دیم اگر که توان بکنیم ما گناهکاریم یعنی گویا این کلمات تلقین داده بشه بیش طبتهاس دروغ نگه اما کسی دروغ گفت نترسید فان عثر على انه مستحق اثما اگر اطلاعی حاصل شد شما اطلاع یافتید بر اینکه آن دو مستحق گناه شدند مستحق گناه چطور؟ به این صورت که اونها دروغ گفتد همین که اون جنس را پیدا کردید بعدا برای شما دلیل قائم شد معلوم میشه که گاهی فیصلی میشه و فیصلی که تمام شد دوباره نمیشه تجدید نظر کرد مگر اینکه یه اطلاعات جدیدی به دست بیاد احوال جدیدی بیاد لذا فااخران یقومان مقامهما دو نفر دیگر قائم بشن به جای اونها دو نفر دیگه دیگه اینا میشه مدعی من الذين استحق از اونهایی که مستحق این ضرر شدند اونهایی که این ضرر بر اونها استحق بمعنی سبت سبت الضرر رو علیهم این ضرر بر اونها آمده اون دو نفر قس... قسم بخوره اما اولیان دو نفری که به اون متوفا به اون مورس نزدیکترند اولاترند این دو نفر بیان قسم بخورند چیک ازم بخورن؟ فیقسمان بالله لا شهادتنا حق من شهادتهم ما به خدا سوگند یاد کنند که شهادت ما از شهادت آنها درست تر است ثابت تر است سید تر و ما اعتدینا ما تعدینا نکردیم ما واقعیت را میگیم انا اذا من الظالمین اگر تعدی بکنی ما از ظالمین خواهند بود لذا الله میفرمازد ذالک ادنا ان یاتوا بالشهاده علی وجهها اینکه او را حلف بدند و سیه این نزدیکتر است بینکه شهادت را به احسان انجام بدند یا تو بی شهادتی علا وجه بشکل اصلی او یقافو ان ترد ایمانم بعد ایمانهم یا می ترسن که فردا اگر ظاهر بشه اگر در ذهن خودشون یک گندی دارند یک خیانتی دارند بدونن که دیگه سوگندی خواهد آمد و سوگندی مارد چی میکند ابطال. لذا او ان ترد ایمانم بعده ایمانهم که سوگند دیگری بعد سوگندی هنها میاد و رد میشه ایمانشون. شون واتقوا الله بعضا نسخه امل واتقوا الله واسمعو از خدا بترسید و دستورات خدا را خوب گوش کنید والله لا يهد القوم الفاسقید الله تعالی در آخرت راهنمایی نمائی نمی فرماید بسوی نجات قومی که فاسق هستم یوم یجمع الله الرسول لا یهد القوم الفاسقین در اون یوم یجمع الله الرسول از اینجا به بعد تخویف اخروی هست و الله عز و شدت اون روز رو بیم می فرم ببین این ذکر آخرت در میان این احکام واقعا لازم است. عرض کردم چی چیزی تقوی میاره ذکر آخرت میاره وقتی که تقوی بیاد عمل بر همه مسائل آسان میشه ازا الله ذکر میفرمید از رسول یومی الله اللہ الرسول روزی که الله جمع میفرمید همه رسول و فرستادگان را فیقول ماذا اجبتم بیانها میفرمید شما چه جواب اداد شدید از سوی های خودتون قالوا لا علم لنا ما علمی نداریم لا علم لنا یعنی چه منظور اینه که تا زمانی که حیات داشتیم می‌دانیم اما بعد از ممات ما علم نداریم معلوم میشه که بیا علم غیب ندارند بعد از وفات خودشون از این چیزی خبر ندارد چطور ما این را گفتیم لا علمنا بعد از وفات اول امام رازی میگه لا علم لنا الا ان علمنا ان علمنا جوابهم لنا وقت حياتنا ولا نعلم منهم بعد وفاتنا ان جوابي في وقت حياتهم ما داموا ميدونين بعد الوفاهه ما علمنا نداري خب ان تفسير از كجا ببین از آيه بعدي كه در رابطه بس سيدنا عيسى هست معلوم میشه كه لا علم لنا بعد سی هست وفاته اینکا انت علام الغیوب همانا تو هستی فقط و فقط تو هستی داننده همه غیوب ما نیستیم ما غیب نمی دانیم از اینکا انت علام الغیوب هم معلوم میشه که لاعلم لنا مربوط به چی هست به زمانی که ما نبودیم اون زمانی که بودن در اونها که میگند خب بعد از این نوبت به عیسی میرسد خاصتا عیسی را چون که در رابطه با خود عیسی علیه الصلاۃ و سلام غلف بود افراط بود نفی الوهیت عیسی است در این آیات اذ قال الله یا عیس ابن مریم زمانی که عیس ابن الله تعالی فرمود ای ابن مریم اذکر نعمتي عليك وعلى والدتک یاد کن هم را بر خودت و بر والدیت اذ اید تو که بروح القدس نعمت اول این زمانی که من تو را تایید کردم تقویت کردم با جبرائیل امین یعنی اون همیش معید تو بود در کنار تو را تعیین کردم تکلم الناس فی المهد و کهلا نعمت دوم دو کلام می کردی با مردم در گهوار و پیری, پیری را عرض کردم اشاره بیچیه نزول ایسا بعد از چون در جوانی رفت شد و اذا علمت کالکتاب والحکمت والتورات والانجیل همچنین یاد کن زمانی که من ترات تعلیم دادم کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت نبوی این لازمی است این را باید یاد داشته باشه چون باید مجدد بیاید در زمانی که حاکم دنیا کتاب و سنت است و همچنین تورات و انجیل را اینها را من به تو یاد دادم این نعمت ثوم نعمت چارم موجزاتی که به تو دادم اما حقیقت موجزات اینجا واضح شده ای کسانی که از موجزات شما بر قدرت خارق العاده انبیاء استدلال می گیرید و می گید انبیاء مدیران مدبران متصرفان اینجا هیچ کاری بدون اذن الله پیغمبر خدا نمی انجام بده و اذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذنى این باذنی باذنی که 4 5 مرتبه تکرار شده این دار است یعنی هیچ حرکتی یک بار می فرمو باذن کافی بود هیچ حرکتی بدون اذن الله نمیتونه انجام بده وقتی که تو ساختی از گل مثل هیئت پرنده هیئت پرنده مجسمه گِل پرنده پر گلی که حیعت طیر مثل حیعت پرنده به ازنی به اجازه من درست کردی فتنفخ فیها فتكون طیرم بی ازنی دم میکردی میدمیدی می در آن فتکون طیرم پس او پرنده میشد شد بی ازنی با ازن من با اجازه من و تبرئ ال اکمه وال ابرس ازنی و درست کردی اکمه یعنی کور مادرزاد را والابرست کسی که مریضی برست داشت به ازنی به ازن من به اجازه من و از تخرج الموتا به ازنی و زمانی که تو مردهارا از قبر بیرون میکردی به بی ازن من همه اینا به ازن من بود و بعض معلوم میشه شه ایسا علیه صلات سلام خودش کوچکترین قدرتی نداشت که الله می من تو را نجات دادم از بنی اسرائیل و از بنی اسرائیل عنک زمانی که بعض داشتم بنی اسرائیل را از تو عنکه یعنی از قتل تو از کشتن تو من بودم نجات دادم اذ جئتهم بالبينات زمانی که تو پیش انها با همین موجزات آمدی و با دلائل توحید آمدی اما پاسخ انها بود؟ فقال الكافرون منهم ان هذا الا سحر مبين كافران ازون ها گفتند ازون بنی اسرائیل که اونایی که کفر کردند این مگر جادوی آشکار به معجزات گفتند و اذ اوحیت الى الحواریين زمانی که من وحی کردم به سوی حواریین وحی کردم یعنی چه یعنی اعلام کردم یا اینکه واحی کردم در انجیل با واسطه به ثب رساندم یا در دلشون القا کردم ان آمینو بی و بر رسولی اینکه ایمان بی به من و به رسول من قالو آمننا و شهد باننا مسلمون عیسی این پیروان صادق رممن برای تو تا این کلام گفتند آمنا ما ایمان آوردیم وشهد باننا مسلمون ای عیسی تو گواهی بده که ما تسلیمیم در مقابل الله عزوجل اما قصه نزول مائده که این سوره را نزول سوره مائده میگن این است که حواریون گفتند اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم ای عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء آیا رب تو می تواند نازل بکند برای ما ای از آسمان ای از آسمان باشد و اینجا پهند بشه ما بخوریم قالت جواب ایسوی از خدا بترسید اگر مومن هستید یعنی بدونی ضرورت موجزه نخواهید موجزه کم ندارم اونها غالباً این همه معجزات را و خارق را دیده بودند گفته این یکی هم بیاد سفره ای هم هست این آیه را هم می‌بینیم خودمون هم از سفره می‌خوریم برکاتون هست قالو نريد و ان ناكل منها چند هدف داریم ما اول می‌خایم که بخوریم یعنی بدون ضرورت شما میگین بدون ضرورت نیست می‌خایم بخوریم و تضمین قلوبنا و دومین که دل ما مطمئن بشه. شنیدن کهی بود ما نده. دیدن خودمون می بینیم. و سوم و نه علم آن قد سادق نه یا این سوم نیست این همون تفسیر دومیه. تضمین قلوبنا تا چی؟ تا که بدونیم که تو آن قد سادق ترا. تو برای ما درست گفتی راست گفتی. و وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ او وقت ما هم جوز شایدین باشیم لذا چنین سفری استو می خواهیم ایسا ابن مریم وقتی که دید انها اصرار دارند دعا کرد از خدا خواست قال عیسی ابن مریم ایسا ابن مریم گفت اللهم ربنا بار اله ای رب ما انزل علینا ما ایده من السماء فرود بیار برما نازل بفرما برما ما سفری از آسمان چنان سفری که تکونو لنا عیدلی اولنا و آخرنا نعمت خاصی برای ما باشد خوشی باشد برای اول و آخر ما برای اول ما به اعتبار حصول برکات و برای آخر ما به اعتبار انعام بر سلف بگه خداوند بر سلف ما چنین لطفی کرد که از آسمان برای اونها صفری نازل فرمود تکونو لنا عید لأولنا نه و دیگه و آیتم منک و یک نشانی از سویتو بر نبوت من باشد این همه نشانی یکی دیگه هم ورزقنا و انت خیر الرازقین ما رزق بده به ما عطا کر این را و تو بهترین رازقین هستی پیغمبر خدا وقتی که دست به دعا برمی‌دارد الله عز و جل اجابت می‌فرماید اما این اجابت به شرط است الله قاعده و قانون را بیان می‌فرماید اون قانون این است که وقتی که قومی آیه خاصی را مطالبه بکند اون آیه خاص را من بهشون اگر بدهم و بعد از مشاهده اون آیه خاص اون معجزه اگر کسی قبول نکند ایمان نیاورد اون وقت من بسخترین عذاب گرفتار شو قال الله اینی منزلها علیکم الله فرمود ما من نازل کنند این هستم بر شما اما فمن یکفر بعد منکم هر کسی کف کند بعد از این از شما از شما هر کسی کف بکند معلوم میشه همه کف نکردم بعضی ها از اشاره همین آیه معلوم میشه فانی عذبه عذاب الله اعذبه احد من العالمين همان امام را عذاب میدهم چنان عذابی که مثل اون عذاب نمیدم هیچ یکی از عالمیان را از جهانیان را مثل اون عذاب من به کسی ندادم و نمیدم حالا یک بحث اینجا هست اهل تفسیر میگن آیا این سفر نازل شد یا نه یعنی چون در قرآن داستان است امین جامده بیشتر از این نیامده و هدف قرآن هم داستان سرایی نیست هدف قرآن گرفتن موجزه هست گرفتن اون نکته مقصودی و کلیدی هست که این هست که خدا اگر موجزه بیاره و کسی قبول نکند موجزه ای باشد اون وقت عذاب سختی میده. مثل قوم صالح را که خاصتا شطور را، اونجا سریح است که شطور آمد، شطور را اونها از پای در آوردن خدای تعالی اونها را عذاب داد. اما اینجا سریح نیست. به این دلیل اختلاف است بین اولمها که آیا هل نزلت الما ایده تو این سفره نازل شد از آسمان یا نه؟ چون که ذکرش نیست بعضیها انکار میکنند نخیر. سفرای در کار نبوده اگر سفره بود الله تعالی ذکر میکرد که سفره آمد انکار کردند یا قبول کردند اونایی که انکار کردند چی شدند اما با توجه به اشارات بعضی از آیات دیگر جمهور معتقدند که سفره نازل شده علامه قرطبی نوشته وقتل العلماء فی المائده علماء در رابطه با مائده اختلاف دارند هل نزلت املا فالذي عليه الجمهور وهو الحق نزولها حق هم همین است ایشو میفهم از نظر من که این سفر نازل شد حالا چطور نازل شد کیفیتش را الله بهتر میداند ولی در آیه دیگه ما از عذاب هایی که بر بنی اسرائیل آمد اینا هم بن اسرائیل بودند از, از آبهایی که بر بنی اسرائیل آمد ما میخانیم جعل منهم القرت تول خنازیر اونجا بحث خنزیر آمد که خدا اونها رو خنزیر ساخت. میگویند که کسانی که سفره بر اونها نازل شد و قبول نکردن خدا تبدیل به خنزیرشون کرد حالا اینایی که سفره را خاص حواریون بودند خاصان ایسا برای اینها نه اما وقتی که سفره آمد تعدادی از بنی اسرائیل وقتی که سفره را مشاهده کردند سر سفره محمدت خوردند غیر حواریون اونها گفتند که این جادویی است چه جادوگر قوی است چنانچه چه بقیه معجزات عیسی را جادو گفتند اینو هم جادو گفتند الله عزوجل همون افراد را اون افراد را تبدیل به خنزیر کرد که تبدیل خنزیر شدند چند روزی باقی مردند و بعد مرتد الله عالم لذا این داستان مائده هست که این سوره به نام مائده هست حواریون از اللہ تعالی تغاظہ کردن و اذ قال الله یا عیسی من مریم این اعادت لبعد العهد است شما از اول سوره خاندید که اذ قال اللہ یعیسی مریم اذکر نعمتی علیکا بعد ذکر انبیاء آمد به انبیاء گفته شد ماذا اجبتم اون سوال از عیسی هم میشه اما چون که در وسط ذکر عیسی موجزات عیسی نزول مائده اینا مهم بودن اینا را الله تعالیٰ ذکر فرمود لذا وقتی که غصه طولانی بشه و اون هدف اصلی نتیجهش قرار بیان بشه دوباره هم سر آیه اول آیه چی میشه تکرار میشه این را چی میگیم اعاده لبعد عهد لذا اونجا الله تعالیٰ گفتی یا عیس ابن مریم در ادامه همون هست و اذ قال الله یا عیس ابن مریم زمانی که اللہ عزوجل و فرمود ایس ابن مریم ا انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله آیه تو گفتی به مردم که اتخذونی مرا بگیرید و مادر من را به عنوان دو اله غیر از خدا از اینجا معلوم میشه که مسیحیان گذشته مادرش را عبادت میکردن بعدن با هم اختلاف کردند که مادر یا روح القدس انهایی که امروز هستن سومین خدا روح القدس را میدانن. قال سبحانك ما يكون لي ایسا علیہ السلام گفت با پاکی بار اله ما یکون لیس سزاوار من نیست ان اقول ما لیس لی بحق انکی من بگویم آن چیزی که حق, حق من نیس حق من عبدگی است عبدیت هست بندگی هست نمعبودیت و علویت این کنت قلته فقد تا اگر من چینی چیزی گفتم تو میدانی تعلم ما في نفسی، ولا أعلم ما في نفسك. دلیلش اینکه تو می دانی، آنتک دچار درونی مناز، اما مناز درون از علم تو خبر ندارم. اینک انتعلم الغیوب، همانا توی فقط تو، علم الغیوب داندن تمامه تمامی. غیبها فقط توی بار ایلاع. ما قلت لهم إلا ما امر به من نگفتم به اینها مگر اون چیزی که تو مرا امر کردی تو دستور دادی من همون گفتم خلاصه تبلیغ عیسی چی بود ان اعبد الله ربي و ربكم اینکه ای مردم فقط الله را عبادت کنید آن اللهی که رب من و رب شماست فقط او را عبادت تبلیغی که مال بغی انبیاء بوده تبلیغ من هم همین بوده و بار اله من میتونم گواهی بدهب اربوط به اون زمانی که در حیات خود من بود خودم در میانشون حضور داشتم اما بعد از این که مرا گرفتی و بردی به آسمانها بعد از اون من خبر نداره الان که عیسی حیات هست و در آسمان است هم خبر نداره از احوالش اینجا صراحتن میگه و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم من هستم بر آنها گواه بودم گواه ما دمت فیهم تا ما دامی که در میان اونها بودم فلما توفیتنی زمانی که جان مرا گرفتی توفی ما قبل خدیم از قال الله یا عیسی انی متوفی کا متوفی کا کاملاً تورا جان را مال جسد روح را مال جسد گرفتیم توفی در قرآن به همین معنا استفاده میشه کمتر هست که توفی به معنی موت استفاده بشه چرا بعضی جا استفاده میشه الله یتوفى الانفس حین موت اونجا ذکر موت با صراحت میاد هر جا که در مقابل حیات استفاده میشه توفی استفاده نمیشه چی استفاده میشه ممات استفادة ميشئ انا احيي واميد نمي فرميت كي اتوفى نفوسكم انا احيي واميد يا كنتم احياء كنتم امواتا فاحياكم در مقابلة احياء موت استفادة ميشئ توفي نميشئ لذا فلما توفيتني وقتك تمر كاملا جان مرا گرفتی کاملا یعنی روح مع الجسد کنت انت الرقیب علیهم تبودی محافظ و نگهبان بر آنان و انت على كل شيء شهید تو بر هر چیزی هستی و بعد ایسا علیه صلاة و السلام محروض دیگری دارد بعد از اینکه اظهار بی علمی می کند اظهار لا علمی می کند می فرماید انتو عذبهم فانهم عبادکم بازی میگه این تبری از شفاعت است شما مزیرش نمی‌بینی تبری از شفاعت یعنی خدایا وقتی اینطور گفتم من شفاعت نمی کنم من برای اینها سفارش نمیکنم که اینها با با توحید تو خیانت کردم با تو شریک ساختند انت تعذبهم فانهم عبادك اگر تو اینها را عذاب بدی بندگان خودت هستند یعنی با من ارتباتی ندارم من شفاعت بکنم و کسی هم بس تو اعتراض نمی‌کند و ان تغفر لهم اگر ببخشی پس فانك انت العزيز الحكيم تو غالب هستی و کراهت تو من همونجا بحثی ندارم منظور این است که نه برای عذاب اینها کسی است میفرست نه اگر ببخشی کسی میفرست الم يلحقك بتعذيبهم اعتراض با عذاب دادن آنها هیچ عذاب احترازی بر تو نخواهد بود چرا لانک المالک المطلق لهم مالک مطلق توی و اگر ببخشی لم یلحق عجز بذلک ولا استقباح نہ عجز نہ قبحه القوی القادر علی جمیع المقدورات هر در علی علامه الحوسی ازا تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الله عز وجل من فرمودن کہ ان روز روزی هست کہ ينفع الصادقين صدقهم بصادقین صدق انها نتیجه مره انها ایک صادق بودن در قول عقیده عمل عمل امروز ستمی اونها نتیجه میده اونایی که کاذب بودن نفاق داشتن بد عمل کردند. اونها گرفتار این کسانی که صادقین هستند از اینجا معلوم میشه که معنای صادقین یا ایوها الذين امنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقین یا در رابطه با صحابه آمده اولئک هم الصادقون معنای صادقین اینه که مطابق عقیده خودشون عمل میکنند یعنی این عملی که ظاهرا داره میکنه در باطن هم همینه در باطن نفاق نیست قال الله هادا يوم ينفع الصادقين صدقهم نف مرن بیان نف چه نفی لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا براین ها جنات و باغاتی هست کی جاری هست از زیر درخت ها و قصورش نهرها همیشه در آن جنات هستند بی سرعت ابد رضی الله عنهم و رضو عنهم این جنت روحانی و معناییه اون جنت جسمانی بود بالاترین اینه و رضوان من الله اکبر الله راضی شده از آنان و آنها راضی شدند از الله ذالک الفوز العظيم این هست فوز عظیم که الله راضی بشه. و الله تعالی این بحیث را بهش اطاعت کنه. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ این خلاصه صورت است که الله عزوجل نه میفرماید تمامی صورتای شرک را. هیچ شریکی ندارد، ندارد تسرفات، ندارد اختیارات، ندارد قدرت، ندارد الوهیات. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فقط و فقط برای الله از پادشاہی آسمان ها و زمین و ما فیهن آنچه در میان هست و هو على کل شئی قدير و بر هر چیزی قادر هست و مقتدر هست